سوره مبارکه مائده از سوره های مدنی هست و از سوره هایی هست که اواخر نازل شد از نظر ترتیب یک سد و دوازده سوره هست. یعنی دو سوره بعد از این نازل شد و سوره مائده را به این خاطر مائده می گویند که در این سوره ذکر معایده و سفری هست که مسیحیان از خدای عز و جل مطالبه کردند ایسا علیه صلی اللہ سلام خواسته انها را مترک کرد و بالاخره در پایان این سوره می خانیم که خدای تعالی اون معایده را اون صفره را که یکی از معجزاتی ایسا علیه صلی اللہ سلام بود نازل فرمود. رابط اسمیش قبلا گذاشت اما رابط معنوی ببینید در سوره بقر مزامینی که گذاشتند توحید بود، رسالت بود، جهاد بود، انفاق بود، امور انتظامیه و امور مصلحه همچنین رد بعد شرک اعتقادی، شرک فتصرف بعد در سوره آل عمران هم نفع شرك اعتقادی و نفی شرک فی الدعا و فی التصرف بود و شبهاتی که در باره رسالت بود پاسخ داده شد بعد در سوره نساء امور انتظامی که مربوط برعیت و راعی بود اونها بیان شدند حال در سوره مائده و انعام نفع شرك فعلی هست انجا شرک اعتقادی انجا شرک فعلی شرک اعتقادی اینه که انسان از نظر اعتقاد و باور کسی را غیر از خداوند صفت خدا بهش میده اما شرک فعلی اینه که بخاطر کسی بر خودش چیزی را حلال می‌کنه یا حرام میکنه. خدا حلال کرده این حرام میکنه بر خودش یا خدا حرام کرده این بر خودش حلال میکنه. این را میگن شرک فعلی لذا در این دو سوره خدا عزوجل شرک فعلی را نفی فرمید در این سوره مبارکه این سوره هم فضایل زیادی دارد آیه‌ای که این آیه به آیه تکمیل دین معروف است اليوم اكملت لكم دینکم که از آخرین آیات است که در حجت ویدا این آیه نظر شد در همین سوره قرار دارد در این سوره خدای عزوجل به تفصیل اون معکولاتی را خوراکی های را که حلالند و اونهایی که حرامند خداوند تعالی در این سوره بیان فرموده و در این سوره خدای عزوجل ستا داستان را که بسیار این ستا داستان هایز اهمیتند ذکر می فرما یکی داستانه موسیٰ علیه و السلام و برخورد قوم و عاقبت و نتیجه دوم داستان فرزندان آدم علیه صلات السلام که فقط در همین سوره بیان شده حابیل و قابیل و انجام و نتیجه اونا سوم داستان همین مایده و سفره که در پایان سوره داستان آورده میشه لذا این خلاصه سوره هست خداوند آغاز میفرماید با این جمله که ای مؤمنین به اهدتون وفادار باشید یا ایوها الذين آمنو ای کسانی که ایمان آوردید اوفو بالعقود عقود جمع عقد است اه و عقد بمعنی عهد عهد و پیمانی که دارید به اون عهد و پیمان ها پای بند باشید مراد از این عهد و پیمان چیه؟ بعضی میگویند که منظور عهد و پیمانی که قبل از اسلام شما دارید به اونها پایبند باشید بعضی میگه عهد و پیمان هایی که ما در روزمره با هم دیگه داریم مثلا بی شرا نکاح انسان مثلا معامله ای این معامله یک نوع عهدی است شما که ماشینتون را میفروشید منزلتون را میفروشید عهد کرده که به او دادی فردا نه دوباره دیانا کن فردا که دیام میکنی میگه این منزل مال من هست در حالی که پولش را بالا دادی و سندی به دستت هست یا مدرکی دیگه به دستت هست تو داری عهد را میشکنی. پس بعضی میگویند که مراد از عهد چی هست به و هست نکاح هست و غیره بعضی میگه مراد از عهد عهد و پیمان هایی که فیما بین هم هستند مردم با هم دیگه چی دارن عهد دارن پیمان دارن اونها هستند بعض میگه این اوفو بالعقود مراد اهل کتاب هستند پیمان هایی که اونها در کتاب های خودشون و ولقد اخذ الله چون در همین سوره میاد ولقد اخذ الله میساق بني اسرائيل و بعث منهم 12 نقيبه وقال الله اني معكم لين قمتم الصلاه واتيتم الزكاه خداوان عهدي که در تورات از بني اسرائيل گرفته مفصلا اون عهد را خداون ذکر میکند بس اون عهد مراد است همه این اقوال را مفسرین ذکر الله ما ابن جرير علامه قرطبی علامه علوسی اما بهترین قول بهترین توجیه و کاملترین اینه که مراد از عهد اینجا اولا مراد از الَّذِينَ آمَنُوا آمَست اهل کتاب نیستند عامه مؤمنین، هر کسی به خدا ایمان دارد و مراد از عهد هم آم هست عهد خاصی مراد نیست با هم معامله کردید نیست یا بر خود نظر کردی اون مراد تنها نیست هر چی که فرائزه واجباته حدوده حلال و حرامه تمام احکام اسلام تمام اقود تمام معاملات تمام نظر و نزورها همه مراد هستند چون عهد شامل همه میشه هر عهدی که بسی مثلا ما یک عهدی با خدا داریم وقتی که ایمان آوردیم این ایمان برای ما این تعهد را ایجاد کرد تمام فرایض خدا را انجام بدیم واجبات از منهیات و ممنوعات دست بکشیم هر نظری که میکنیم این عهدی برای ما ایجاد میکنه هر معامله که با هم دیگه میکنیم عهدی هر پیمانی که با هم دیگه میبندیم عهدی هست همه اینها را شامل میشه بله چنانچه می که عهد الله عهدا ابرمه الله تعالى واحكم بما انزل الله في كتابه من اياته الداله على توحيده وغيره وسالله می فرماید یا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أي مؤمنان شما وفادار باشيد پایبند باشيد متعهد باشيد به تمام عهد و پیمان های کے شما دارید چه اهد عهد و پیمان ها مربوط به حقوق الهی باشند چه مربوط به حقوق بندگان خدا باشند احلت لکم حال بعضی از اون اهدها ببین خدا را که قبول کردی و به خدا ایمان آوردی باید به حلال خدا پایبند باشی به حرام خدا هم پایبند باشی هرچی میگه خدا میگه حلال بگو چشم هر چی میگه حرام از اونها دوری کن احلت لکم بهیمت الانعام حلال قرار گرفت برای شما چار, چار پایان حلال هستند البته بهیمت چار پا رمیگا الانعام چار حلال گوشت رمیگا وقتی تنها باشد ما در سوره انعام خاهم خاند که انعام هشت قسم است من الضعن سنینه و من المعز سنین من الإبل سنینه و من البقر اسنين غسفند بوز و شطور قاف چهار تا اینا شده نرماده که بشه هشت قسم میشه پس انعام به چارپایانی گفته میشه که حلال گوشتن این هشت قسم هستن بهیمه الانعام مطلقاً چارپایان الا ما يطل عليكم اینا حلال هستن مگر اینا حرامند که ما یطلع علیکم در آیه بعد می آئید. غیر محل سید در حالی که غیر از این که شما چکار بکنید سید را حلال بدانید و انتم در حالی که شما احرام دارد اگر در حالت احرام باشید و شکار کردید شکار حرامه هم برای شما حرامه هم برای کسی که تو احرام نیست برای اون حرامه وقتی که شما موارم زدید کسی که محرم اس وقتی که شکار کرده دیگه برای خودش هم حرامه برای غیر محرم حرامه ان الله يحكم ماوری چرا؟ اول جواب حاکمانه خداوند هر چیزی که بخواد حکم میکنه دستور میده چرا نداره اون حاکم مطلقه اون رب عالمیان هست پس باید به دستورش و فرمانش عمل کنی خب بعضی از احود نزورات هستم نظری که شما می کنید شما مثلا شطوری را از اینجا برمیداری، شما شطوری را برمیدارید دارید و می که این شطور را برای خدا قربان می کنم این حدیه حج من هست تمتع دارم میرم این را با خودم می برم اونجا در منا قربان الان به این عهد وفادار باشم وقتی برداشتی برو تا آخر انجام بده لذا اللهمی فرمد یا ایوها الذین آمنوا لا تحلو شعائر الله ای مؤمنان شما حلال ندانی شعائر الله را یعنی حرمت شون بداری تا. شعائر الله ببینی شعائر جمع شعیره است شعیره بمعنی علامت هر چی که علامت دین باشد و علامت یکی از احکام دینی باشد هر چی که چی باشد علامت دین باشد یا علامت یکی از احکام دینی باشد مثلا مسجد علامت دینی ماه است جز شعائر اللہ است آیا مذهب دیگر از مذاهب از مذاهب غیر مسلمان را میگم دین دیگر از ادیان مسجد دارد ندارد اذان از شعائر الله هست گرچه حکمش سنته اما از شعائر الله هست هر کسی که باوجودی که حکمش و گفتنش و خواندنش سنته اما هر کسی که به اذان توهین بکند و انکار بکنه میشه کفر پس هر چی که علامه مثلا ازان علامت نمازه شما وقتی میرید این حجی را با خودت میبری این شتور را با خودت میبری این حجی علامت حج صفا و مروع از علام حج هست این ها تمام شعائر الله هستند بس هر چیزی که علامتی باشد علامت دینی باشد یا علامت برای یکی از احکام دین, دین باشد قال مجاهد قول الله شعائر الله الصفا والمروة والهادي والبدن كل هذا من شعائر الله تفسير ابن جرير بس اي مؤمنان شما حلال نداند يعني بحرمتين كنيد شعائر الله رأ ول الشهر الحرام ونماه حرام ما هي حرام شارت هستند رجب وزيقاد زياج محرم این ها چی هستند؟ ماهای حرام هستند در این ماها جنگیدن ابتدا ممنوع الان هم حرمتشون هست اما انه ارز کنم که حرمت با این معنی که جنگ حرام باشد نیست این حکم منسوخ شد اما احترام را دارند و الشهر الحرام و الهدیه و همچنه هدیه که برای قربانی برده میشه و لا القلائد و لا قلائد قلائد جمع قلاده هست قلاده چی را میگویند؟ هم اون حیوانی را که گردان بندی قلاده اون حیوانی را که بندی بندی گردنش آویزان هست. الهد المراد منو الهدی زو... زواد القلائد. و همچینین ولا آمین البيت الحرام و نقص کنندگان بیت الحرام را اینها را شما جلوشون را نگیرید. ببینید آیا هر کسی که قصد بیت الحرام را داشت ولو اینکه مشرک بود نباید جلوش را بگیریم بعضی میگویند که منظور از این مشرکینی که در حدیبی مانع رسول الله و صحابه شدند هرگر این مشرکین اگر خودشون آمده شما تعرض نکنید جلوشون را نگیرید ولی ما از یک طرف آیه داریم یا ایوها الملک يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسون انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا انا اجازنا دار پس چطور ما کنن یعنی قصد کنندگان کن بیت حرام را جلوشون را نگیریم لذا بعضی میگویند که مراد از این مشرکین نیستند بلکه بعضی از قبائل و اقوام دیگر که اون زمان با مشرکین مانع مسلمان شدند اما بعدا مسلمان شدن خارج حرم زندگی می کردن بعدا مسلمان شدن الان که مسلمان شدن اینا قصد بیت الحرام را دارند شما جلویشون را نگیرید دیگه دو روز جلوی شما را گرفتند به این خاطر شما امروز مقابله بمث کنید نکنید چون الان ایمان دارن اینها ولا ام من البيت الحرام ونقصکن اندگان بیت حرام کی بتغون فضلا من ربهم این یبتغون دلیل بر اینه نه مشرک نیستم مؤمنا می طلبن فضل ربشان ورضوان را رضوان و رضوان خدالا و اذا حللتم قبلا گفتیم که غیر محل صید و انتم حرم اگر در حالت احرام هستید شکار نکنید اما حلال شدید از احرام خارج شدید فصادوا شکار کنید این امر برای اباحه است یعنی شکار برای شما مباح ولا اجر منكم شناعن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا این تأکید بر تعمیل هست یعنی با قومی که بغض دارید مثلا با مشرکین که دیروز شما را باز داشتن از مسجد الحرام امروز که بالادستی مال شماست شما, شما بر اونها تعدی نکنید شما بر اونها تعدی نکنید یعنی شما اهل انتقام نباشید اهل عقده نباشید یک این نکته و این برداشت را ما باید از آیات داشته باشیم که خدای عزواجل به مسلمانان همون طور که خود خداوند و رحیم هست و کریم هست بندگان خودش را به این اوصاف تشویق می کند چرا وقتی که دشمن چی باشد تمرد بکند شما هم بزنید فضرب الاناق گردنشون را بزنید اما الان که او شکست خورده شما رعوف رحیم باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه را فتح کردند روی شطور سرش را پایین گرفت. یعنی با و آمد. و وقتی که آمد مردم مکه همه سراشون پایین بود شرمنده خجل کسانی بودند که بدتری شکنجه را به صحابه دادند رسول الله چی لا تسریب عليكم اليوم یغفر الله لكم ملامت نیستی شما شما مثل برادران یوسف اشتبائی کردید ما بدنبال انتقام نیستیم اعلام کرد هر کسی که وارد مسجد الحرام شد آمن است من دخل المسجد الحرام فهو آمنون من دخل دار ابي صفیان فهو آمنون من دخل بيته فهو آمنون هر کسی خانه ابو اسوفیان رفت امنیت داره. هر کسی تو خونش نشست و نیامد بیرون امنیت داره. هر کسی تو مسجد حرام رفت امنیت داره. یعنی ما دنبال انتقام نیستیم. دنبال خون ریزی نیستیم. لذا الله تعالی می فرماید اے مسلمان دیروز که این کافر نسبت به تو ظلم کرد نگذاشت وارد مسجد حرام بشی. مانعت شد. امروز که بالادست تو هستی قدرت در دست تو هست، تو در صدد انتقام نباش تو عفو عمومی داشته باش رفت داشته باش لذا الله می فرماید ولا يجرمنكم شناان قوم تحریک نکنت برنگیخت نکنت شمارا بغض قومی که عن المسجد الحرام انکی باز داشتن شمارا از مسجد حرام این باز نشه که ان تعتدو شما شمار تعدی کنید انکی شما تجاوز بکنید و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اللہ می هم دیگر را کمک کنید هم دیگر را یاری کنید بر اساس بر و تقوی نیکی و خدا ترسی یعنی در مسیر نیکی و خدا ترسی معین و معافن هم دیگر باشید ولا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ هم دیگر را یاری نکنید بر گناه و تعدی هر چیزی که او اصلش و اساسش خیر است همکاری و تعاون در اون هم اجر و سواب داره و هر چیزی که اصل و اساسش شر هست همکاری و تعاون در اون هم چی دارد گناه دارد به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب شراب فرمود چندین نفر ملعون استند چندین نفر لعنت خدا بر اونها هست اون کسی که درست می کند، آن کسی که می فروشد، آن کسی که هم مالش را می اون کسی که می برد تا فلان جا کرایه می گیرد. یعنی تمام کسانی که بینایی هم کاری دارند، همه اینها چون تعاون دارند. در باب ریبا هم همچینی فرمودند. هر کسی که چکار کار می کند کمک میکند مساعدت میکند معاونت می کند خیلی از مردم امروز مسئله را میپرسن بعضی از صورت های وام هستند که علما فتوا نه دادند جایز نیستند صورت های ربوی از بانک هستند میگه درصدی کمتری دارد ما نمیگیریم خب اینا بفروشیم وقتی برای خودت جایز نیست برای دیگه هم جایز نیست میگه خب من نمیخوام بگیرم نمیخوام بفروشم اما یک بند خدای میگه من میخوام برای خودم تو که این امتیاز نمیدن نمی من برای خودم میگیرم شما بیا فقط برای من امضا بکن من میخوام از امتیاز شما استفاده بکنم خب این هم معاونت در چی هست در اسمت دیگه اون را کمک میکنی تو اون چیکار بکنه اون اینگونه آرا بکنن پس هر چیزی که اساسش خراب باشد تعاون در اون هم چی هست خراب است. تعمل في روحهم؟ خراب است لذا وتعاونوا على البر والتقوى شما هم ديگر را كمك كنید بر اساس النیکي و تقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هم ديگر را ياري نكونید بر گناه و تعدی واتقو الله این نسخه عمل اگر اینو داشت در وجودت به همه دستورات خدا عمل می‌کنی این الله شدید العقاب این نسخه تقوا اگر می خاید تقوا داشته باشی بدون که ان الله شدید العقاب حرمت علیکم المیت بعد از الله عز وجل محرمات را که فرمود الا ما یطل علیکم اول سوره خاندیم اون محرمات برای شما تلاوت میشه بقیه حلال اینا حرامن، اینا که حرامه خداوند بیان میفرماید حرمت علیکم المیتا حرام قرار داده شده بر شما میتا حیوانی که خودش میمیرد خود مرده و دم مراد از دم دم مصفوح است خون جاری اینم حرام است چون یک خون خون جاری هست و یک خون, خون جاری و دم مسفو همونی که وقتی حیوان را درست انسان زابح بکند همه ریزد. اما بخش از بدنش از گوشتش خون دارد اونا حرام نیست. اونا حرام هم نیست نجس و ناپاک هم نیست. خب ولحم لحم الخنزیر گوشت خنزیر گوشت خنزیر نه تنها گوشت خنزیر خود خنزیر نجس و لحین است. پوستش را کسی استفاده بکنه؟ بخش دیگری از بدنش را استفاده بکنه اما چونکه گوشت بیشتر مد نظر است و مقصود از گوشت را نام برد وما اوهلا لغیر الله به این را هم در بقره خاندید هم در مقدمه خاندید ما یعنی هر آن حیوانی و هر آن غیر حیوانی که اوهلا نام زد بشه نام بشه مسمى بشه لغیر الله به برای غیر خدا آن یعنی چون نام گزاری شده برای غیر خدا این حرام است چون اینجا شرک انجام گرفت باید برای خدا نام گزاری می شود گفت که این گزفند را برای رضای خدا می کشم این نقل و نبات را برای رضای خدا تقسیم میکنه ولی چون رضای غیر خدا را نام گرفت یک لیوان آب یک لیوان شربت برای نام غیر خدا نام شد حرامه و ما آن چی که نام گزاری بیشه آن لغیر الله برای غیر خدا آن و المن و اون حیوانی که ام او، حرمت علیکم المیتا الان چند صورت دارینا صورتهای میتا هست اون حیوانی که خفه میشه والموقوزتو اون حیوانی که ضربه میخوره در بعضی تفسیرها نوشته که مشرکین عادت داشتند یکی از رسوماتشون این بود که یک حیوانی را به نام خدایان خودش میزدند با چوب می زدن یا با سنگ می زدند می زدن تا می مرد. یعنی شکنجش می به نام خدایان اون که می مرد بعدا اون گوشتی اون را بهترین گوشت می دانستند و می لذا حیوانی که ضربه خورده با سنگ یا با چوب و مرده اینم حرام است و المتردیتو حیوانی که از بالا افتاده متردیه اینی که از بالا به پایین می افته. مثلا از سریکوه میافته داخل دره یا اثر زمین میفته داخل چه خلاص افتاده مرده این هم حرام است و النطیحه و اون حیوانی که شاخ زده میشه یعنی حیوانی دیگه او با شاخ میزند و میمیرد ضربه می شاخ میخورد و ما اکل سبع و هر آنچه که اکل سبع در رنده او را می خورد یا همین حیوان شکاری ما ذکیتم در رنده می خورد شکاری نه شکاری وقتی که بخورد او را که درست نمی شهرم بس شکار بعد از این در همین رکومی خانیم در رنده می خورد بعد شما می از دهن در رنده می گیریدین حیوان را گرگ در می خورد وقتی رفتی گسفه مرده دیگه این حرام است اما الا ما ذكيتم مگر آن که شما چی کنید اون را زبح بکنید یعنی زبحش بکنید حلال میشه خب الا ما ذکیتم استثناء از کجاست همه علما میگویند الا ما ذکیتم استثناء از ول منخنقه است خوب توجه کنید حیوان داره خفه میشه شما قبل از اینکه بمیره چیش میکنید ذبحش میکنید الموقوزک حیوان ضربه خورده داره جان میده سنگ بهش خورده شما ذبحش میکنید المتردی از سر کو افتاده یا تو افتاده قبل از اینکه بمیره در دست و پا میزنه شما ذبحش میکنید اونی که شاه خورده دست میزنه شما ذبح میکنید اونی که گرگ خورده هنوز زنده است شما ذبحش میکنید اینا حلال هستند این نیست بز میگم ما اوهل لغیر هم چیه جز ایلا ما زکیتم هست هر ما لغیر الله رذب میکنند. اگر از ما اوحل لغیر الله می خواهی استثناء بکنی یک یکی اون طرف تر برو ولحم الخنزیر هم بگو ولحم الخنزیر ایلا ما زکیتم نا ایلا ما زکیتم استثنائش همه علما فرمودند که از کجا بر می گردد؟ و المُنخنقه. ببیند که لَمَّا اندلسینیشته. قال علی علی بن ابی طالب رضی الله عنه. قال علی وابن عباس والحسن الحسن و قتاده و الله بن عمر والضحاق وابن ابن زید والجمهور. هو راجع الى المذكورات ای من قوله و المُنخنقه. از کجا؟ از؟ و المنخنقه از و المنخنقه بعد این حیوانات را که شما زبح کردید حلالا برای شما و مازو بحالا نصب و همچنین حرام است اون حیوانی که بر نصب نصب میگویند گویند نمادهای شرک و اهل شرک را می نصب یعنی یک نمادی که اون قائم شده نصب شده برای عبادت غیر الله مثلا کسی از اولیاء خدا اونجا قدم را گذاشته الان مردم اونجا یک اثری هست او را چی می کنند سجده می کنند خب این نمادی شرک شد دیگه سجدهش می کنند الان اونجا ببری حیوان را بکشی یا مثلا جای سلیبی هست مردم می را عبادت می کنند در چنین نمادهای ولو اینکه شما اونجا میرید چیکار کار می کنید بسم اللہ اللہ اکبر بگوید اما که بر یکی از نمادهای شرکیه کشته شده فرق نمی کنے اونجایی که غیرالله عبادت میشه شه چه بودکدهی هست بودخانهی هست چه محلی هست برای صلیب؟ چه محلی هست که مردم خرافاتی اونجا شرک می کنند غیر را سجده می کنند قبری هست مثلا اونجا مردم شب روز سجده می کنند خب اونجا میبره و این حیوان را میکنه برای تقرب اون کسی کجا خفته لذا این حرام هست و ما ذبحه علی النسب ولو اینکه نام خدا بر او گفته بشه و ان بالازلام و اهم این هم حرام است که شما طلب قسمت بکنید با تیرها ببینید انتستقسی موبیل اسلام چیه این دو سیرت داره یکی این هست که این هم اشاره به گوشت هست گوشت ها را چکار می کردند چند نفر شریک می شدند و یک شطور با هم می خریدند ده نفر بعد این گوشت ها را لا علی سویه بدون برابری یک سه را می گذاشتند کیلو یک سهمی دیگه پنج کیلو یک سهمی دیگه ده کیلو مختلف میگذاشتن دیگه شانسیه بعض اونجا تیرهایی بود اسلام، تیرها رو میگن تیرهایی بود به اسطلاح که به وسیله اونها قرکشی می کردند لذا یکی قرش ده کیلو در می آمد یکی قرش 20 کیلو در می آمد این دو اشکال داری یکی که قمار هست بردبخت هست شما پول مثلا ده کیلو را دادید الان پنج کیلو بهتون رسید یا 20 کیلو بهتون رسید خب بالاخره شما باختید دیگه یا بردید یکی اینکه حرام است از این جهت یکی اینکه اعتقاد داشتند که اینهایی که اینجا هستند و از این از طریق این خدایان سهم ما به ما میرسد در این خیر و برکت هست چون این خدایان علم غیب دارن نف میرسانند زرر میرسانند لیسا اینکه به من بده نفع من و اولاد و دنیا و آخرت من در اینه پس از این جهت شرک میشد پس این انتستقسیم و بالازرام دو تا عیب و اشکال داشت یکی قمار یکی دیگه چی؟ شرک یک صورت تقسیم و بالازلام اینه یک صورت دیگر تقسیم بالازلام به وسیله تیرها بعضی وقتا مردم میرفتند کاری که اراده داشتند کاری که میخواستند بکنند از طریق اون خدایان از اونها مشوره میگرفتند از اونها گویا استخاره می گرفتند. که این کار را بکنیم یا نکنیم اونجا تیرهایی بود روی اون تیرها نوشته بود افعال یا لا تفعال این کار را انجام بده این کار را انجام نده چون معتقد بودن اینها علم غیب دارند اینها آینده مرا میدونند اینها نف و ضرر من را تشخیص میدونند این کفر دیگه شرکه صفتی که مال خدا است این صفت را به غیر خدا دادن و بر اساس اون از اون استخاره گرفتن مشور گرفتن لذا خداوند از زوجل اینها را همه حرام میداند اما صورت اول ترجیح دارد چون که بحث بحث گوشت هست گوشت را میگرفتن و معتقد بودن برکاتی تو این گوشت هست اما در کنار این بحث من یه پرانتزی را باز بکنم خدمت شما که ما هم وقتی میخواهیم کاری را انجام بدیم از کی خبر بگیریم از کی خیر بخواهیم اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نماز استخاره را آموزش دادند که هر وقتی که شما میخواید کاری انجام بدی میخواید به این سفر بری یا نری این معامله بزرگ را انجام بدی یا انجام ندی این ازدواج را بکنی یا نکنی لذا در چنین مواقع از خداوند که هم نافع و دار خداست هم عالم الغیب غیب خداست از خداوند خیر بگیر از خداوند طلب خیر بکن. لذا نماز بخیر خدا را عبادت کن اول. بعد از اون بگو اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسئلک من فضلك العظیم تا آخر دعای استخاره. که معنیش اینکه که خدایا من این خیر را از روی از علم تو می‌خاهم. تو می‌دانی. فانک تعلم ولا اعلم. تو می‌دانی من نمی‌دونم. تو خبر داری من خبر ندارم. تو از آینده میدونی من نمیدونم خدای اگر این کار خیر است برای ما مقدرش بکن پس ببین استخاره را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مشروع فرمودند اما بعضی از مردم هستند که هنوز هنوز بر بعضی از جاهلیت های گذشته هستند بعضی میخوان کاری بکنه فال میگیرند این فال گرفتن چه از پرنده باشه الان بعضی پرنده ها هستن چیزای نوشتن اونا می نیستن این اعتقاد داشتن و باور داشتن و او را نافع و تشخیص دادن این چی هست همون حکم را دارد یا بعضی ها از کاهن جنی کسی که اخبار میده میره میگه می که تو برای من الان اسمش را هم استخاره میذاره میگه تو برای من استخاره بکن که انکار خوب است یا نیست. او از طریق جنات و گویا داره از طریق غیب خبر میده. اینها تمام خرافاته، تمام ناجائز هست. لذا تنها راهی که برای من هست، برای ما هست، همون راییه استخراج است. بعضی از قرآن فال میگیرند. این هم سببی ندارد. میگویند که فال گیریم باز قرآن را باز میکنه ببینه بی چه ای هست مثلا آیه رحمت هست میگه این کار را انجام بده اگر آیه عذاب است میگه این کار را انجام نده با توجه به ترجمه و به محتوای این ثابت نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام ندادند لذا ما وقتی که می خايم کاری انجام بدیم می بدونیم کار ما خیر هست یا نیست فقط و فقط راه سنت و روش سنت چیه نماز و دعای استخاره هست غیر از این دیگه صورتی نیست لذا الله می فرماید ذالکم فسق این فسق هست حرام است اینا چی هست همه حرام هستن، لذا خدا می فرماید ای بندگان من الان حلال و حرام برای شما بیان شد حلال وحرام حرام همه واضح و روشن است اليوم يا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون امروز ناوميد هستن کساني كفر کردن از دين شما پس از آنان نترسید از من بترسید از من بترسید هرچی من گفتم حرام ونرح رام بدان هرتي من قفتم حلال ونرح حلال بدان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي امروز من تكميل کردم برأي شما دين شمارا وأتممت عليكم نعمتي وتمام کردم برشما نعمتي خود امراء ورضيت لكم الإسلام دينا و راضی شدم برای شما پسندیدم برای شما اسلام را به عنوان دین ببین این آیه تکمیل دین است هر کسی که که تأثب را کنار بذاره و قرآن کریم را اصلا بدون تفسیر فقط ترجمه بلد باشه می دونی که مفهوم این آیه چی هست این آیه در سوره مبارکه معایده هست سورہ مبارکی مائده درباره چیست؟ درباره حلال و حرام است. اون چیزی که برای شما حلال هستن و اون چیزی که برای شما حرام هستن بسیار امور تابحال برای شما مشتبه بودن لذا خداوند تعالی در این سوره به تفصیل بیان کرد به تفصیل بیان کرد که اینا حلال اینا حرام این انجام بده، اینا انجام نده بعد از این که محللات و محرمات تمام شد و ادامه هنوز می آید بعضی از صورتهای حلال بعضی های حرام حال خدا می فرمد دین را کامل کردم دین را کامل کردم یعنی احکام را کامل کردم این چه نسبتی دارد با خلافت که بعضی می گویند که این درباره خلافت سیدن علی هیچ مناسبتی ندارد آیه سیاقش سباقش ما قبلش ما بعدش آیه کوچکترین اشاره بینجا شده؟ شما خودتون آیه را بخونید موضوع آیه اون نیست هیچ کسی از صحابه بر اون آیه حمل نکرد هیچ کسی از مخاطبین اولین قرآن مجید حتی خود سیدنا علی رضی الله تعالی او هیچ روایت صحیحی از ایشون نیست که ایشون آیه را بچینی چیز حمل کرده باشند لذا الله عزوجل در این آیه درباره چی بحث می فرماید درباره حلال و حرام ببینید همین آیه نه اینکه این آیه تمام شده آیه تکمیل دین در پایان همین آیه میگه خداوند فمنتر رفی مخمستین کسی مجبور بشه در مخمسه در مخمسه یعنی چه؟ یعنی مجبور بشه مخ... حالت گرسنگی فوقراده داشته باشه که خطر جانش هست غیر متجانفل اسم نه اینکه تمایلی به گناه داشته باشه هیچ نه تمایل به گناه نداره ولی میخواد که چیکار بکنه مجبور هست چون دارم جان میده می میره مزتر هست خب او میتونه به اندازه نیاز از این محرمات بخوره فانا الله غفور رحیم همان خداوند عزوجل بخشاینده و, بخشایند و مهربان هست بس ببینید این درباره چی بود حلال و حرام یسالونك ماذا احل لهم هل بعضهم از اون چیزی که برای شما حلال هستند الله تعالی می فرماید قل احل لكم الطيبات ای پیامبر به آنها اعلام کن که برای شما طیبات حلال هستند طیبات یعنی اموال پاکیزه اموال پاکیزه یعنی اون اموالی که سلیم و فترت سلیمه از اونها نفرت ندارد. اونا حلال هستن قبلا من رابط بحثي در این رابطه بحثی خدمت شما عرض کردم که اصل در اشاء حلت است. اصل در اشیاتی هست حلت است مگر اینکه حرمتش بیان بشه. هر چیزی که حرمتش بیان نشده و بعدا فترت سلیمه و اقل سلیم او را اون حلال است ولی متاسفانه فطرت انسانها غیر مسلمانها به دلیل فساد زیاد چی شده اصلا عوض شده مثلا فطرت ها اینقدر خراب شده که بسیاری هستند گوشت درندگان در را مثل گوشت سگ و گربه را با لذت هم میخورند لذا این دیگه فطرت خراب شده. به این خاطر الله عزّاؤه جلّ می‌فرماید که اون که طیبات باشند، پاک باشند نجس نباشند. اونها برای شما حلال هستند و چیرین برای شما حلالن ما علمتوم من الجوارح. اون چیزی که شما تعلیم میدید، شکارهايی که شکار میره شکار میکنه، زخمی میکنه. جوارح جمع جارحه هست جارحه به معنی زخم کننده البته جارحه دو معنا دارد هم زخم کننده هم کسب کننده حیوان رو شما می فرستید سگ شکاری را می فرستید که بیر شکار بکنه شکار را برای شما بگیرد وقتی که اون میره شکار را میگیرد، این شکار برای شما حلال میشه در صورتی که چهار شرط اونجا باشه یکی اینکه مکلبین شما اون را آموزش بدید آموزش بدید که چکار بکند شکار را برای شما بگیرد. یکی از علائم آموزش اینه که او خود از, از سر خود به طرف شکار نره شما وقتی که او را میفرستید میره وقتی که اون را چیکار میکنید دوباره او را میخواهید برمیگردید یکی از علائم آموزش اینه که وقتی میگه برو میره وقتی که میگه برگرد او برمیگرده این لذا معلوم میشه که دور دیده هست آموزش دیده هست تعلمونهن مما علمكم الله انهرا همونطور که خدا به شما یاد داده تعلیم ده شما اونها را تعلیم ده یعنی بر اساس دستور خدا شرط اول آموزش بود شرط دوم فرستادنش هست شرط سوم اون گوشت را برای شما بذارد اون حیوان را برای شما بذارد یعنی خودش نخورد اگر خودش خورد معلوم میشه که آموزش دیده نیست فكلوا مما امسكنا عليكم بخورید از که نگاه داشت برای شما یعنی اگر نگاه داشت بخورید و شرط چارم و اذكر الله نام خدا را بر اون بگیری یعنی وقتی می فرستی با بسم الله الله اکبر همین ارسال شما جایگزین ذبح هست جایگزین گویا بریدن حلقش هست لذا بسم الله الله اکبر بگو این شرط ها را که داشت شما میتونید که حیوان را بفرستید برای شکار، شکار را اون وقت مصرف کنید و تقوا الله، بعض هم اینجا هم تقوا را پیش بگیرید خیلی از مردم هستند که میرن دنبال شکار، زحمت میکشند، کوشش میکنن، بعدن با چه مشکلاتی، با چه مکافاتی شکار بگیریش میاد. اما شکار شرایط حلت را ندارد الان دیگه اینجا چکار میکنن چشمشون را میبند مثلا شکار را زده از کوه افتاده از کوه که بیفته بمیرد دیگه اون برای شما حلال نمیشه لذایم دیده میگیر این چیز را نه وابتق الله یا مثلا حیوان میره اون را زخمی نمیکنه خفش میکنه زخم که نکنه خونش که نریزه برای شما حلال نمیشه پس این را بعضی نادیده می گیرن به از خدا ان الله سریول الْحِسَمْ نُسْخِهِ قَوَاسِ خدا زود حساب می گیره بعد از این که خداوند ماكولات حلال را اعلام فرمودن و ماكولات حرام را الله می فرمد اليوم احل لكم الطیبات امروز حلال است برای شما مال های پاکیزه و طعام الذين الكتاب حل لكم و طعام كسانك کتاب داده شدند حلالا برای شما یعنی زبیه اهل کتاب یهود نصرا. هناك معتقد بكتاب حسن وطعامكم حل لهم وطعام شما هم براي انها انام الزبيه شما مي خورانت وهم شنين زنهاي انها رأي يعني دختراء انها رأي دختر اهل كتاب دختر كتابي والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هم برای شما حلال است زن پاک دامن حره عفیفه که مؤمن باشه مسلمان باشد نکاح او هم درست است والمحسنات من الذين اوت الكتاب من قبلكم زنهای پاک دامنی که از اهل کتاب باشه که کتاب داده شدن قبل از شما کتاب داده شدن قبل از شما مثل یهودی ها نصرانی ها که کتاب قبل از شما اینها چیه تورات و انجیل است خب بشرطی که اذا آتی اجورهن نه وقتی که مهر اونها را دادید محسنین هدف شما احسان و پاک دامنی هست غیر مصافه‌ای نه هدف شما شهواترانی نیست شهواترانی که باشه هدف فقط برای یک ساعت برای یک شب برای یک روز پس نیجر هدف شهواترانیه شهواترانی نباید پاک دامن میخوای پاپا پاکی زندگی بکنی همسر حلال داشته باشی اون وقت این جائز هست ولای متخزي اخدان و به عنوان دوست اونها رو نگیرید که از آیات و نیازی شد سوی اونها برید این حرمت تمام این صورت هایی که امروز دوست دختر و دوست پسر و اینها حرمتشون سراحتن از قرآن از این آیه ولا متخصی اخدان حرمتشون ثابت میشه. لذا این صورت ها برای شما حلال هستم. خب یکی زبیه اهل کتاب، یکی نکاح کردن با دختر اهل کتاب. اما برعکس نیست ببینید در باب ذبیحه برعکسش را هم فرمود ذبیحه اونها برای شما حلال ذبیحه شما برای اونها حلال اما در باب نکاح کردن نکاح کردن دختر اونها برای شما حلال نکاح کردن اونها دختر شما را این نفرمود این حلال نیست یعنی کسی نمیتونه دختر خودش را به یک یهودی بده یا به یک مسیحی بده اما خودش اگر بخواد میتونه از اونها بگیره چرا دلیلش چیه به دلیل اینکه عموما زن تابعه مرد هست زن تابعه مرد هست الان کار ندارین که متاسفانه امروزه شرایط دنیا طوری شده که بیشتر مطبوع زن هست و تابعه مرد حال وقتی که چون خداوند از زواجل به مرد مدیریت داده به مرد قدرت داده زن بیشتر از مرد متاثر میشه تا اینکه مرد از زن متاثر میشه. لذا وقتی که شما مسلمان هستید زن کتابی بگیرید بعید نیست که اون زن بالاخره تابه شوهر بیشه در هر چیز تابه شوهر است دنبال روی شوهر هست در دین و ایمان فردا مسلمان میشه. اما وقتی که دختر مسلمان را به کتابی بیدید این،, این زن هم تابعو میشه فردا این زن مسلمان این دختر مسلمان میره چی میشه؟ یهودی میشه میره مسیحی میشه لذا این نوع ارتداد هست یعنی مسلمانان را تحویل کفر و دین کفر دادن هست به این خاطر دختر مسلمان را جایز نیست که به عقد یهودی در بیارم به بی عقد مسیح اما برعکس کسی بکند این جایز است اما یهودی و مسیحی که بر کتاب خودش پایبند است مقید هست یهودیان و مسیحیان امروز بازم دونو هستند در این کشورهای اروپایی در کشورهای آمریکایی، الان صحبت اینجاست که آیا کسی یک مسلمانی یک جوانی میتونه بره زن اروپایی بگیره میتونه بره یک زن آمریکایی را عقد بکند ببینید اگر تقید دارند یعنی مذهبی هستند پایبند کتاب خودشون هستند بله چون کسی که مذهبی باشد اون افت را حفظ میکند او با همین یک مرد رابطه خواهد داشت بیشتر با یک مرد رابطه نه چون کتابش همون دین خودش او چی می وادار میکنه اما اکثری کسانی که بنابرا تحقیق علماء اکثری کسانی که امروز در دیار اروپا هستند امریکا هستند اینها تقیدی ندارند اینا بلا نسبت مثل حیوان هر روزی هر شبی هر ساعتی با یکی هستند و چنان بی‌حیایی هست که زن چون قانون اونها هم داره به همین سمت داره میره که زن شوهر داره ولی شوهر جرئت نمی کنی چیزیش بگه میره با کسی دیگه رابطه برقرار میکنه پس این به کتاب خودش تقید نداره این پایبند کتاب خودش نیست بنا بر این اگر اهل کتاب اهل کتاب امروزی حتی اروپایی امروزی امریکایی امروزی اگر پایبند همون دین خودش است مقید به اون دین هست خب نکاحش درسته اما متاسفانه اکثرا نیستند لذا با توجه به این عموم و اکثریت که نیستند نکاح اینها چی داره مشکل داره مگر اینکه انسان تحقیق بکنه ببینه نه این فرد مستثناست این از اون مذهبیونشون هست لذا خداوند عز و جل میفرماید وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ بحث اینه که اگر کسی ازدواج بکنه آیا خطر این نیست که دین خودش را رها بکنه دین همون زن را بگیره مهاجر امی قیز بشه این را خدای عز و جل وعید می فرماید هر کسی که به ایمان کفر بکند بعد از این که خدا ایمان بهش داده فقط حبث عملو عمل و تمام اعمالی که در دنیا انجام داده این اعمال زایه میشه از دستش میره و هو فی آخرت من الخاسرین این انسان در آخرت جزی چی هست؟ زیانکاران هست بزرگترین زرر و زیان را میکند یعنی برای ابد در جهنم خدا در عذاب خدا گرفتار میشه یعنی اشاره به این هست که خدا تعالی برای شما یک راهی باز کرده نیازی یا ضرورت یا اس انسان سر در اون کشورها هست اونجا بالاخره کارخانه داره اونجا شغل داره نیاز میشه با یک زن اهل کتاب ازدواج بکنه ولی مبادا از دینت فاصله بگیری که اگر دینت فاصله گرفتی در این دنیا هم بدبخت میشه هر چی که داری از دست میری در آخر میدهی و در آخرت هم از خاسرین هستی از کفار کہ برای ابدال آباد در جهنم من سوزان خائبود يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا جوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي تطهيركم وليتمم نعمته وليتمم نعمته عليكم لعلكم تشكرون دار اياتي احکامی در دار رتبا حلال و حرام بود مأکولات حلال و حرام و در آیاتی که میخانیم آیاتی که تلاوت گردید در اشتباط با امر مصلح بود یعنی نماز گاه گاهی در لابلائی احکام امور انتظامیه یا معاملات و احکام مختلف امور مصلحه ذکر می شوند که امور مصلحه انجام آنها معاون هست و هست تقویت کننده هست برای بجا آوری احکام برای اجرای امور دیگر لذا الله تعالی در اینجا مؤمنین را خطاب می‌فرماد یا ایاول‌الذین آمنو، اذا قمتم الى الصلاة وقتی شما برخاستید بر سوی نماز بلند شدید برای نماز و اراده نماز کردید فغسل وجوه کم و ایدیا کم خداوند عزّ و جل مفتاح صلات را مفتاح نماز را که تهور هست و پاکی هست بیان می‌فرماید فرماید فاغسلو وجوهکم و ایدیهکم پاکی و تحارت و بزو چهار چیز دارد چهار رکن دارد و چهار تفعرض دارد اول انکه بشورید شما چهریتون را و ایدیهکم و دست‌هایتون را الى المرافق تا آرنجها یعنی چهره و دست با آرنج اینها دوتا از ارکان هستند دوتا از فرائز وضوح هستند و سوام ومسحو برؤوسکم مسح کنید شما سرهایتان را و ارجو لکم الى با توجه اینکه قراءت, قراءت ارجو لکم هست فتح هست کسانی که با قواعد زبان عربی آشنا هستند عطف ارجو بر رؤوسکم دیگه درست در نمیاد چون رؤوسکم مجرور هست و ارجو لکم مفتوح هست لذا بر وجوهکم هست فقسل وجوهکم و ارجو لکم بشورید چهرهاتون را و همچنین پاهایتان را الى الكعبین تا شتالنگ کعب شتالنگ و برامدگی پا را میگن که از دو طرف هست خب وقتی که اتفاس بر وجوهکم چرا قبل از ومسحو این را ذکر نکردن اینجور بود معنا بهتر می شد فاقسلو وجوهکم و ایدیهکم و ایدیه کم الى المرافق و ارجو لکم الى الكعبین بعدم می فرمود وام صحب بخاطر ترتیب هست ترتیب به همین شکل که اول چهره هست بعدم دست ها تا آرنج هستن بعدم مسح سر و یک قراعت دیگری هم هست و ارجو لکم الى اون قرأت هم معروف هست و ارجولی خب بعضی میگن وقتی که ارجولی باشد، اون وقت اطفش بر رؤوسکم کم هست پاهام مسه. اولن که و ارجولی اگر اون قرأت را لحاظ کنیم، مد نظر بگیریم، اون وقت به خاطر جوار هست، به خاطر همسایگی هست. چون که در کنار رؤوسکم قرار گرفته. لذا این را میگن جر جوار به خاطر همه هنگ بودن و همه هنگ خاندن به کم و ارجول کم میشه و دوم بعضی میگن که اون قرارت در صورت مسح خف است مسح موزه هست خب اما این که برای شستن چرا تأکید هست و چرا این را میخوایم عطف بکنیم بر وجوهکم اولا چونکه ادفست دوم در سنت حضرت رسول صلی الله عليه وسلم تأکید بسیار زیادی برای شستن پاها شده از سنت متواتره هم شستن پا ثابت است و تأکید زیادی شده و وعید آمده برای اون کسی که یک بخش کوچکی کی از پایش خشک بماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ویل للاعقاب من النار کسی آمد پا را شسته بود و این پشت پا کوزه پا مقدار خشک مانده بود فرمود ویل للاعقاب من النار و در دروات اس ویل للعراقيب من النار یعنی اون عقیبی اون کوزه پا و اون پشت پا که خشک بشه آن حضرت وعید ویل بیان فرمود که ویل و وعیدش چی هست؟ آتش اس. یعنی این کسی که جوی می کند و پایش را نمی شوید و یک مقدار پایش خوشک می میشه، لذا برای اون چنین وعیدی و کلمات تند و سختی بکار بردند و در هر روایتی که درباره بار هست هم خود آن حضرت صل الله عليه وسلم هم صحابه در هیچ روایتی نیست که ان حضرت کرده باشد در تمام روايتها غسل است، بس هم غسل هست و هم تأکید به غسل هست و هم وعید برای کسی که بخشی از پایش خشک بماند با توجه به این لذا شک در این نداریم که ارجول کم بر وجوه کم و این کنتم جنبا فطهرو اما اگر این جنابت حدث شما حدث اصغر نبود حدث اکبر بود بیوزویی اصغر نبود اکبر بود یعنی جنابت بود اون وقت فتح رو خوب پاک بکنید منظور به این چهار عضو اکتفا نکنید تمام بدن را بشورید و تا جایی که امکان هست در بدن آب را برسانید تحارت تحاصل بکنید وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد خدواندي عز وجل بعد وزوغ رفتا وغسل كاردان كهر دوتا طهارت حسن طهارت أز حدث أصغر وأز حدث أكبر حس بعد ذلك رب سبحانه وتعالى مشروعیت تیمم و شرائط جواز تیمم را بیان می فرماید. چند صورت هستن که جایگزین وضوح و غسل که تیمم باشد تیمم را مشروع می کند اول و این کنتم مرد اگر شما مریض بودید در صورتی که آب را نمیتونه استفاده بکنه و آب استفاده کردن آب یا خطر جانی برای انسان دارد یا خطر تلف عضو دارد یا خطر ازدیاد مرز دارد که اگر استفاده بکنه بیشتر مریض میشه لذا در این صورت گنجایش تیمم هست یک صورت او علا سفرین یا در سفر بودید در سفر بودید ببینید برای مشروعیت تیمم سفر لازم نیست بی آب بودن لازم هست اما بالا سفر فرموده و فلم تجدیدومان آخر میخانید چون عموما در هزار آب میسر در شهر و روستا آب میسر هست مخزن آب هست چاه آب هست قنات هست چشمه هست و س... گاهی که میسر نباشه در سفر میسر نمی... نمیشه اما اگر در هزار و در شهر آب مویسر نبود، هم حکمش همینه که انسان میتونه تیمم بگیر وقتی که آب بارش نبود. او جا عحدم منکم من الغایت که بعضی گفتن او علا سفر او معنی واو است. یعنی مطلق سفر تیمم را مشروع نمی کند، بلکه سفر باشی و بیوزو بشی سفر بودی وجا احد منکن من الغایت کسی از شما از قضای حاجت آمد از, از شوی آمد اولا مستم نسا یا مست زن کردی دست دس زدید به زن که قبلا ارز کردم بسیاری از فقه ها بمعنی مست حقیقی گرفتند احناف میگم مرات مجامعت و همخوابی هست همه این حدث ها پیش آمد چه حدث اصغر چه حدث اکبر بیوزو شدید به خاطر اینکه قضای حاجت داشتید رفتید و ورگشتید بیوضوع شدید به خاطر اینکه دست زدید زنها را یا همخوابی داشتید فلم تجدو ما در تمام این صورت ها نیافتید آب شرط صحیحت مهم ادم وجود آب هست یا آب استفاده کردن با توجب مریضی سبب مشکلات در جسم انسان میشه اون وقف تیممو صعیدن طیبن پس قصد کنید آب پاک صعید میگیند که خاک را خاکی که سطح زمین و سر زمین باشه سطح ارد را که خاکش چی باشه پاک باشه فمسحو بوجوه کم و عیدیکم من برای تیمم همین دو رکن هست یکی شس... آ... مسکردن چهره و دوم دو مسکردن دستها ها مسکردن چهره تون را و دست های تون را زم لذا این جایگزین قسل جایگزین وضوح هست هم جایگزین وضوح همین تیمم هست هم جایگزین قسل همین تیمم هست حال حکمت مشروعیت تیمم خدا تعالی چرا تیمم را جائز قرار داد چرا تیمم را برای شما مشروع فرمود اللہ تعالی حکمت را بیان می فرمد چون خدا تعالی نمی شما در حرج باشید خدا لطف دار بر شما هم در حرج و در سختی نباشید و هم می که شما پاک زندگی کنید در هر صورت پاک باشید طهارت داشته باشید لذا الله تعالی به این دلیل تیموم را برای شما مشروع فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله اراده ندارد قرار بده بر شما هیچنو حرجی هیچ تنگ تنگی نای و لاکی یرید لیطهرکم اما الله میخواد تا پاک بگردان شمارا یعنی با پاکی زندگی کنید و لیتم منعمته علیکم تاکنی نعمت خودش را بر شما تکمیل کند لعل تشکرون ترغیب شکری تا کی شما شاکر باشید تا کی شما شکر گزاره نعمت پروردگار باشید این تسهیلات را این آسانی را الله تعالی بر شما گذاشته تا شما بندی شکوری باشید وذکر نعمت الله علیکم خب این امر مصلح بود. خداوند می فرماید برای نماز که بلند میشید طهارت و وضو بگیرید اما حال مزامین گذشته موضوعات سابقه که اول سوره چی بود یا ایها آمن و اوفوا بالعقود لذا این متعلق به اول سوره هست که شما بندگان به عهد و تعهدی که با خدا دارید به اون عهد و تعهد پایبند باشید اما قبل از پایبندی به اون عهد و تعهدات خود خداوند نعمت خودش را بر شما یادآوری می فرماید همیشه ذکر نعمت و یادآوری نعمت باعث اشتیاق بیشتر میشه در انجام تعات بندگی در اینکه انسان به پیمان های خودش عمل کنه چون الانسان و عبید و الاحسان انسان همیشه بنده احسان هست وقتی که احسان یادآوری میشه این یادآوری احسان انسان را بیشتر آماده میکند تا از خدای تعالی حرف شنوی داشته باشد به این خاطر الله میفرما وذکر نعمت الله علیکم مراد از نعمتها بسیاری از علما میفهمند نعمت اسلام هست نعمت دین هست و بعضی میگن مطلق نعمت چه نعمت اسلام و دین نعمت های معنوی چه نعمت های مادی و ظاهری همه نعمت ها شامل میشه و ذکرو نعمت الله علیکم یاد کنی نعمت الله را که بر شماست و ميثاقه اللذی واثقكم به و میساقی پروردگار آن میساقی که واسقكم به محکم از شما گرفته آن را آن میساق را خداوند با شما میساق بسته و شما گویا با خدا عهد بستید بر آن میساق که بر آن پایبند باشید مراد از میساق چیه؟ اقوال مختلفی هست بعضی میگن مراد از میساق میساقی که همه ما در الست داشتیم در عالم ارواح که خداوند فرمود الستو بر ربکم؟ قالو بله. اون میساق مراد است. بسیار میگویند که منظور از این میساق اون بیعتی هست که بعضی از صحابه به خصوص انصار آمدهاند و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در منا قبل از هجرت بیعت کردند و پایبندی خودشون را به تمام تعهدات عمل کردند بسیار معتقدن که میساق اون میساقی است که با قبول کردن اسلام متوجه ما شده وقتی که ما میگیم لا اله الا الله و قبول داریم الله عز و جل رب معبودیت و الوهیت و تمام معبودان دیگر را نفی میکنیم این لا اله الا این یک میساقی هست یک تعهدی هست برای ما تعهدی ایجاد می کند چکویم مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا اله را یا مقتضای لا اله را اون چیزی که لا اله از من تقاضا می کند و از من انتظار دارد گویم لا اله الا الله گفتن اسلام آوردن و ایمان آوردن یک نو میساقی است با خدا اذا الله می فرمات وذکروا نعمت الله علیکم یاد کنید نعمت الله را شماست بے ساقی او می ساقی کی بر شما است ومیثاقه الذی واثقکم به ومساق میثاقی که با خدا داشتید ان میثاقی که الله ان میثاق را داشت به شما بست به شما اذ قلتم سمعنا واطعنا زمانی کی شما گفتی به وقت التزام به وقت پیمان بستن سمعنا و اطعنا یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم هرچی خدا بگه شنیدیم اطاعت میکنیم لذا امی ساقرا شما پایبند باشید و الله این ترغیب بسوی اخلاص همست از خدا بترسید یعنی فقط برای خدا باشید هر چی میکنید برای خدا بکنید ان الله علیم ذات الصدور این علت است چون خداوند راز سینه‌ها میداند از درون شما خبر دارد از خلوص شما خبر دارد پس خدا تعالی را پروا داشته باشید بترسید یا ایها الذين امنوا کوون قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا میساق الهی شامل همه دستورات میشه شامل همه فرامین پروردگار میشه چه مربوط به حقوق الله باشد طاعت باشد عبادت باشد چه مربوط به حقوق بندگان باشه خداوند تعالی در همه زمینها هم در زمین عبادت هم در زمین معاملات هم در زمین حقوق حقوق بندگان خودش در همه زمینها برای ما دستوری دارد برای ما فرمانی دارد و لا اله الا اللہ گفتن ما تعهدی برای ما ایجاد کرده که نسبت به همه حقوق پایبند باشیم حتی دشمنان ما که مشرکان باشند نسبت به اونها هم باید تقوا را رعایت کنیم عدالت را رعایت کنیم نسبت به اونها هم نباید ظلم بشه مثلا با اونها اگر پیمانی هست اگر تعهدی هست باید به با پیمان ما پایبند باشیم ما شکننده پیمان نباشیم ما قدر نکنیم ما بالاخره وفا به با عهد داشته باشیم لذا الله بر اساس این می فرمایا ایو الذین امنوا کو قوامین ای مؤمنان شما قائم کنندگان باشید قائم کنندگان حقوق الله کو نو قوامین لله بر پا کنندگان و قائم کنندگان باشید برای خدا به خاطر خدا شهدا بالقسط و گواهان عدل و عدالت باشید عدل و انصاف باشید مفسرین میگن کونو قوامین لله اشاره به حقوق الله است شهدا بالقسط اشاره به حقوق العباد است یعنی در باره حقوق الله عزوجل قائم کنندگان باشید برپا کنندگان باشید همه دستورات خدا را قائم کنید، بجوابی آورید. یعنی ابدادتر. شهدا عبِل قصد در باب عدل و ادالت و انصاف جواه باشید، یعنی مجریان ادالت باشید. ولا يجري منكم شناان قوم على الله تعديل و بغض قومي عذابات مخالفت با شما شمارا مجبور نکند تحریک نکند بر نینگیزد ولی ازرمن نکم بر انگیخت نکند شما را شنعان و قومین بغض قومی و دشمنی با قومی علی الله تعدلو بر اینکه شما عدالت نکنید در همه مسائل در معاملات در پیمان هایی که با آنها دارید در عهدهای که با اونها بستید اعدلو بلکه حتما حتما شما عادل کنید عادل باشید با انصاف باشید هو اقرب للتقوی ببینید این عدل حتی بر علیه قومی هست که با او بغض دارید و کی بغض دارید با کفار این عدالت به تقوا نزدیکتر است به خدا ترسی نزدیکتر است بندگان خدا ترس اونها عادلند و خدا نا ترس ظالمند ان الله خبیر بما تعملون این نسخه تقوا است نسخه عدل بود و تقوا هر کسی که خدا ترس باشد او ظلم کند اینهایی که در دنیا ظلم می‌کنند چه عامه مردم چه حاکمان اینها از خدا نمی ترسند ذره از استقوا در وجودشان نیست لذا نسخه تقوا و نسخه ایجاد خدا ترسی در درون چیه؟ ان الله به ما تعملون بدون شک خداوند خبر دارد به اونچه که شما عمل میکنید به اعمال شما الله تعالی واقف و با خبر از مطلع است پس وقتی که خداوند از اعمال با خبر است هم ظاهر را می خبر دارد از ظاهر اعمال هم از باطن هم از خلوت شما هم از جلوت شما پس شما تقوار پیشه بگیرید از خدا بترسید و هیچ حقی را تلف نکنید و اینجا بشارت است برای کسانی که پایبندند و تعهد دارند وعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات الله وعد فرموده با آنان کیمان آورد و عمل صالح انجام دادن لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرت و عظیم بر آنها مغفرت واقشیش و اجر عظیم پاداش بی صیادیادی است اما بر اگر تهود من لکد والذين کرد والذین كفر و كذب ان هایک کوف کردن و تکذیب کردن آیات الله را آیات ما را اولئک اصحاب الجحیم انها اهل جهنمت جایگاه شاندار جهنم الله بنا بده یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله علیكم اینجا که خاندیم واذكروا نعمت الله علیكم و میثاقه الذي واسقكم به مراد نعمت مطلق نعمت بود همه نعمت های پروردگار بودند چه نعمت های مادی چه نعمت های معنوی گرچه بعضی می گفت نعمت دین اسلام مراد هست اما اینجا خدای تعالی اون مضمون را اعاده می فرماید و اشاره به یک نعمت خاص و اشاره به یک واقعی خاص دارند اون واقع چی بود هم اونکه قبل از نماز خوف پیش آمد قبلا شما خاندید که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه نماز خانده حضرت جابر رضی اللہ و تعالی نهو می فرماید که این آیه اشاره دارد بی تصمیم حمله مشرکین در مقام عصفان ان حضرت با یارانش نماز زهر خواندند. اونا بعد از اینکه متوجه شدن نمازشون خانده شد تمام شد حسرت خوردند افسوس خوردند که چرا از فرصت نماز استفاده نکردیم و در وقت نماز بهشون حمله نکردیم بعد بعضی از افراد دیگر که در مشوره بودن اونها مشوره دادن گفتن ناراحت نباشید تنها اینا یک نماز را ندارند لحظاتی بعد نماز دیگری دارند نماز دومی هم دارند که اشاره اونها به نماز عصر بود گفت که حداقل از اون فرصت شما استفاده بکنید اما خدا تعالی چون میخواست اینها را حفاظت بفرماید لطف کرد قبل از اینکه نماز عصر و وقت نماز عصر بیاید خداوند مشروع فرمود چی را مشروع فرمود؟ مشروعیت سالات خوف را لذا این اشاره به اون هست يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم ای مؤمنان ياتك نيمت خدا را كه بر شماست اذ هم قوم زماني كه قصد كرد قومي يعني مشركين ايب سطوا اليكم ايديهم انك دسهاي خودشون را به سوی شما بلند كنند فكف ايديهم عنكم خداوند باز داشت از انها از شما و تقو الله از خدا بترسید پروا داشته باشید فغط و علی الله فل يتوكل المؤمنون فقط و فقط بر الله باید توکل داشته باشند اعتماد داشته باشند مؤمنان و بعضی میگن به واقعات دیگری اشاره هست چندین واقعه پیش آمده که خدا تعالی به شکل معجزه آسای تدبیر فرمودن برای حفاظت مسلمانان یکی اون واقعه هست که آن حضرت صلی الله علیه و با صحابه زیر درختی خاصند که استراحت بکنند، استراحت می کردند و شمشیرشون آویزان بود بر شاخی از از شاخهای درخت، یکی از کفار آمد و اون شمشیر را از نیام کشید و وقتی که آن حضرت را بیدار شد دید که شمشیر بدستش هست. و او داشمی گفت من یمنعو منی الان کمیتونی تر از من جلوگیری بکنت کمیتونی تر نجات بده اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با احساس فرموده الله، این اللہ رتا که گفت بعضی از آل تفسیر نوشند چنان لرزه بر قلبش افتاد که بی اختیار شد شمشیر از دستش افتاد و در بعضی روات ها امده که صحابه وقتی که دیدند صحابه تهدید کردن سر و صدا کردن این ترسید علا ای حال شمشیر وقتی که از دستش افتاد خدای تعالی در دلش وحن آورد در دلش سستی آورد چنان سستی آمد که دستش لرزید و شمشیر بی اختیار افتاد وقتی که قطاد رسول الله صلی الله علیه و شمشیر را گرفت و گفت الان تو را کی نجات میده او گفت که کن خیر اخز بهترین اخز باش بهترین کسی که اسیری را دستگیر کردی الان من اسیرم تو با من خوبی کن تو با من مروفت داشته باش من نکوش چنانچه حضرت صلی الله علیه و او را بخشید لذا اللہ می فرماید که این نعمتها را یاد کنید که این دستهای را خیلی از مسلمانان هستن نه تنها مسلمانان صدر که خدای تعالی برای اونها معجزه کرده بعدن در ادوار مختلف مؤمنین، مجاهدین علماء که مردم برای اونها دشمنان برای اونها توتعه از بین رفتن کردن نقشه کشیدن ولی خدای عزوجل حفاظت کرده لذا الله تعالی این نعمت را یادآوری می‌فرماید ولقد اخذ الله ميثاق بني وَبَعَثْنَا وبعثنا منهم عَشَرَ نقيبا خداوند تعالی به ما دستور دادند که شما به نعمت ها پایبند باشید و به تعهدات واثقكم به اهدی و پیمانی وذکر نعمت الله علیکم و میساقه اللذی واثقكم به در اینجا نمونه از نقض عهد بیان می به بما فرمودن که شما به تعهدات خودتون پایبند باشید ببینید اونهایی که به تعهدات خودشون پایبند نبودند نتیجه چی شد یعنی یهود؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل همانا خداوند جل میثاق گرفت پیمان گرفت از بنی اسرائیل و بعثنا منهم عشر نقيبا و ما مبعوث کردیم یعنی تعیین کردیم از اونها به خاطر نظم در امور عشر قوم نقيبا دوازده تا نقیب نقیب تفسیر قرطبی نویشته النقیب و کبیر القوم نقیب کسی را میگن که در راس قوم باشد سردار باشد سرپرست باشد رئیس باشد مسئول باشد هر تعبیری که میکنی چون دوازده سبت بودند و دوازده تا از کنم که اولاد دوازده فرزند عقوب بودند دوازده قوم میشن. از هر یکی یک نفر که شایسته تر و لایق تر بود به عنوان سردار و به عنوان مسئول اون تیره تعیین شدند و خداوند تعالی از اونها عهد گرفت عهد چی بود؟ انجام که ما میخوایم بعضی از در درهمی آیه ذکر است. ولقد آخد الله ميثاق بني اسرائيل. تفسير خازم میگه اینا الله آخد ميثاق هم، ان يعبدوه، ولا يشركو به شيء، و ان يعملوا ما في التورات من الاحكام والتكاليف. ك انها احكام و تكاليف را ك در تورات هستند خوب انجام بدند. یعنی به تورات و مفاد تورات عمل کنند این تعهد را انها داشته باشند بس خدای از و در مقابل این تعهد یک سری پاداشا و یک سری انعاماتی به اونها عطا می فرماید و قال الله انی معکم خداون فرمون من با شما هستم معیت خدا یعنی حمایت خدا یاری خدا که هر جا شما را یاری می کنم اما بشرط، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر شما نماز را برپا بدارید و آته توم و زکات بدهید و آمن توم و ایمان بیاورید به من و عزت توم هم و انها ریاری براسانید امداد کنید و اقرض توم الله قرض حسنا معلوم شد که قرض حسنه صدقی نفلی را میگند. چون بحث زکات گذاشت. علاوه از زکاة قرض دادید خدا را قرض حسنه انکار را کردید اگر عبادات مالی اگر عبادات جانی و همچنین اخلاقیات را رعایت کردی ببین زکاة یکی از فرائض هست کہ هر مسلمان وظیفش باید انجام بده اما صدقات علاوه از انکی عبادت مالی هست جز اخلاقیات شما زکات میدی میگه که خب بر من لازمه فرضه نده هم خدا منو معقظه میکنه اما صدقه دادن لازم نیست اما صدقه با انگیزه دیگه میده دی. یکی که با انگیزه سواب و دوم انگیزه همدردی اخلاق همین همدردی هست این بیچاره کفش نداره او لباس نداره او غذا نداره لذا براش تهیه میکنی میده می بهش بی این جز اخلاق است پس اینجا چند مورد بودند هم عقاید و ایمان بود آمنت رسولی و هم اعمال بود عبادت بود و هم اخلاق بود اگر این رو شما انجام دادید لا اکفرن عنکم سیئاتکم ان سمری اول من کفاره میکنم از شما از شما را یعنی هر چی بدی داشتید همه پاک میکنم همه رو محو نابود میکنم و جلب اندفى مزررت من وجلب منفعت ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار هتمنى هتمنى داخل ميغردانم شما در اون جناتی که جاری است ازر درقها نارها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل این سمر نقض است، سمر اهد شکنی هست هر کسی که کفران کرد بعد از این شما یا کفر کرد اهد و پیمان را بسته ولی اهد و پیمان را شکست فقد ضل سوا السبيل حمانا. این فرد گمراه شد از راه راست راه راست را راه صحیح را چکر کرد از دست داد فبما نقضهیم میثاقه لعناهم لعنه هم خب ما قبلا ارز کردیم که خداوند به ما یادآوری فرمودند که ما پیمان شکن نباشیم حال از رکوب بعد خداوند یادآوری فرمودند یک نمونه از پیمان شکنی را اصل پیمان چی بود؟ اصل پیمان خداوند از یهود گرفته بود، اما این پیمان در تورات بود. و پیمان مفاد پیمان اینجا هم هست آیات دیگر و اگر اخترنا اسرائیل، الا تعبودوا ایلا الله و بالوالدين احسان الاخره. این پیمان را وقتی که شکستند نتیجه پیمان شکنی چی شد؟ خداوند برای ما داره. موعزه می فرماید درس عبرت بیان می که ببینید اونهایی که پیمان شکستند چی شدند هم در دنیا زلیل و خار هم در آخرت جایگاهی ندارد فبما نقضهم میثاقهم نتایج نقض پیمان را واقعا پیمان شکستند خصوص کسی با خدا اهدی می کند اثرات سوی دارد وقتی اهد را بشکند بازی مردم توبه میکنم میگه خدای من اشتباه کردم دوباره این کار را تکرار نمیکنم اما دوباره تکرار میکنم این پیمانی که با خدا بسته وقتی که انسان پیمانی که با خدا میبندد اون را نقص کند بعد از اون چند اثر سوء مرتب میشه یک لعنت خدا متوجه او میشه کسی که با خدا عهد میکند و بعدن عهد را میشکند دو قصاوات قلبی قصاوات قلبی اون انسان را میگیرد اینها هم مورد لعنت قرار گرفتند و دوم دو هم قصاوات دلشون سنگ شد دل که سنگ بشه دوباره توفیق حاصل نمیشه خب اونها کتاب خدا را داشتن اون را چه توجیه کردند سه تحریف کتاب خدا یعنی کتاب خدا را او وقت دستکاری میکنه اون وقتی که دلش سنگ بشه نمیترسه دیگه راحت کتاب خدا را جابجا میکنه دستکاری میکنه چار تمام تعلیمات را و تمام آموزه را فراموش میکنه اگر اهل البه هم باشه هر چی که یاد داشته اونها را خدا تعالی از ذهنش زهول میده پنج انهماک فی الخیانت خیانت می‌کنه بدعتی می‌کنه فساد می‌کنه دیگه غرق فساد میشه اینا همه این بدبختی‌ها به خاطر چی هست به خاطر اینکه کسی پیمان را میشکند عهد را که با خدا بسته لذا خدای تعالی ببینید این هر پنج تا در این آیه می بینید الله می فرماید فبما نقضهم ميثاقهم به سبب عهد شکنی به سبب شکستن آنها اهد و پیمانشان را لعناهم ان تجئ اول نقض لعناهم ما انهر لعنت کردیم نفرین کردیم دوم وجعلنا قلوبهم قاسيه ما قرار دادیم دل‌هایشون را سنگ و سخت قرار دادیم سخت دل شدن سنگ دل شدن انسان که سنگ دل بشه دیگه توفیق هدایت از چی میشه سلب میشه سوم یحرفون الكلم عما واضعه کسی می پرسد خب کتاب خدا را چکار کردن بدون عمل نکردن مگر نه اون را طبقه هوای خودشون دراوردن یحرفون الکلمان مواضع کلمات را تحریف و جا کردن از مواضعشان ببین از مواضعشان تحریف که کردند نه تنها آن در باره رسول الله آمده بود درباره نبی آخر الزمان آمده بود بلکه تمام احکام تورات را اونها در آوردن طبق میل خودشون طبق هوای نفس خودشون مثلا جلوتر در آیات میخوانیم خانیم آیه رجم بود آیه سنگ کردن زانی و زانیه بود اون را تغییر دادند گفتن نه این حکم در تورات نیست این دستور در تورات نیست یا بقیه احکامی که برای اونها مقدار سختی ایجاد میکرد اون را تغییر می همه را در جهت اون احکام و مسائلی که در اون صورت برای اونها نفع مادی داشت برای اونها نفع مادی داشت این هم خیلی هستن که مردم به مردم طوری تلقین می کنند مردم را طوری فریب می دهند که می گویند که شما هرچی گناه دارید فلان مبلغ را پرداخت بکنید ما میتونیم کفاره گناهان شما را بدیم یعنی فنفوتی بلد هستیم فرمولی بلد هستیم که بعد از اون شما برید و بالاخره گناهان شما بخشوده میشه یا مثلا فلان فریزه از شما ادا میشه همیشه سعی میکنند که کسانی که اهل تحریف هستن چیزهایی را در دین ایجاد بکنند که بظاہر برای مردم سهولت باشه برای خودشون سهولت باشه در قبال این اقدام از مردم چیزی دریافت میکنند لذا الله می فرماید و یحرفون الكلمة عن مواضعه قبلا هم خاندیم علماء وشتن که یهودی ها هم تحریف لفظی می کردم و هم تحریف معنوی و نسو حظم ما ذکرو این نتیجه چارم هست نسیان تعلیمات اله و نسو فراموش کردم بخش بزرگی بزرگ را از کجا وردم حظم تنوین لتعظیم هست فراموش کردن این ترجمه را اللام اشرفانی کرده بخش بزرگی از آن که یاداوری شدم به آن یعنی تعلیمات الهی را بخش بزرگی را نسیه منسیا کردند فراموش کردند و پنجمین گرفتاریشون پنجمین عذابشون ولا تزال تطلعوا على خائنه منهم این انهمک اس انهمک در خیانت همواره شما متله میشید بر خیانتی از آنان الا خائنه يا انا على خيانه یلا قلیل منه. مگر تعدادی اندکی که مؤمنینه، مخلصین همچون ابن سلام و دیگران هستن، اونها نمیکنن خیانت. بقیه، خب با توجه این هم خیانت ها آیا اینها مستحق جهاد نیستن، مستحق تنبیه نیستن؟ الله تعالی میفرم فعف عنهم وصفه. شما انها را معاف کن و در گذر باش چونکه الله یحب المحسنی خداوند نیکوکاران را دوست دارد این گذشت شما باعث نیکی هست نیکی برای شما و خداون نیک نیکوکاران را دوست دارد منظور اینه که در باره اینهایی ای که عهد شکنی کردن با خدا, خدا تعالی دستور صادر نفرمودن که با انها جهاد بشه و با انها جنگیده بشه وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنَّا نصاره یک اهد شکنی یهود کردن نمونه از پیمان شکنی را خاندیم نمونه دوم را از مسیحیان می خانیم مسیحیان هم پیمان شکستند الله می و وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا <نصاره> از آنانی که گفتن ما نصارا هستیم ان نصارا نصارا یعنی چه؟ نصارى گرفته شده از اون جمله که عیسی فرمود و قال عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل و من انصاری الى الله قال الحواريون نحن انصار الله یعنی نصارا را میگن که ادعای نصرت دین الهی را داشته باش حال اینا قالوا اینا نصارا از یک طرف میگویم ما نصارا هستیم از یک طرف شرک میکنند. به جایی که دین خدا را یاری کنی، دین خدا را خراب میکنی با شرکت، با خیانتات، با عمل مشرکی، مشرکانیت. لذا از آنانی که گفتن زبانان گفته اینان نصار و ایلا اینان نصره نیستند. اینها مخربان استند ناصران. اخذنا ميثاقهم ما از آنان گرفتیم پیمانشان را اونا هم پیمان داشتن پیمان بر توحید پیمان بر یک تا پیمان بر تعهدات دیگر اما فنسو حظم من ما بی بخش بزرگی را فراموش کردند از آنچه که تذکر داده شدند معلوم میشه که پیمان شکنی نصارا نسبت به یهود کمتر بوده یهود زمان بیشتری داشتند مدت بیشتری چندین هزار سال یهود زندگی کردند و چندین هزار پیغمبر هم داشتند اما نصارا بعد از عیسی تا زمان رسول الله شیش سال بوده لذا اما در همی مدت کی پیمان داشتند فنسو حظا من ما بخش بزرگی از تذکرات و تعلیمات الهی که به داده شد اونرا فراموش کردند ببینید این که فراموش کردند چی تعلیمات الهی و آموزه های دینی که به انها داده بودند یکی فی خدا را به یگانگی عبادت کنند یک تاپرست باشند انها سگان گانه پرست بودند سه اقنوم را و سه جوز را به می پرستیدند البته یک گروه نیستند گروهایی که تقسیم شدند زیاد هستند که در ادامه اشاره هم میشه لذا تسلیس بودند بود که اونها به اون عمل نکردند و دیگه توحید بود که به جای توحید تثلیث کردند. دومی دو دو که وال ایمانو به محمد صلی الله علیه و سلم. ایمان آوردن به محمد گفت و مبشرا رسولی یاتی من بعده اسمه احمد. اذکرام که بسیاری از کتاب‌های ما هستند که انہا جامعی کردن مطالبی که در تورات هست و مطالبی که در انجیل هست هم تورات و انجیل قدیم و هم جدید در چه تحریف کردن در جدید اشاراتی هست در قدیم سراحت بیشتری هست لذا یکی از اون موارد ایمان آوردن به محمد صلی الله علیه وسلم از هو مکتوبه فی الانجیل فناس حزنا حزن و الايمان الإيمان و به محمدالاستلام ایلم عملو بما امر به ذلك الهوا والتحريف التحریف للكفر به محمدصلی الله س.پس فناس حزم من مذکر که تم فراموش ایمان بر رسالت بينهم العدا ما واقع وجود اینکه جمع بزرگی هستند از نظر جمعیت اما اختلافات نصاره با هم دیگه خیلی زیاد هست اولا بقیه ادیان اگر با هم اختلاف دارند کمتر در اصول اختلاف دارند و اختلافشون زیاد اساسی نیست اما مسیحیان که با هم دیگه اختلاف دارند اختلاف اصولی اساسی ریشه‌ای مثل اختلافات مسلمانان نیست که مسلمانان در مسائل جزئی و مسلمانان اهل ایمان اهل توحید در مسائل جزئی که اختلاف به حساب نمیان اینا برداشت‌های مختلف و است</thead>ات هستند که مثلا وقتی که تا تکبیر میگن دست کجا باشد بالا باشد پایین باشد هزار منکبه باشد هزار اوزنه باشد دست کجا بسته بشه به چه صورت قاده بکنند در مسائل بسیار جزئی هست اما اختلافات نصاره ارز کردم ای است بعضی میگن که اصلا در باره اصل خدا اختلاف دارند بعضی میگن که حضرت ایسا فرزند خدا است ابن الله بعضی میگن نه خود خدا هست خدا نیست اونجا در آسمان خدا هست در زمین به شکل مسیح ایسا است. و بعضی میگن نه تا هستند یکی ایسا هستی یکی مادرش هست یکی خداوند هست یا عیسیٰ انت قلتا للناس اتخذونی و ام یا الهین من دون الله. بعضی مگنان ستا حسن سیومی روح القدس است ما در عیسیٰ نیست چونکہ اقنوم سلاسا که می, می گویند انا عبادت می کردند است حسن عیسیٰ روح القدس است و امروز هم که عنوان های زیادی بعضی از عنوان های قدیم که نوشتند ملکانیه و غیره که گروههای مسیحیان بودند اونا عنوان های قدیمی شون حسنان عنوان های جدیدی که دارند کلیساهای اینها انها با هم اختلاف اساسی دارن به هیچ صورت اینها با هم کنار نمی یا تونم با هم وحدت داشته باشند مثلا پروتستان ها و کاتولیک ина الان هر یکی برای خودشون رهبران جداگانه دارند هیچ وقت نمیتونن با هم متحد بشن اگر امروز اختلافشون کمتر شنیده میشه گرچه در درونشون بسیار شدید اونایی که مذهبی هستن اگر کمتر شنیده میشه به دلیل اینکه مذهب را ویل کرد امروز مسیحیت دنبال مذهب نیست دنبال اون دین مسیحیتش نیست ویلی اگر مذهبی باشه اینا به با ایت صورت با هم دیگه کنار نمید لذا فاغرینا بینهم العداوت و البغضا الیوم القیامة با ایمان تا روز قیامت این عداوت و بغض حس ما واقع کردیم و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ان قريب خدای تعالی به خبر میده آنچه که انجام دادن کئی خبر میده در قیامت بالجزای والعقاب انجام با جزا و اقاب خدا خبر میده خب ببین دو تا عهدشکنی بیان شد یکی از یهود یکی از نصارا بعد از این دو شکنی خدای تعالی اونها را ترغیب میده اونها را دعوت میده به اینکه این موقعیت جدیدی که برای اونها فراهم شده فرصت طلایی جدیدی که برای اونها مهیا شده یعنی رسولی آمده کتاب پرنوری آمده از این موقعیت استفاده بکنند از این موقعیت استفاده بکنند و برگ گردن به سوی خدا جبران کنند خیانت ها و نقضات های گذشته را تا آینده خوب بشه ببینید ترغیب را یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب اي اهل كتاب همانا آمد پیش شما رسولی که يبين لكم الشان و وجایگاه علمی رسول باوجود وجودی که خودش امی هست اما مزامين کتاب های شما را هم بیان میکند تو کتاب آئید شما چه مطالبی هست وچه مطالبی نیست بسیاری از اون مطالبی که حتی شما تعریف کردید یبینو لكم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب بسیاری از انهایی که شما بودید مخفی می کردید از کتاب چه از تورات چه از انجیل این پیامبر انہارا بیان می کند انہارا توضیح می دید انہارا روشن می کند ویعفو عن کثیر این شانه اخلاقی پیامبر هست که بسیاری دیگر را چی می کند عفو می کند بسیاری دیگر را عفو می کند یعنی بعضی چیزا که لازم نیست به رخ شما نمی کشد شما را زیاد خجل و شرمنده نمی کند اونی که لازم است در باره اصول است مسائل اعتقادی و ایمانی از اونها را یادآوری میکند. می کند لذا این پیامبر که آمده و این کتاب آمده این نوری هست قد جاکم جا من الله نور و کتاب مبین همانا آمده پیش شما از جانب الله نوری آمده بسیاری معتقدا اکثر علماء و این تفسیر بیشتر بدل منشینت که مراد از نور قرآن است و کتاب مبین و واو تفسیری است کتاب روشن نور بچ معنی اینه کتاب روشنی هست هیچ خفایت اون نیست و بعضی گفتند مراد از نور رسول الله صلی الله علیه و چون قد جاءکم رسولنا ینبین لکم اگر مراد رسول الله باشد اون وقت نور هدایت است نه اینکه جنسشون از نور هست بعضی میگه نور من نور الله نه بلکه قل انما انا بشر مثلکم نور حدایت است راہنمائی است یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ہدایت می فرمائے بوسیل ان کتاب و ان نور مبین خداوند چه کسی را هدایت راہنمائی می کند من اتبع رضوانه هر کسی کے دنبال رضا پروردگار باشد او را راہنمائی می کند سبول السلام براہای سلامتی براهای حدایت براهایی که در دنیا و آخرت از عذاب سالم و محفوظ و مأمون بماند و یخرجهم من الظلمات الى النور و آنان ربیرون میکنن از تاریکی های شرک و خرافات بدعت کفر بسوی نور توحید ایمان سنت به اذن خودش به توفیق خودش و یهدیهم الى صراط مستقیم بصراط مستقیم راه نمائشون اما اینکه ما خاندم قد جاء کم رسول رسولنا یو لكم لکم کسیرم كنتم کنتم تخفون من الكتاب ای متعلق به اُحص رسول صلّى الله عليه و سلم چی چیزی را بیامیکوند بسیاری از کفرگویان هر اسلامیکوند و ایلامیکوند چنان چن Jam ایلامیکوند قرآن که این که شما میگوید اناللہ و المسیح ابن مریم این کفره این غلطه دلیلش دلیلش اینه که اگر خدا بخواد مسیح ابن مریم را و مادرش را و تمام اهل زمین را از بین ببرد کی جلوی خدا را میتونه بگیره یعنی قدرت مال خداست خدا وقتی چین قدرتی داره نیاز نداره و مسیح ابن مریم خودش عاجز بود خودش ضعیف بود خودش ناتوان بود که خدای تعالی برای کمک او جبرائیل امین را فرستاد چطورو میتونه خدا باشد لقد کفر الذين قالو ان الله هو المسيح ابن مریم همانا کف کردن کسانی که گفتن همانا الله او مسیح ابن مریم هست قل فمن يملك من الله شيئا پس چیکسی مالک هست از خداوند چیزی را خدا به چیکسیده داده ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم اگر خدا بخاط موت مسیح ابن مریم را هلاکتش را موتش را و امه و مادرش را وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الأرض جمیع، همه کسانی که در زمین هستند، همه را خدا بیخاط بیمیراند. کی مالک هست؟ کی داره اختیار هست که جلوی خدا را بگیرد؟ هیچ کسی نیست. ولی الله ملك السموات فقط و فقط برای الله، لا ایساع لا لی ایساع و امه. ولی ملك السموات والارض وما بينهما پس اینجا معلوم میشه که مالکیت اختصاص به خدا داره فقط و فقط برای الله اس شاهی و مالکیت آسمان ها و زمین و ما بینشان یخلق ما یشا خالقیت هم اختصاص به خدا داره مالکیت هم مال خالقیت هم مال اوست نیسا و مادرش والله على كل شيء قدير قادریت هم مال خداست الله بر هر چیز اس قادر است نیسا و مادرش همین جا چون که بحث در مقابل ایسا و مادرش هست حال خدای تعالا بعد از این که کفریات اونها را اعلام فرمودند و اثبات فرمودند زجر بیان می فرماید برای همین یهود و نصاری که باوجود این کفرگویی، باوجود این زلالت و گمراهی خودشون را محبوب خدا میدونه. واقعا انسان گاهی که گمراه بشه به اوج گمراهی که رسیده هم نمیدونه من گمراه هم. نمیدونه که من دارم راه اشتباه هم را بیبرم. بسیاری هستن از مردم همین خوشبینی را به اونها تزریق کردن. این خوشبینی را علماء یهود و نصار تذریق کرده بودند. میگفتند چنانچه امروز هم همین خوشبینی در مسیحیت هست. میگه همین که نسبت با ایسا مسیح داشته باشی و ایشون را به عنوان فرزند خدا قبول داشته باشی همین را نجات میده همین ایمان همین عقیده را نجات میده چونکه ایسا خودش را قربان کرده برای کفاره تمام پیروان خودش هرچی پیروی ایسا هستند اونا بخشیده میشند چون عیسی به دار زده شده از این طریق مردم گمراه را گمراه تر می کنند که اونها مسیحی بشند و میگن مسیحی که شدیم دیگه بعد از اون بخشیده میشیم لذا این خوشبینی را اونها ایجاد کردند الله تعالی می فرماید بر این خوشبینی ایجاد کردن سرزنش می فرمید زاجر بیان می فرمید وقالتی الیهود و النصارا نحنو ابناء الله و او. یهود و نصارا گفتن ما فرزندان خدا هستیم فرزندان خدا به چی معنا؟ یعنی و احباؤ بس فرزند به معنی حقیقی نیست محبوب کسی که فرزندی داشته باشه کسی که کسیر را دوست داشته باشه ولی اینکه فرزندش نباشه او را از روی شفقت و محبت میگه فرزندم. لذا اونها به این معنا میگفتم ما محبوب خدا هستیم. خدای از جل جواب میده به اونها که اگر راس میگید چرا خداوند تعالی در طول تاریخ شما را عذاب داد؟ در طول تاریخ انواع بلاها بر شما آورد. اگر شما محبوب خدا هستید چرا هر جد تو سری میخوردید. قل فلم یعذبکم به ذنوبکم بگو پس چرا عذاب میداد شمارا شما را بسبب سبب بل انتم بشر من خلق شما هیچ ویژگی جگی ندارید بلکه شما بشر هستید از اون بشری که الله آفریده یغفر لمن یشاء و من یشاء لا عیسی و امه اللہ می بخشد هر کسی راکی بخواهد و یعذب من یشاء عذاب می هر کسی راکی بخواهد عذاب و مغفرت دیدست عیسی نیست مادرش نیست الله است کسی را می بخشد کی ایمان بیارد این الاتس که هر کسی را بخاد می بخشد اختیار دارد چون که ولله ملک السماوات و الارض و ما بین هما فقط و فقط پادشاهی آسمانها و زمین و ما بینشان و ایله المصير فقط و بازگش باز گش بسوي او حس وحده او بسوي کسی دیگه نیست یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل بعض هم بعد از اینکه خدای تعالی سرزنش فرمودون اونها توبیخ کرد بر بعضی از کفرگوییشان و بعضی از پیمان شکنیشان بعض هم دعوت میده ترغیب میدونه هر به سوی اسلام یا اهل کتاب ای احل کتاب قد جائکم رسولنا یبین لكم على فترت من الرسول همانا آمد پیش شما رسول ما فریزه رسول یبین لكم بیان می کند برای شما على فترت من الرسول بیان می تمام احکام ما را تمام دستورات ما را تمام پیامهای ما را به شما میرساند باوجود انقطاع رسول علی فترت من رسول زمان فترت چه زمانی را میگن اون زمانی که پیامبر نبوده از زمان عیسی علیه صلی اللہ تا زمان محمد رسول الله را میگوین زمان فترت چون در این زمانها پیغمبری نیامد و پیغمبری مبوس نشد و چند سال حدود شش سال هست حدود 600 سال است رسول الله صلی الله علیہ وسلم در سال پونسد و میلادی به دنیا آمدند لذا بعد از اون که در چهل سالگی به پیامبر رسید میشه 610 سال خب اون میلادی هست میلادی ای سال اللہ علیہ لذا چیزی کمتر از 600 سال میشه اولوحوش هو 600 سال این زمان زمان فترت بوده على فتره من الرسل يعني بر در اون زمان انقطاع رسول کی پیغمبر هیچ نیامد ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير این حکمت بیست شدت است قد جاكم رسولونا من ان تقولوا از این که شما بگویید یا لالا تقولوا تا نگویید که ما جاءنا من بشير ولا نذير برای این ما نیامد هیچ بشارت دهنده و هیچ ترساننده تاکی شما فردا این نگوید خدا فرستاد لذا فقط جا اکم بشیر و نذیر آمد پیش شما بشیر و نذیر آمد والله علی كل شيء قدیر خدا من بر هر چیزی قادر هست پس اهل کتاب این پیامبر آمده برای شما همه چیز را بیان می کند یبینو لکم پس به این ایمان بیاورید در مقابل ایشون تسلیم بشید و فرامین ایشون را به جا بیاورید و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله نمون دیگری را خدای تعالی از عهد شکنی می می‌فرما چون قبلا بحث عهد شکنی هست عهد شکنی هم یهود و هم نصاره و هم چنین ان نمون از عهد شکنی نمونه ای از ذلت هست بر ترک جهاد جهاد را که ترک کردید شما چطور خار و زلیل شدید چطور بلا تکلیف شدید تا آخر خودتون تصمیم گرفتید که باید فکری داشته باشیم خب این جهاد در زمان موسیٰ علیہ السلام جهاد یک حکمی از احکام خدا حکم مشروعی هست که در همه ادیان بوده بسیاری امروز سعی کنند از مغرزان و دشمنان که نشون بدن جهاد فقط تو اسلام هست در بقیه ادیان نیست در بقیه ادیان همیشه سلو آشتیه نه در بقیه ادیان هم جهاد بوده در دین مسیحیت بوده حواریون جنگی دن عیسی علیه الصلاه و السلام از اونها طلب یاری کرد طلب یاری باچی میشه شباهت جهاد می حضرت موسیٰ این جد واقعی مربوط به زمان موسیست و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم زمانی که موسیٰ قومش گفت ای قوم یاد کنی نعمت خدا را نعمت های خدا این تمید است این مقدمه است برای جهاد که خدا بشما چقدر لطف کرد ار جعل فیکم انبياء او جعل لكم ملوك زمانی که خداوند قرار داد در میان شما انبیا پیامبران خیلی زیاد بودند و همچنین شما را ملوک قرار داد پادشاه قرار داد پادشاهی را خدا به شما داد بعد از اینکه یوسف علیه الصلا و السلام عزیز شد بعد از اون پادشاهی تا سالها سال به دست بنی اسرائیل بود و آتاكم ما لم يؤت احد من العالمين وبشمادت اون چیزی که نداد به هیچ از عالمین از جهانیان و آتاكم ما لم يؤت احد من العالمين چی بسیار میگویند که همین پادشاهی و نبوت که بعد از ابراهیم علیه السلام و اسحاق این اختصاص داشت به فرزندان اسحاق و ابراهیم بقیه عالمین اون زمان هیچ یک در میان هیچ چیزی که مبعوث نشد پس هم پیامبری را به داد هم نبوت را جو نبوت را و هم ملوکیت را پادشاهی را به هیچ کی نداده و بعض میگه همین نعمت ها مراد هستند و ظاهر هم همینه بعضی میگن اون نعمت های دیگری که حتی عالمین بعدی را هم خدا نداده مثل من و و ارز کنم که فجرت من ہو اس نے عشرت دوازده تا چشمه او ارز کنم که تمام نعمتهای خاصی که خدا تعالی در سخت ترین به ببنی اسرائیل داد انہا مراد هستن و آتاکم مالم یؤتی احد من العالمین لذا این تمهید، این مقدمه خدا که این همه لطف دارد نسبت به شما شما برای در زندگی خودتون از اون خدا اطاعت کنید جهاد کنید لذا دستور فعلی خدا چی است یا قوم تدخل الارض المقدسه ای قوم داخل بشید سرزمین مقدس مراد از الارض المقدسه بیت المقدس است الی الله لکم آن بیت المقدسی که خدا برای شما آن را نوشته تفسیر مدارک نوشته کتب فی الله المحفوظ انها مسکن لکم در لوحی محفوظ نوشته که باشندگان بیت المقدس شما یهودید مسکن شماست ولا لا ترتدو علا ادباركم پشت سرتون بر نگردید فتن قلب و خاسرين. شما زیانکار میشید شما خاسر و خائب میشید یعنی پشت سر چیه کفر است شرک است اما بنی اسرائیل ببین نقض عهدش را ترس و بزدلیش را قالو یا موسا اِنَّ فِيهَ قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ گفتند ای موسیٰ در اون قوم در اون بیت المقدس قوم سرکشی هست قوم زورگویی هست منظور قوم عمالقه عم بود که اینها هیچ دینی نداشتند کفر داشتند و آمده بودن جا قتل و غارت و آدم کشی وقتی که انها بررسی کردند شرایت جنگی انها را دیدن که خیلی قوی هستند کار ما نیست و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ما هرگز داخل نمیشین تا اینکه اونها خارج بشن فایخرجوا دَاخِلُونَ فإنا داخل اما قال رجلان ده تعید موسی علیه الصلاه والسلام دو تا دو مرد بودن مرد صادق و مخلص یکی از اینها یوشع بن نون بود و یکی کالب بن یقنا یکی از ابن قرائیم بود از فرزندان قرائیم و یکی ابن یهودا یعنی از تیره فرزندان یهودا بود اینها گفتند که قال وجلان من الذين قبل ظن خدا تعالی اخلاص و صفات درونی این دو مرد را بیان می فرم. من الذين یخافور، ای خافون, خافون الله از کسانی که خوف خدا بر اونها غالب بود انام الله علیهما از اونهایی که خداوند بر اونها انعام کرده بود انعام دینی ادخلوا علیهم الباب گفتند که ای قوم شما نترسید بر اون قوم امالقه ام از در وارد بشید شما حجوم بیارید فا ازا فانکم غالبون هرگر شما داخل شدی شما غالب و علی الله فتوکلو این کنتم مؤمنین فقط و فقط بر الله توکل کرید اگر شما مؤمن حستید ایمان اقتضا میکنه کنید توکل بر خدا باشد اما قوم جواب قوم قالو یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها گفتند ای موسیٰ ما هرگز داخل نمیشیم ابدا تا زمانی که انها هستن فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون برو تو رب برو شما دو تا برید شما بجنگید انا ها هنا قاعدون ما ان جا نشستم قاعدون ان الجهاد ما بجهاد جهاد نمیم یعنی فذهب انت و ربک بچی معنا هست بعضی میگوین که اینا استهزایان گفتند، تماسخوران گفتند. و بعضی میگن نه، اینا به من حقیقی چونها اعتقاد داشتن خداوند هر جا با موسی کمک میکند. دیده بودند، اونجا دریارم موسی چطور چکار کرد و در هر مشکلی که موسی با مواجه شده خدا در کنارش بوده لذا گفتن که اگر موسا این اعتقاد را داشتن که اگر موسا بیرود خدا در کنارش باشد او پیروز میشه و ناره شکست میده یعنی استهزار نبود تمسخورن نبود اعتقادن بود بر اساس باورشون بود گفت ما میشینیم او که فت کرد چون ما نمی، نمیتونیم میترسیم اون که فت کرد پیروز شد بعدن از ما دعوت کنه ما میریم فضا و و رب بکا بی این معنی گفتند یقالو فیه ان یقال اذهب انت و ربک على علا قتالک تر قتالت کمک میکنه. این قول دوبوم هست قول اولینکی استهزاءن گفتند قالو ذلك استهانتا و استهزاءن به سبحانه و برسولی علیہ السلام و عدم المبالات بهما بی پروابو مسخر کردن گفتند بازی قول دیگه گفتن که این مقدار ضعیف است این قول گفتن اینجا رب به معنای مجازی هست کنایه از برادر سردار برادر بزرگ را میگن رب یعنی شما و ربت برو یعنی انت و ربک ای سیدک و هو اخوک الاکبر هارون یعنی شما و هارون برو به جنگید ما نمیت قال رب اني لا املك الا نفسي واخيي ان موسى عليه الصلاه والسلام وقتی ناامید شد دعا کرد اي رب من مالك نيستم من اختياري ندارم مگر برادر مگر خودم را و برادرم را فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اون دو تا دیگه و کالب خب بودند پس جدائی بی انداز بین ما و بین قوم فاسق نوسا لسلات دعائی بد کرد ففرق بیننا بالعقاب قال فإنها محرمت عليهم اربعین سنه فیصله خود آوندی همانا انصر زمین آن بیت المقدس حرام است بر سال تا چهل سال اینها رسند تا این چهل سال چیکار میکنن یت یونه فی الارض در زمین سرگردانند تی در زمین و سرگردانی در زمین معنیش اینه که حکومتی ندارد جایگاهی ندارد عزتی ندارد کاروباری ندارد همین طور بلا تکلیف این به معنی یتونه فی الارض هست فلا تأس علی القوم الفاسقین اندوهناک ما باش تو بر قوم فاسق بر اینهایی که انتر فیست میکنن تو ناراحت نباش بلاخره خدای عز با موسی وعده فرمود و تا چهل سال اینها سرگردان بودند موسی علیه و السلام و هارون علیه سلات و السلام همونطور که قبلا ارز کردم در همین میدان در همین سحرا سحرا سینا میدان که سرگردان و بلا تکلیف بودن در همین صحرا وفات کردند و بقیه بنی اسرائیل بالاخره هم انهایی که هم سن و هم نسل موسیل صلی اللہ علیہ وسلم بودن رفتند نسل جدید آمد افراد جدیدی آمدن چهل سال اخیه عمر یک انسانه تمام اینهایی ای که بودن رفتند و دیگه افرادی را خدای تعالی بلند کرد اونها وقتی که تاریخ خودشون را مطالعه کردن تاریخ اونها برای اونها بیان شد و متوجه شدن که تمام اقوام دنیا عزت دارند، جا دارند، شوکت دارن ما چون که آبا و اجداد ما خدا را ناراضی کردن ما اینجا بلا تکلیف هستیم اینها آمدند و همت کرده این زمان پیغمبر یوشع بود علیه السلام حضرت یوشع را که از اون دو نفر حامیانی موسا بودند خداوند بعدم به پیامبری برگزید و اینها وقتی که بیوشع گفتم ما آماده هستیم بجنگیم آماده هستیم جهاد بکنیم الله عزوجل هم این همت اونها را پسندید و جهاد کردن جهاد کردن موفق شدن خداوند اون قوم را تارمار کرد و بر بيت المقدس یهودی اما بعد از موسیل سلام اللہ مسلط شدند لذا این خلاصه بود از نقض عهدی که اونها شکستند وقتی که شکستند عهد را ببینید که چطور سرگردان و زلیل و خار شدند و علیهم عليهم نبأبني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنهم نموني ديگري أز نقز عهدس وفرمان خدارة ودستور خدارة شكستان هست دتا برادر مراد دو تا فرزندان آدم علیه السلام هستند که حابیل و قابل هستند در تورات ازشون یاد شده به حابل و قابل اینها با هم دیگه خصومت داشتند و این خصومتشون باعث شد که قابل حابیل را شهید کرد کشت از بین بورد. اما این خصومتشون و این اختلافشون چرا هست الله و عالم تو تفسیرها داستانهای نوشتند که این داستانها در واقع یک داستانی که معروف هست از حدیث صحیح ثابت نیست اینها بیشتر نقل هستند از اسرائیلیات که ما نمیتونیم تصدیق بکنیم و نمیتونیم تکذیب بکنیم خلاصه اون داستانی که گفته میشه این هست که هر بتنی که از هوا متولد میشد یک پسر بود و یک دختر بود این پسر و دختر با هم برادر و خواهر بودند اینها با هم نمیتونستن ازدواج بکنند اینها میتونستن با پسران و دختران بتن دیگه ازدواج بکنند لذا یک بتن حابیل بود و خواهرش به لیوزا و از یک بطن دیگر قابل بود و خواهرش به نام اقلیما وقتی که به دنیا آمدند خواهر قابل بظاهر زیبا روی بود و خواهر قبیل حابیل کی لیوزا بود اون شکل و زیبایی آنچنانی نداشت لذا قابل نخواست که خوهرش را به حابیل بده را گفت من خودم عقدش میکنم و این خلاف فرمان خداوند در اون زمان بود آدم علیه و اللہ گفت که خب شما ای بکنید شما چیزی را در راه در راه خدا قربانی بکنید مال هر کس که پذیرفته شد این اقلیمہ مال او هست کار حابیل از کنم که گوسفندداری و مالداری بود داشت و کار قابل زراعت و کشاورزی بود حابیل یک قوچ بزرگی را گسفند قربان کرد آورد کنار گذاشت تا این صدقی بشه و قابل مقدار کمی گندوم ناقص اونم خراب شده بودند اینها را گذاشت و اون زمان قبولیت قربانی از آسمان مشخص می شد که هر یکی را که خورد و برد با خودش اون قبول شده بلاخره اون حاطف الهی آمد اون از غیب آمد و گوسفند رهایی قابل را برد این قبول شد و اون دیگه قبول نشد اینجا بود که بغض در دل قابل ایجاد شد با برادر حسد کرد و گفت من تو را میکشم تا اینکه او را کشت اما از کردم که این از حدیث صحیح نیست علت اینه گفتند شیخ بزرگوار امام میفرماید شیخ حسین علی رحمه الله که اون چیزی که در قرآن آمده ما فقط همون را علت قرار می دیم الان پس منظر چی بوده اصل داستان چی بوده چون از حدیث صحیح ثابت نیست، اون را ما ملاق قرار نمی دیم اون چیزی که در قرآن هست همینه که این دوتا با هم رقابت داشتند دوتا قربانی کردند یک قربانی یک صدقی حابیل داد و یکی قابیل مال حابیل پذیرفته شد مال قابل پذیرفته نشد بغض و حسد از اینجا شروع شد که چرا او مقبول است و من مقبول نیستم خود تو بخل کردی تو اخلاص نداشتی بالاخره این منجر شد این باعث شد که قابل بیاد، حابیل را بکشت از بین ببرد و تلو علیه نبأ ابن آدم بالحق تلاوت برآنان بر آنان بخان فرزند خبر دو فرزند آدم را به حق اذ قربا قربانا وقتی که ان هر دو قربانی را پیش کردند عرضه کردند در محضر الله فتقبل من احدهما پسی رفته شد پس قبول شد از یکی از اندو یعنی از حابیل ولم یتقبل من الاخر و قبول نشد و پسی نشد از دیگری قال لأقتلنک این حسودی باز شد که قابل گفت حتما حتما ترمی میکشم. قال انما یتقبل الله من المتقین اما اون برادر گفت چرا من مقصر من نیستم جوز نیست که خداوند قبول می از متقین کسانی که خدا ترس باشند یعنی برای قبولیت صدقه تقوی و اخلاص لازمه که تو این را نداری و نداشتی اما اینو بدون که اگر بسوی من دستت را بلند بکنی من با تو کار ندارم لَإِمْبَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي اگر بلند کنی بسوی من دستت را لتقْتُلَنِي ثم مر ابو كشي ما انا بباسط يدي اليك لا اقتلك من نیستم دستم را بلند کنم به سوی تو بکشم من قتل نمیکنم چرا اني اخاف الله رب العالمين ان قلتس من از خدا میترسم که رب عالمین است ان أريد ان تب اب ابي اسمي واثمك من ميخام که تو رجوع كني هم به من يعني عاقبتي میشه من اگر دست بلند کنم ترب بکشم پس من گناهکار میشم میخوام که گناه من و گناه خودت بگردن خودت باشه اینی ارید و انتبو اب اثم و اثمک من اصحاب النار اون وقت میشی از اهل جهنم و ذالک جزای من این جزای ظالمین هست هل کسی ظلم بکنند بلاخره من کار ندارم فطوعت له نفسه قتل اخیه قرآن میفرماید که نفس او برای او قتل برادرش را و کشتن برادرش را چی زیبا جلوه داد یعنی جلوه چشم او این کار پسندیده ای آمد کار خوبی آمد گفت کار خوبی دارم می کنم بعضی وقتا کار خوب را کار بد را بعضی انجام میدم. بعد از این هم متوجه نمیشن کار بد تا آخر افتخار بی کنند لهو او را کشت فأصبح من الخاسرین با این کشتن که اولین خون ریزی روی زمین بود این بیچاره از خاسرین شد از زیانکاران شد چنان ذره و زیان کرد که این زرر و زیانش اصلا قابل جبران نبود خلاصه بعد از این که کشت او را از آیات قرآن معلوم میشه که جنازه برادر به دستش بود سرگردان بود که چیکار کار با این جنازه فبعث الله غرابا خداوند رستاد کلاغی را که یبحثو فی الارد در زمین میگشت لیوریهو ليو... کیف یواری سوعت اخی تاکه به اون نشان بدهد بقابیل که چگونه بپوشد سوعت اخی یعنی جنازه یا لاشه برادرش را وقتی که دید که کلاغ بهش نشان میده خدای تعالی به کلاغ ماموریت داد میگویند که کلاغ دیگری مرده بود خفره کند با همو کوچکش و این رتون اندخت و خاک را بر او ریخت این متوجه شد که این رایش هست اینجا این بود که این پشیمان شده فَأَصْبَحَ من النَّادِمِينَ پشیمانیش را عرض می کنم اما یک ای که اینجا ما در واقع درس می گیریم اینه که بهترین چیز و چیزی که از زمان نسل اول بوده و برای این نسل مانده دفن کردن است نسوزاندن جنازه بسیاری از اقوام هستن که جنازه را آتش می زنن خاکسترش می کنن. سوزاندن جنازه چندین مشکل داره اولی مشکلش با سوزاندنش بیپرده میشه، تمام بدن چون اول لباس می، می، می، چی می آتش می گیره می سوزه لباس که بسوزه اون میت بی میشه، می میشه، بی می مرد باشه یا زن ظاهر میشه و بعد سوزاندن آلودگی ایجاد میکنه بالاخره آلودگی در فضا ایجاد میکنه اما زمین را خدا اطالع خاصیتی داده خاصیت تحلیل که هر چیز را حل میکنه زوب میکنه آلودگی را هم از بین میبره و هر چی در بدنش باشه اون را هم زمین چی میکنه جز میکنه و نمی گذاره که دیگران از او متاثر بشوند لذا زمین این قدرت را داره این قدرت تحلیل و جذب را داره لذا به این خاطر معلوم میشه که اصل چی هست دفن کردن است اون که انسان های اول انجام میدادند فرزندان آدم انجام میدادند دفن کردن است امروز که مردم دفن نمی کنند بعضی ها و می سوزونند اقوام مختلفی مثل سیکا ها، هندوها و بعضی از اهل کفر و شرک دیگر لذا اینها بر خلاف اون چی که در اصل اول به انسان تعلیم داده شده عمل می لذا الله می که قال یا ویلتا عجزت گفت ای وای بر من آیا من عاجز شدم ان اکون مثل هذا غراب این که باشه مثل این کلاه فا سو سوعت اخی لاش و جنازه برادرم ربع پوشانم فاصله من النادمین این از نادمین شد از کسانی که پشیمان بشه ببینید آیا از نادمین شد به چه معنا از این که برادرش را کشت پشیمان شده بود نخیر این معنا نیست باز گرچه این معنا را می‌کنند ولی این درست نیست. اگر کسی بکشد و پشیمان بشه توبه می کند توبه که بکند خدای عزوجل بنوی او را مغفرت می کند اما از ادامه معلوم میشه که این فرد مغفرت نشده و تا قیامت هرچی که قتل میشه در گناه اون قتلها این قابل شریک است در حدیث سراحتن آمده رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمودن در همه قتلات چونکه این بدعت قتل را او ایجاد کرد پس اگر به من النادمین به این معنی باشه که این توبه کرده پشیمان شده خب توبهش باید قبول شده باشه پس چرا هرچی گناه هست بگردن او هست بلکه فاسبح من النادمین پشیمانیش از این بود که فرسنگ ها رفت یک جایی این جنازه رسی بکند دفن بکند بعد که دید پشیمان شد که همون جا دفنش می کردم چرا این همه مشکلات پس این پشیمانیش خاطر این انتقال جنازه بود این لاشه بود نه به خاطر چیزی دیگه و به خاطر چیزی دیگه بود از نفس کارش پشیمان می شد قطعا امورد پذیرش توبه خدا قرار می گرفت من اجل ذالکه من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. بيبينت در زمان ادم عليه الصلاه والسلام ان حكم قصاص وجود نداشت. لذا مفسرین میگن من اجل ذالک اشاره به این واقعه مذکوره است یعنی به این دلیل و به منظور جلوگیری از خون ریزی که بیشتر انسانها کشت نشوند من اجل ذالک کتبنا ای کتبنا القصاص على بنی اسرائیل کتبنا یعنی چی؟ یعنی قصاص را نوشتیم مشروع کردیم ببنی اسرائیل گفتیم که انه من قتل نفسا بغیر نفسا او فساد فی الارض ما قتل الناس جمیعا یعنی کشتن انسانی قد سخته کسی را کشتی گویا انسانیت را کشتی اگر کسی را احیا کردی گویا تمام انسانیت را احیا کردی اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علیم چون بحث گزشته بنی اسرائیل درباره چی بود؟ در باره جهاد بود و مناسبت این داستان آدم دو فرزندان آدم را بنده ارز نکردم مناسبت اینها هم برمیگرده به جهاد چون قبلا بحث جهاد بود به بنی اسرائیل خداوند فرمود که شما جهاد بکنید و بعد داستان دو فرزند آدم را آورد که وقتی که جهاد نباشه ببین در دین آدم جهاد نبود جهاد نباشه مظلومانه کشته میشه اما اگر جهاد باشد هر مومن چکار میکنه و اعیدو لهم مستطعتم آمادگی میکنه کشته نمیشه جهاد نبود اینجا که اون میگه من دستم را میبندم میزنی بزن میکوشی بکش من دست بسویت تو بلند نمیکنم این اینا تمام به خاطر چی هست جهاد اما الان در دین ما در شریعت این نیست که اگر کسی ما را زد دست ببندی تا بزنه در دین ما چی هست جهاد هست پس ببین این به خاطر عدم جهاد بود که کشته شد و بعد من اجل که شیخ میفرماید در ادامه بحث بحث قصاص نیست انه من قتل نفسا بغیر نفسن او فساد بحث قصاص نیست بحث جهاد است متوجه هستید بحث جهاد هست. خداوند میفرماید که من اجل ذالک به خاطر همین که به خاطر سکوت به خاطر از خود دفاع نکردن چه مشکلاتی دارد چه پیامدهایی دارد به این خاطر كتبنا علی اسرائیل القتال ما بر برنی اسرائیل چی را نوشتیم جهاد را یعنی ما به برنی اسرائیل گفتیم شما مثل اونها ساکت نباشید شما در مقابل هر ظالمی سکوت اختیار نکنید بلکه کتبنا القتال ما جهاد را بر برنی اسرائیل گذاشتیم نوشتیم و اینه که انهو من قتل نفسم بغير نفسن هر کسی بکشن نفسی را بدون نفسی یعنی اون مقتول کسی را نکشتے بناحق او را می کشد او فساد فر ارد یا بدون فساد در زمین یعنی اون مقتول فسادی نکردے بعضی از فسادها هستن که باعث میشه اون مقتول خونش مباہ بشه. مثلا مرتد شده مثلا افیف, افیف و پاک بوده زنا کرده مثلا کسی را کشتے خب بدون فساد بدون قاتل کسی کسی را بکشد فکر کنم قتل الناس جمعه گوی همه انسان ها را کشت پس کسی که همه انسان ها را می کشت کسی که قاتل است، کسی که ظالم است، جلوش نشه همه را می کشند. ببینی خیلی از این حکام ظالم هستند، حکام جابر هستند که راحت انسان ها را می کشند. اما وقتی که گروهی درمیانش در, در مقابلش می ایستند و. جهاد را پیش میگیرم میبینید جلویشون انها گرفته میشه جلوی قتل گرفته میشه اگر جلوی قتل گرفته نشه نش قتل قتل میاره کشتن کشتن میاره شما اون داستان را شنیدید که در بنی اسرائیل یک فرد بود یک نفر بود که نوید نفر را کشته بود در احادیث صحیح این داستان آخر آمد پیش ایک درویشی پیش ایک ملنگی که اون عبادت میکرد خدا را گفت که من بخشیده میشم او گفت که حق بندگان را تو ضایع کردی تلف کردی هیچ امیدی برای بخششتون شدتون تو بخششتو نیست عصبانی شد این هم کشت گفت پس این هم صدمیش بعدن کسی دیگه گفت که بله راه بخششی برای وجود داره یعنی ببینید منظورم اینه که کشتن انسان ها اگر جلویش گرفته نشه دیگه چی میاره دیگه قتل ببار میاره اما وقتی که جلویش گرفته میشه با جهاد اون وقت جلوی قتل و خون ریزی گرفته میشه جهاد قبلا هم ارز کردم خدمت شما چند بار که برای جلوگیری از فساده جلوگیری از خون ریزی از جلوگیری از اینه که یک انسانی به نحق کشته نشه لذا الشيخ فرمايت بس كتبنا القتال هست انم دليلش هست كأنه من قتل نفسا بغير نفس كسي نفسي بدون النفس كشت یا بدون فساد كشت فكأنما قتل الناس جميعا اما ومن احياها كسي احيا کرد انساني يعني جهاد کرتا بوسيلة جهاد جلو ظالم گرفته شده جلو قتل گرفته شد خب شما جلو ظالم استادی این, این ظالم هر روز مردم را می ولی شما جہاد تشکیل دادی اون آخر گفت که خب بابا هم سلمی کنین دیگه من با کسی کار ندارم فکا انما الناس ناس گویا مردم را ہمی را احیا کرد ببینی در گذشته بعضی جاہ کی ناامنی بود ظالمان کفار هی مردم را میکشتن، هی بوم هی چند تونی ولی جہاد پیدا ادامه پیدا کرد، تا اینکه جهاد باعث شد جلوی اونها گرفت میشالا اینشکی کشتن نمیشه، پس این مجاہدین اقدامشون شون باعث شد شو که فکر نماهیان ناسا جمیا همه مردم را که زندگی کرد چی چیزی زندگی کرد یعنی ادامه زندگی را به انہا داد می جهادی شوند بود. ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات همانا آمد پیش آنها یعنی بربنی اسرائیل این بربنی اسرائیلی که ما جهاد را نوشتیم پیام ما هم را با بینات آمدند ثم این کثیر من بعد ذلك في الارد لمصرفون اما بسیار این نقض اهدست اما بسیاری بعدزین هم لمصرفون چی بودند متجاوز بودند یعنی اهد خدا را شکستند اینما جزاؤلذین یحاربون اللہ و رسوله ببینید بحث بحث جهاد بود گفتیم که من قتل نفسم بغیر نفسم او فسادم فی الارد اینجا بحث فساد فی الارد میاید مفسد فی الارد مفسد فی الارد کی راهزن هست کسی که قطع طریق میکند قطع طریق هست جلوی مردم را میگیرد و اون مردم را از بین میبرد میکشد مالشون را میبرد خب خداوند میفرماید که اینها هم این هم یکی از دلایل جهاد است این هم می طلبت که با اینها از طرف حکومت جهاد بشه اینها بوغات هستند اینها باغی هستند انما جزاء الذين بهترین جهاد هم همین که در مقابل این نو افراد که فساد ایجاد میکنند به جنگی لذا إن هذه الآية في هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل بعد أن غلز الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان فهم مسرفون في القتل مفسدون في الأرض درباره اونها یهاس که قتل کردند راهزنی کردند الله میفرماد جزای اونها یک می با خدا و رسول و سعی میکنند در زمین فساد را انجیقتالو اینکه کشت بیشند او یسلبو یا بدار زده بشند او تقطع ایدیهم یا که قط بشه دستشان و ارجلهم پایشان من خلاف برعکس یعنی دست راست و چپ، او ینفو من الارد یعنی که زمین نافی بشند تبعید بشند تبعید بشند اون چیزی که در کتابه هست و مشهور بر اساس قول امام شافیق رحمه الله یعنی به جای دیگه به شهری دیگه تبعید بشه اما از نظر امام ابوانیفه نفر فی الارض بمعنی زندان کردن زندان بشه. این را تو زندان بندازید خب ببینی خدای تعالی چند چیز بیان فرمود پند چیز هستند یقتلو او یسلبو او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف چار چیز او یون فورمنال حال علما و فقها میگویند امام ابو حنیفه و امام شافی هر دو میگویند که هر یکی مال یک صورت است هر یک صورت ببینید کسی که قطع طریق میکنه اینم دزد است اینم قاتل است کو فرق این با اون دزد و با قاتل دیگه چیه این مقداری جرم و جنایتش بیشتره چون اون کسی که دزدی میکند مخفیانه میکند کسی که قتل میکند هم مخفیانه میکند فرار میکنه اما این نه این اطراف خودش طرفدارانی دارد چریکایی دارد گروهی دارد و این دزدیش اون مخفیانه این علنی هست پس این جرمش بیشتره جرمش نسبت به اون بیشتره جرمش اینه یو تلو اگر کی کشته و موفق نشده مالی ببرد این چی بشه این کشته بشه فقط او یصللبو یا بدار زده بشه در صورتی که هم مردمی را کشته و هم مالشون رو برده البته عرض کردم این هر یکی برای یک صورتی است. امام مالک می فرماید اینا متعین نیستند. خداوند چند صورت را ذکر کرده خود قاضی بر اساس صلاح دیده خودش یکی از اینها را برای اون فرد با توجه به نوع جرمش تعیین کند. او قطعه دیدهم و من خلاف یا دست و پاشون برعکس قد بشه این در صورتی است که مال برده فقط کسی را نکشته. مال برده دست راستش را و پای چپش را چی کنند قط کنند او فو من الارض تبعید بشی یا تو زندان انداخته بشی به زندان بیفته این برای کسی است که فقط را بیجاد کرده وحشت ایجاد کرده موفق نشده نه انسانی را کشته، نه مالی را برده لذا اللہ می فرماید جزای اینها این هست ذالک لهم خزیون فی الدنیا این افراد برایشان رسوایی هست در دنیا در دنیا ذلت و خاری و رسوایی ولهم فی الاخره عذاب عظیم برای آنها در آخرت عذاب عظیم است اما اگر توبه بکنند توبه محاربین پذیرفته میشه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر کسانی که توبه بکنه قبل از اینکه که شما قدرت داشته باشی بر آنان ببینید این کی توبه میکنه توبه در باب توبه خدای عزواجل گناهانشون را میبخشی حقوق العباد بخشیده نمیشه یعنی هنوز دستگیر نشده توبه کرد بعدم که دستگیر شد خوب توبه کرد پیش خدا خدا او می میبخشی اما چون دزدی کرده دست پاش باید قد بشه. چون انسانی را کشته باید قصاص بشه لذا این که میگیم که توبه میکنه و توبه باعثی چی میشه بخشش او میشه بخشش اخروی نه دنیاوی این را داشته باشه که این بخش بخشش اخروی هست اِلَّا الذين تَعَبُوا من قبل ان تقدر عليهم توبه میکنه قبل از اینکه شما بر اونها قادر باشید قبل از اینکه دستگیرشون بکنید فعل ان الله غفور رحیم بدانید که خداوند جل غفور و رحیم هست بخشاینده اونها است و نسبت به مهربان است یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل از آنها و آنها عذاب آلیم. در آیات گذشته احکام محاربین را خاندیم کسانی که محاربه می کنند در زمین فساد ایجاد می کنند خلل و باعث خلال و نظم برای اهل زمین می شوند. خداوند تعالی برای انها تنبیهاتی ذکر فرمودند و بعضی از عذاب و حدودی که متوجه انها هست ان یقتلو او یسلبو او تقتع ایدیهم و ارجلهم الى آخری خاندیم اما انجا الله تعالی دستور میده مؤمنین را یا همون محاربین را که توبه بکنند برگردند به سوی خدا و قرب خدا را حاصل کنند خودشون را بهجای اینکه روز به روز دور می شوند و از خدا فاصله می گیرند سعی کنند که روز به روز نزدیکتر بشند یایین آمن الله ای مؤمنان اس خدا پروا داشته باشید اس خدا بترسید و بتقوا الیه الوسیله و بتلبید بخواهید بسوی الله وسیله را یعنی چه بخواهید بسوی الله وسیله را یعنی اسبابی که شما را به خدا نزدیک بکند اون چه که شما را به خدا نزدیک بکند اون را اختیار بکنید ببین وسیله چی هست اصل تعریف وسیله وسیله بر وزن هست. بمعنی به معنای ما یتوسل به الله من فعل الطاعات و ترک السيئات هر آنچه که انسان به وسیله اون به خدا وصل میشه به خدا نزدیک میشه من فعل طاعت از انجام دادن بعضی از طاعت عبادات هستن که شما را به خدا نزدیک می کند و ترک سیئات بعضی از سیئات و کارهای اشتباه هستن که انسان اگر اونها را ترک بکرد به خدا نزدیک می شود فس اینها را انجام دادن وسیلی ای می میشه به رسیدن به خدای عزوجل تفسیر این تفسیر روح المعانی و تفسیر مدارک نوشته در تعریف وسیله هویا کل ما يتوسل به هر چیزی که انسان به او متوسل بشه اسمش وسیله هست اما فاستعيرت لما يتوسل به الى الله تعالی این جا آورد آورده شده برای اون چیزی که انسان را به خدا نزدیک می کند من فعل اطاعتات و ترک سیئات پس معنای وسییل ای شد که شما را به خدا نزدیک بکند اما اون چیزهایی که انسان را به خدا نزدیک می کند و باعث س قرب به اونها انها را باید از قرآن و سنت بگیریم کچ بحث وسیله را که امروز یکی از مباحث اصلی هست در سور بنی اسرائیل الله با تفصیل بیشتری ذکر می کنیم اما اینجا به صورت خلاصه در حدی حد که مفهوم وسیله مشخص بشه عرض می کنم هر اون چیزی که ما را به خدا نزدیک بکن اون وسیله هست اما به هر چیزی نمی تونیم بچسبیم که ما را به خدا نزدیک بکن اون چیزهایی که از قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان وسیله اونها ثابت ما به اونها باید متمسک بشیم. اونها را باید وسیله بگیریم. مثلا از آن چیزها ایمان هست. ربنا آمننا. فغفر لنا. خود قرآن آموزش داده. که ایمان را به ایمان متوسل شو و بعد دعا کن خدا یا من ایمان آوردم ما ایمان آوردیم فاغفر لنا ما را ببخش یا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لیل ایمان ان آمین بربکم فآمنا خدا یا ما منادی شنیدیم که ندائی ایمان داد یا ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول خدای ما قرآن ایمان داریم و پیرو رسول تو هستیم پیرو سنت های رسول تو هستیم لذا دعای ما را قبول کن فکر تم لا در همه این آیات توصل به ایمان هست و توصل به سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزی که شما را به خدا نزدیک می کند ایمان هست و چیزی که شما را به خدا نزدیک می کند پایبندی بر سنت رسول صلی الله علیہ وسلم است. و همچنین چیزی که شما را به خدا نزدیک می کند اعمال هست فعل طاعات و ترک و سیئات حدیثی که معروف از مارس نفر که به غار پناه بردند و بعدان سنگی غلطید و دم در غار را پلم کرد هر کار کردن سنگ را نتونستن بیرون کنند اونجا هر یکی از اینها طاعات و ترک سیعاتی که داشت پیش خدای از و جل ارزه کرد یکی خدمت والدین را ذکر کرد یکی خدمت به یک فرد یک کارگری که مزدش منده بود و مزدش را نگهداری کرده بود برش مقدار زیاد مال شده بود اینم طاعت هست اینم کار نیک هست و یکی ترک سیئات را متوسل شد که گفت فلان وقت زمینه زنا برشفره هم آمده اما فقط و فقط از خدا ترسیده ترک کرده این اعمال را وقتی که به عنوان وسیله انها پیش خدای از و جل عرض و ذکر می هر بار که کسی می گفت مقداری از سنگ فاصله می گرفت از دماغار تکان می خورد ای برای اینها ایجاد می شد بنا این اینها هستند که انسان میشه به اینها متوسل بشه علاوه از این اسماء الحسنا و صفات باری تعالی هستند که در آیه شریفه آمده الله الاسماء الحسنا فادعوه بها خدامت اسماء حسنہ ادارت نام های زیبا ادارت شما بوسیلے اسماء حسنہ دعا کنید و از خدا بخواہید مثلا شما دعا کنید یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رحمان و یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اسمائی کے در حدیث هم آمده که با این اسما خدا را صدا بزنید با این صفات پروردگار خدا را صدا بزنید و دعا بکنید پس صورت دیگر از توسل توسل جستن به اسما حسنای بروردگار هست نام‌های زیبای زیبا رب العالمین هست صورت دیگر از توسل جایز که ثابت هست دعای زنده ها کسانی که زنده هستند حیات دارند شما انها رو میگه برای ما دعا کن صحابه در زمان حیات ان حضرت صلی علیه و وسلم بار بار مراجع می کردن برای مقاصد مختلف خدمت رسول الله کہ یا رسول الله برای فلان حاجت دعا بفرمائی دعا بفرمائی باران نیست یکی میگف دعا بکن برای رزق روزی که من تنگ دستم یکی دیگه می گفت دعا بکن برای فلان حاجتی من اماره فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ آزم عمر بود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر را گفت که ما را از دعایت فراموش نکنی یا اینکه درباره قرنی به عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفت که هر وقتی که این آمد چون خدمت مادر می از او دعا به طلب از او دعا خواهد که مقبول دعا هست پس یک انسان صالحی که شما احساس میکنید مقبول دعا هست پیش او میرید و به دعای او متوسل میشید میگه که دعا کن خدا منو ببخشه دعا کن خاتمه ایمان با ایمان بشه دعا کن که من آدم دیندار و با تقوای باشم برای ایمانم دعا کن برای توفیقم دعا کن برای آخرتم دعا کن این نوع توسل هست که از دعای صالحین صالحینی که حیات داشته باشد بعد از وفات که انسان متوسل به دعای آنها باشه چنین چیزی ثابت نیست هیچ کسی از اصحاب آن حضرت صلی الله علیه و وسلم نیامدن آمدن بر قبر شریف که از پیغمبر طلب بکنن دعا بکند حتی نیاز به باران بود حدیث معروف است عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رفتم برای نماز باران نیامدند بر قبر آن حضرت نی که یا رسول شما دعا کنید اموی پیغمبر را بردند عباس رضی الله تعالی عنہ را بردند و اونجا دعا کرد گفت که اللهم انا کنا نتوسل بی دعای نبی که پروردگارا ما قبلا به دعای پیغمبر توسل می جستیم اون وقت که پیغمبر حیات داشت الان کیشون نیست الان متوصل میشین به دعای عم نبیت اموی پیغمبر عباس آمده و شما دعای عباس را قبول کن و بعد به عباس گفت که عباس تو دعا کن که خدا باران بده پس دعا به دعای احیا به دعای زنده میشه که توصل گرفت اما اموات چنی چیز ثبوتی ندارت لذا اینا صورت های جواز توسل هستند که انسان میتونه متوسل بشه اگر کسی به محبت پیامبر متوسل بشه با توجیح درسته به این معنی که محبت پیغمبر جزء ایمان است خدا یا به حب نبیت به محبت پیامبرت. یعنی من ایمان دارم که پیغمبرت را دوست دارم پس این در واقع توسل به چی هست؟ به محبت پیغمبر محب توصیل به ایمان است. همین که ربنا آمادنا به منزلت و الرسول خدای من چون تابع رسولی تو هستم دعایم را قبول بکن. پس توصیل به سنت رسول، به محبت رسول که با رسول الله توصیل که با رسول الله محبت داری، اینا همه ثبوت دارند. اما به حق خدای به حق فلان یش کسی بر خدای از حقی ندارد، حقی که وجوبی باشد، خدا فضل بیکنه بر بندگانش. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که شما از خداوند فضل خدا را بخواهید. گفتن شما هم یار رسول گفت: بله منم تا زمانی که فضل خدا شامل عالم نشه، به جای نمیرسم. منظور اینکه که بر پیامبران وقتی که فضل خداونداس غیر پیامبران چه حقی دارند؟ لذا هیچ حقی مخلوق بر خالق ندارد لذا دعا طلب کردن با وسیله یکی از وسیله های جائز باشه بلی اما بعضی از اموات استمداد می کنند و این را توسل می گویند این توسل توسل ناجائزی هست کجا ثابت شده کسانی که فوت کردند اگر خوب بودند در بهشت خدا و در روح و رعیان هستند اگر بد بودند به حال خود گرفتار هستند اونا برای ما چی میتونم بکنه اونا خودشون مخلوق خودشون آجیست خودشون ناتوان، لذا استمداد از غیر خدا کمک گرفتن از غیر خدا به ایمانه به ایچ وجه درست نیست اما دعا کردن به به جاه نبی به آبروی پیغمبر به حرمت پیغمبر اینها ارز کنم که بین علماء ما اختلاف بعضی علماء میگن که ثبوت نداره اینا کراحت داره اینا گفته نشه و بعضی از علماء میگویند که اشکال نداره چون بعضی از بزرگان اینگونه دعا کردند این اختلاف در حد نیست که این را زیاد آدم کش بده ولی وقتی که یه چیز اختلافی ما داریم بهتر نیست که به چیزی ما متواصل بشیم که غیر اختلافی هست اختلاف تو هیچ وجود ندارد الا ای حالا این بحث خلاصش هست بعضی روایت هاستن که انشاءالله من در اون بحثی که اونجا در سوره بنی اسرائیل میاد ونجا عرض میکنم لذا الله می, می فرماید ای مؤمنین از خدا بترسید و ابتغوا الیه الوسيله و بتلبید بسوی الله وسیلرا یعنی اون چیزی که شما را به خدا نزدیک کند وجاهدوا فی سبیله جهاد کنی در راه خدا لعلكم تفلحون تا اینکه شما رستگار بشید شما کامیاب بشید ان الذين اما اگر اگر شما به سوی خدا نہیں آمدید راه کفر را ادامه دادید راه ناشکری و ناسپاسی و پشت دادن به خدا را ادامه دادید اون وقت قیا آخرتی و محشری بسیار مهیب بسیار خطرناک انتظار شما را دارد این تخویف اخروی است الله می فرماید ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا همانا کسانی که کف کردن لو ان لهم بالفرض اگر باشد برای آنان ما فی الارض جمیعا تمام خزائنی که در زمین هست و مثله همین اندازه که تو زمین هست مثل آن دو برابر آن برش باشد لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامة تا فدی فدیه بده انهارا از عذاب روز قیامت یعنی بخواد که همه اینها را فدیه بده تا از عذاب خیامت نجات بیابد خداون می اون اونجا جای رشوه نیست اونجا جای نجات نیست ما تقبل منهم پذیرفته نمیشه از آنان ولهم عذاب علیم برای این افراد این افرادی که پشت دادن به خدا کفت کردن عذاب دردناک هست عذابی که اون عذاب دردناک را باید تحمل بکنند. هر چی که میخواند از اون عذاب بگریزند، از اون عذاب نجات بیابند، بهشون اجازه داده نمیشه. یوریدون ائی اخروجو من الناری و ماهم بخارجی نمنها میخواند که خارج بیشند از آتش، از آتش. خارج بشن نجات بیابد اما رب العالمی می فرمد وما هم بخارجین خارجی نمینها این ها عذاب آتش خارج نمی شون نمی گزارند انها را انجا هستن با گرزهای آهنین تاکی سرشون ربی رمیارن می زنن میوفتن افتن بی قعر جهنم نجات بده و لهم عذاب و مقیم برای این افراد برای این گروه عذاب دائم هست عذاب همیشگی هست وَالسَّارِقُ و فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا بما کسب اللَّهُ من الله. عز الله جل چون بحث محاربه قبلن گذاشت و محاربین کسانی هستند که قطع طریق می کنند رحزنی کنند خب بعضی سورت های دیگه هست که افراد دوستی می کنند اما در این دزدیشون محاربه نیست ایجاد وحشت نیست دزها معمولا مخفیانه دزدی میکنن طوری که صاحب مال اصلا متوجه نمیشه که دزد آمد متوجه نمیشه که جیبش زد یا متوجه نمیشه که خونش آمد و رفت لذا این جرمش نسبت به اون محارب اون کسی که هم وحشت ایجاد کرده کم تر است لذا حدش هم فرق میکنه اونجا دست و پا بود دست راست و پای چپ اینجا فقط یک دست است و سارق و, و سارقت و دوست چه مرد باشد چه زن باشد چه مرد باشد چه زن باشد چون اگر فقط اسم مرد برده بشه امکان داره که کسی بگه زن در این حکم داخل نیست فرقی نمی کند از هر جنسی باشد فقط او عیدی هما دست را قطب کنید جزایم به ما این جزایی هست و حدی هست حد اون چیزی که کسب کرده هر دو نکال من الله درس عبرتی از, از جانب خدا خدای اززوجل این درس را و این قطعیت را دستور داده که برای دیگران عبرتی باشد واقعا حدود الهی اگر اجرا بشه و اگر اون نظام پیاده بشه برای دیگران عبرتی خواهد بود در تمام حکومت حکومت یک قرنی که مثلا مردم زندگی میکنند و هم دیگر را دیدند اگر سه مورد چهار مورد پنج مورد چنین پیش بیاید بعد از اون اصلا شما نخواهید دید یا بقیه حدود اگر اجرا بشند چند مورد اجرا بشه بعد از اون دیگه هیچ جرمی از اون نوع جرائم شما در جامعه نقایی دید چون که مردم حدود الهی را قائم نمی کنند خدا وقتی گفته درس عبرت هر که ببینه عبرت میگیره گیره بقیه می لرزه چنین کاری نمی کنند بنابراین اگر امروز در دنیا هرچی فساد هست می بینیم که جرائم روز بروز بیشتر میشه. از یک طرف پلیس بیشتر میشه، از یک طرف دوربین های مخفی بیشتر میشه، از یک طرف نمی دونم رسیدگی به جرم و جرائم دادگاه های خاص تشکیل میشه ولی بعض هم جرائم بیشتر میشه دلیلش اینه که اون مبارزه ای کدار میشه با جرائم مبارزه ای نیست که خدا تعالی فرموده خدا میفرماید فقط حویدی اوما جزام بما کسبا نکالم من الله، این یک عبرتی هست درسی است از جانب خدا که صادر شده والله عزیز حکیم خداوند غالب است هر دستوری میتونه بده ولی این دستورات را که خدا داده تو این دستورات حکمت است تو این دستورات حکمت است با چهار نفر اینجا که ما خاندیم یک نکته که اونجا فراموش شد خدمت شما کنم بحث محاربه و بحث قطع و طریق کسانی که راهزنی میکنند و مال مردم را مورد تعرض قرار میدهند جان مردم را در قتل میندازن اونجا شما خان دیدی از موضوعات اعدام بود این اعدام مرادش اینه که در ملای عام این اعدام بشه تا برای بقیه مردم درسی بشه چار نفر را پنج نفر را در ملکی اگر این کار را بکنن همون ملک و همون کشوری که راهزنی زیادن باشه تمام راهزنها خودشون را جمع می کنند تمام دیگه برای اونها درس عبرتی میشه دوباره نزدیک روند. این کار نمی رود لذا چون که این عبرت نیست برای از طرف حکومت ها مردم جری هستند مردم راه فرار را بلد هستند چکار بکنند لذا الله می فرماید والله عزیز حکیم در این هم غالب است این احکامی که صادر میکنه حکمتاتش هست این حکمتات یکی از بزرگترین حکمت اینه که هر وقتی که اجرای حدود باشه شانطوری باش که حقش هست جلوی جرایم گرفته میشه جلوی مفاسد گرفته میشه امنیت حاکم میشه کسانی که دنبال فساد هستند خوف و وحشت تمام بدنشون را میگیر مجبور میشن دست از این کار بکشن فمن تاب من بعد ظلمه اما خداوند عز و جل زمن این جزای اینها را و کیفر اعمال اینها را بیان فرموده حد و حدود اینها را بیان فرموده تشویق به داده؟ تشویق به توبه فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح هر کسی توبه بکند بعد از ظلمش و اصلاح بشه ظلم کرده توبه کرد و اصلاح شد فإن الله يتوب عليه همان خداوند عز و جل بر او رجوع کند یعنی خدا توبهش را قبول میکند اِنَّ الله غفور الرَّحِيمُ همانا همان عز و جل هم بخشاینده و هم مهربان هست ببینید معناش اینه که معناش این نیست که حدود ساقط میشه این بخششش در رابطه با آخرت است. اگر کسی توبه نکند هم در این دنیا حد برو اجرا شده هم در اون دنیا به شکنجه و عذاب الهی گرفتار میشه اما اگر توبه کرد اینجا حد الهی اجرا میشه قطیت از قطیت میشه دیگه هست، او انجام میگیرد خدا در تو رو میبخشد اما اگر توبه نکند هر دو جا عذاب هست برای شد تعلم ان الله له ملک السماوات والارد این تاکید هست بر تعمیل احکام و تعمیل دستورات خدای عزوجل که باید به اونها عمل بکنیم چون در مقابل ما چنان الله هست که پادشاه آسمان ها و زمین است همه اختیارات به او هست مختار کل هست بعضی میگن که این در رابطه با اون آیه شریفه هست با اون مربوط است که شما خاندید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم فتوای کفر مسیحیت صادر شد چون عیسی را فرزند خدا می نامیدن و می خواندند خدا از زوجال اینجا دلیل ربعم می فرمد که چرا خدا نیازی به فرزند نداره نیاز به فرزند کسی داره که محتاج باشه کسی داره که فرزندش فردا بازو پیریش بشه اسای پیریش بشه کسی داره که نیاز به نائبی داره که تو کارها کمک بکنه اما خدا از وقتی که نیازی نداره ملک خدا پادشاهی خدا تصرفات الهی تمام زمین و آسمان را در بر گرفته او چی نیازی به فرزند و پسر علم تعلم آیا نمیدانی ان الله له ملک السماوات والارض همانا الله برای اوس پادشاهی آسمانها و زمین عذب من یشا هر کسی را بخاد او عذاب میده. و یغفر لمن یشا هر کسی را بخاد می بخش او مختار کل اون اختیار مطلق داره و الله علا کل شیئ قدیر خداوند بر هر چیز قادر است نه و مادر است خدا از که بر هر چیز قادر پس خدا را فریاد بزنید از خدا استمداد بطلبید یا ایوها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اینجا هم تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و چون پیغمبر وقتی که این احکام را تبلیغ میکرد این مسائل را بسیاری از منافقین بودند که اذیت می کردن و کفار بودند که به جای اینکه بسوی ایمان بیایند بیشتر بسوی کفر می رفتند خدا تعالی تسلی داد به را و فرمود که شما از این توطئه های منافقین نگران نباش ناراحت نباش یا ایو رسول ای رسول من لا يحزن كال الذين يسارعون في الكفر شما را حزین نکند غمگین نکند کسانی که در کفر مصارع دارند یعنی در کفر و اعمال کفری از هم دیگه پیشی می گیرند از هم دیگه سبقت می گیرند من الذين قالوا آمنا بی افواهیم منظور چه کسانی هستند منافقین از انهایی که می گویند ایمان آوردیم بی افواهیم یعنی با دهانشون می گویند اما ولم تو من قلوبهم قلبشون ایمان نی که محل ایمان قلبشون ایمان ندارد ببین این شماره ناراحت نکند این نفاق انها و همچنین و من هادو انهایی که حقیقتا یهودی هستن منافقین در واقع بیشترشون پشت پرده یهودی بودند سمعون للكذب سمعون لقوم آخرین خدای از و اینجا دو وصف بیان می فرماید یک وصف وصف اموم یهودی ها هست یک تعریف تعریف چی هست اموم یهودی ها هست و تعریف دوم دو یا وصف دوم دو وصف ملاهایشون هست آخوندهایشون هست اموم یهودی ها را خداوند می فرماید للكذب یعنی اینها عادت کرده بودند که همش دروغ بشنوند سماعون الیلکذب سماع میدونی مبالغه هست مبالغه سامع هست سامع یعنی شنونده سما یعنی خیلی خیلی شنونده خیلی شنیدن چی شنیدن دروغ شنیدن ببینید عوام یهود مثل بسیاری از عموم مردم ما که امروز همین دوست دارند همیشه دوست داشتند که به اونها احکامی گفته بشه که مشکل نباشد و مطابق هوای نفس باشد خواهشات نفس باشد هیچ نوع سنگینی برای اونها داشته نباشد برای اونها از طرف ملاها حرفهای کن باشد سخنانی بگفته بشه که همیشه دلشون را خوش بکنه شاد بکنه به همین خاطر اونا همیشه میگفتن شما هیچ مکلف نیستید شما همین که پیغمبر زاده هستی بسی شما را شما همین که نسبتی با پیغمبران داره همین شما را به بهشت میبرید لازم نیست شما کاری بکنید یک سفره اگر فقط شما این سفره را آماده بکنید که چار نفر غریب و چار نفر آخوند بشین اینجا بخوره همین کافیه برایش با. یعنی همیشه دروغ شنیده بودند همیشه احکامی را به اونها گفته میشد که انجام این احکام زیاد مشکل نیست احکام واقعی دستورات واقعی خدا برای اونها گفته نمی امروز هم بسیاری از مسیحیان از بس همین دروغها را شنیدند به اونها گفته میشه که شما هر چی گناه می‌کنی آزادی شما هر چی که جنایت کردی فقط همون روز میلاد عیسی که 25 سپتامبر است بیا تو کلیسا یک بار حضور داشته باش همین حضوریت باعث میشه که تمام پرونده یک سالت پاک بشه یعنی چیزهای در میان ما مسلمانانم گاهی یک سری خرافات گفته میشه که شما مثلا هر کار می کنید هر چی گنا می کنید فقط فلان روزها فلان عمل را بکنید همه پرونده زندگی شما پاک میشه این اینو تفکرات تفکرات چی هست سمعون للكذب همهش دروغ شنیده نه خیر خدای عزوجل احکامی را نازل فرموده دستوراتی داده پس این وصف عموم مردمشون هست که فقط چی شنیده بودن دروغ شنیده بودن وصف آخوندهاشون چیه ملاهای یهود چیه اکالون لسحط جلوتر جلو میاد اونا عادت کرده بودن خیلی حرام میخوردند اکالون جمع آکل هست آکل یعنی خورنده اکال یعنی خیلی خیلی میخورد چی میخورد سحط حرام میخورد همیش زندگیش با حرام ہے. یعنی این قدر به مردم دروغ گفتند و از مردم در مقابل دروغات پول دریافت کردند که تمام زندگیش شده حرام لذا مردم ما و علما ما باید از این دو وصف دور باشند یکی این که فقط انتظار داشته باشند احکامی که مطابق هوای نفسی باشه مطابق میلش نه نخیر در دین اسلام جهاد هم است که جهاد صرفا با نفسیه مخالف است انفاق هم از خرج کردن در راه خدا بی یتیم به بمستمند نماز هم است از کنم تمام اعمال گرچه عمل شاق نیست خدا آسان فرموده اما برای کسی که تنبل هست و تنپروری را عادت کرده و دنبال همیش هوای نفس بوده برای او بله مشکل است و باید علما هم حقگو باشند حرامخوار نباشند فقط فکر جیب مردم نباشند بلکه واقعیتها را به مردم بگوین ولو اینکه خودشون در فقر و فاق زندگی بکنند لذا الله عز و این اوصاف را برایشون بیان می اولا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرین یهودی ها, ها زیاد دروغ گوش میکنند و بعض اینجا که میان پیش پیغمبر گوش میکنند لقوم آخرین یعنی اخبار مجلس رسول الله را به احبار راهبانشون میبرن میرسانند و المراد انهم عیون علیه علیه الصلاۃ والسلام القوم مراد اینه که اینها جاسوسند عیون هستند جاسوسند برای ملهایشون لقوم آخرین کدام قوم آخرین لم یاتوک که اونها پیش شما نیامدان ای پیغمبر یحرفون الکلمه من بعد مواضع اصلش بنده به صورت کلی عرض کردم اما این آیات اشاره به یک جریان خاصی هم دارند اون جریان خاص اینی که در یهود خیبر اونایی که در خیبر زندگی میکردن از مدینه فاصله داشتند در میان اونها یک مرد و یک زن از یهودیها مرتکب زنا شدند مرتکب کار فحشا شدند در کتاب تورات حکم زانی و زانیه سنگسار بود رجم بود اما احکام در تورات متفاوت بود چطور متفاوت بود؟ این تفاوت را ملاها ایجاد کرده بودند علمای دین فروش ایجاد کرده بودند برای قشر ضعیف این همون احکام را چی می کردن اجرام می کردن، اما برای قشر قوی کسانی که از خانواده وجیح و بالا بالای بودند برای اونها احکام تغییر می افت. لذا این دو نفر از اشراف بودند از کسانی که یهودی ها به اونها اعترام میگذاشتند. علماء نخواستند که علماء اونها که حکم تورات را اجرا بکنند نخواستند که سنگ سار بشند به این خاطر گفتند شما برید پیش پیانبر مسلمانان برید پیانبر خودشون نمی دونستند اونجا برید اگر ایشون حکم کرد به چیزی دیگر چون در هر مسئله اونها می دیدن که در اسلام نرمش بیشتری آمده در اسلام نسبت به دین یهود آسانی و سهل هست گفتن شما برید پیش اون پیغمبر معلوم میشه که پیغمبر رو هم به عنوان نبی خودم به رسمیت میشه ولی میگفتن پیغمبری ما نیست ما بنی اسرائیل هستیم پیغمبر ما باید از قوم خود ما باشه لذا گفتن شما برید پیششون اگر حکم دیگری صادر کرد تخفیفی بود مثلا شلاغی چیزی خب همون اجرا بکنی اگر نه او هم مثل تورات دستور رجم داد و سنگسار بعدا نکنی دیگر برگردید اینم خدمت شما کنم که توصیه کردم به همین افراد خودشون که اگر پرسید که دستور تورات چیه بگین دستور تورات اینه که کسی اگر دزدیکا، اگر زنا کرد چهرهش را سیاب بکنند روی اولاغی روی حیوانی سواری سوارش بکنند برعکس سوارش بکنند تو شهر بگردونند تشهیرش کنند و بدنام رسواش بکنند که چرا چنین کاری کرده یعنی کشتن نه چیزی دیگه اینجا وقتی که اینها آمدند آن حضرت صلی علیه و سلم از اونها پرسید دستور کتاب خودش ما چیه اونا گفتن در کتاب ما در تورات همین تشهیر است و چهره سیا کردن و اینها. آن حضرت می دونست خدا تعالی اعلام کرده بود که در تورات حکم چیه در تورات حکم سنگساره اینجا بود که ان حضرت گفت بیارید یک عالمی از علمای خودتون بخونه تورات را من ببینم اونا رفتن عالمی را آوردن به نام عبدالله ابن سوریا و اون عبدالله ابن سوریا داشت تورات را میخاند همون قسمت که رسید که بحث سنگسار و رجم هست از اونجا نخاند و ما بعدش را خاند دست روش گذاشت از علماء یهود که مسلمان شده بود عبدالله ابن السلام در جلسه تشریف داشت و او حافظ تورات هم بود گفت یا رسول الله این غلط میخونه دستش را برداشت گفت اینجا حکم رجم و حکم سنگزار کردن هست بالاخره پیغمبر خدا صلی علیه و سلم گفت که در دین ما هم حکم همینه فرق نمیکنه تورات و قرآن هر دو سنگزاره اجرا بکنید اونها گفتند قبول نکردند اونها رفتند تا اینکه ان آن حضرت صلی اللہ علیہ گفت غیر از این دیگر راهی وجود نداره الان در بعضی روایت هاست که بالاخره خودشون سنگسارشون کردند اما اینجا برای پیغمبر اختیار داده شده در این آیات که اگر تو میخوای بینشون داوری بکن بینشون فیصله بکن اگر میخوایی نکن ببینید حاکم مسلمان وظیفش هست که کفاری که اونجا به عنوان اهل زمه هستند و زندگی می کنند در بین اونها هم باید فیصله بکند در بین اونها هم باید قضاوت بکند حدود را احکام را اجرا بکند اما اگر کفار از جای دیگر آمدن از یک منطقه دیگر که اهل زمه نیستند اهل چی هستند اهد و پیمان هستند معاهد هستند چون اون زمان خیبر مال یهودی ها بود تحت حکومت اسلامی نبود فقط معاهد بودند عهد و پیمان داشتند لذا اونجا به پیغمبر اختیار داده شد میخوای تصمیم بگیری میخوای فیصله نکنی لذا ان حضرت صلی الله عليه و سلام اونجا چون که تحت حکومتش نبود هنوز نمیتونستان که حکم را اجرا بکنن فقط راهنماییشون کردن لذا الله می فرماید که یحرفون الکلمه من بعد مواضعه تحریف میکن اینهایی که لم یاتوک پیشتون یامدان این علما ای سویی که پیش شما نه آمدند یحرفون الکلمه تحریف میکنن جابجا میکنن کلم جا بجا را یعنی کلم کلمات کلام الله را کلمات کتاب الله را یعنی تورات را من بعد مواضعه بعد از موازی، یعنی چه؟ یعنی وضع الجلد مکان الرجم، بجای الرجم چی گذاشتند رجم، جلد گزاشتند، یعنی بجای سنگ سال کردن، شلاغ زدن گذاشتن و بعد، به اون پیروان خودشون چی وسیعت کردن؟ یقولون این اوتیتم هذا فخذوه، می گویند اگر همین حکم داده شدید بگیرید یعنی اگر اونجا هم گفتند بگیرید قبول کنید و اگر این حکم داده نشدید اگر به این حکم شما را اونجا حکم ندادند شما دیگه غیر از این سنگسر را قبول نکنید الله عز وجل می فرماید این انسان این انسان ها که گمراه شدن راه هدایتی برایش نیست و من یرید الله فتنتَهُ فلن تملک له من الله شیئا هر کسی خدا بخواهد این قانون الهی هر کسی خدا بخواهد فتنته ای اضلاله گمراهی او را فلن تملک له من الله شیئا شما هرگز مالک نیستی برای او از عذاب خدا هیچ چیزی قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا نفعا لذا خذائت علمي فما إيه أهل الكتاب رخذا نخاس ذكينا تجيب شانت این هدایت بشن، این پاک بشن اولئیک الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ ان يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ اینها کسانی هستن که خدا نخواست اَنْ یطهر قلوبهم. این که دل هاشون پاک بشه این هدایت نصیبی شون بشه چون اینها ها انقدر تمرز و سرکشی کردن انقدر دروغ گفتند حرام خوردند که قابل هدایت نیستند نتیجه این همه حرام خاری و دروغ و کفر گویی چی میشه لهم فی الدنیا خزیون ولهم فی الاخره عذاب عظیم برای آنان در دنیا رسوائی هست و برای آنان در آخرت عذاب عظیم است عذاب بسیار بزرگی هست برایشان که اینها کتمان کردن دستور خدا را پنهان کردن سمعون للكذب اکالون للسحت از کردم این دو وصف مال هم شون و مال عوامشون عوام عادت کرده بودن زیاد دروغ بشنوند در احکام و همین دروغ شنیدن را دوست داشتن دوست داشتن احکامی بهشون گفته بشه که مطابق میلیشون باشه مطابق هوای نفسشون باشه تو اون هیچ هیچنو مشکلی برایشون نباشه و خواستشون اولمایشون عادت کرده بودن که فقط حرام بخورند و از طریق حرام ارتزاق بکنند هر طور الله می فرمد سمعون للكذب زیاد شنونده دروغ بودند اکالون لسحد و زیاد می حرام را منظور نزوراتی که برای غیر خدا بود پولی که در مقابل تحریف بود پولی که گاهی اخندائشون علماشون احکام را توری تفسیر میکردند که به باشه تا چیزی بگیرند لذا به پیغمبر گفته شد فین جاءو كفحكم بينهم او اعرض عنهم اگر پیش شما آمدن ای رسول الله شما بین اونها حکم کن قضاوت کن فیصل کن او اعرض عنهم یاذنها اعراض کن و ان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا اگر از اونها اعراض کنی هیچ ضرری به تو نمی رسانی یکی فیصله نکنی چرا؟ چونکه اونها مال اینجا نبودن این الله يحب المقصدین على ای حال خدا و جل انصاف کنندگان را دوست دارد باید بین اونها انصاف بشه اون چیزی که واقعیت گفته بشه و بعد خدای اززا و جل ملامت می کند همین اهل کتاب را چرا این ها شما را داور قرار داده چرا این حکم رجب را از شما می پرسند در حالی که تو تورات این حکم واضح هست ببینید قبلا خدمت شما عرض کردن بعضی میگن حکم سنگسر تو قرآن نیست این اشارش هست تمام احادیث را شما ببینید بررسی کنید در رابطه با تفسیر این آیه همین واقعاتی که خدمت شما عرض کردن بیان کردن و کیفه يحکمونه که چگونه شمارا حکم قرار میدهند چگونه را فیصل کننده خودشون قرار میدن در حالی که وعندهم التورات فیها حکم الله پیشونها تورات هست در تورات حکم الهی فیصله الهی تمام حدود الهی هست ثم يتولون من بعد ذلك سپس پشت میده هم بر میگنم بعد از این و ما اولایک بالمؤمنین خداوند میفرماید اینها مؤمن نیستند اینها اعتقادی ندارند اگر اینها اعتقادی حتی به تورات خودشون داشتند حکم تورات را پشت سر نمیانداختند و ما اولایک بالمؤمنین بیشیم من کتاب الله لا تورات نبی تورات عمل ایمان دارن و ایلا عملو بها حتما عمل میکردند و آمنو بما یصدقو به اون چیزی که تورات تصدیق میکنه ایمان می آوردن لذا وما اولای که بالمؤمنین اینها هیچ ایمانی حتی به تورات ندارن و باست خدای تعالی در ادامه کتاب تورات را تعریف می فرماید که اون تورات اصلی اون توراتی که در اون تورات تحریف نبوده اون توراتی که واقیت تو اون تورات بوده اون تورات سرابا نور بوده هدایت بوده انا انزلنا تورات فیها هدا و نور همانا ما نازل کردیم تورات را که در تورات هدایت بود و نور بود هدا هدایت عملا ببخشی علما ایمانا اعتقادان و نور عملا یعنی چه یعنی اگر می‌خواستند راه حق را و راه سهیرا ببینند چیکار می‌کردند هم به تورات مراجعه می‌کردند اگر می‌خواستند عمل بکنند هم بطورات تورات مراجعه می‌کردند لذا ان انزلنا التوراته فيها هدى والنور يحكم به النبيون الذين اسلموا للذين هادو قبلانم خدمت شما عرض کردم که امبیایی که مبلغ تورات بودند تنها موسی و هارون نبود از زمان موسی علیه صلی اللہ تا زمان عیسی که بعضی از مفسرین میگه حداقل دقل هزار پیغمبر فقط در همین زمان بودند اینها همه مبلغ تورات بودند و اینها بر اساس تورات حکم کردند یحکم و نبیون به وسیله تورات حکم کردن انبیاء الَّذِينَ اسلموا کدوم انبیاء؟ اون انبیایی که تسلیم بودند اعتقادا و عملا در مقابل تورات این ها حکم می کردند بکی حکم می احکام تورات را برای که بیان می فرمودند هادو هَادُوا والاحبار برای کسانی که یهودی شدند برای کسانی که دراویش یهودی ها بودند برای کسانی که احبار بودند علمائشون بودند این برای آنها تفسیر میکردن. از اینجا معلوم میشه که در ملت های گذشته و در امت های گذشته هم عوام بوده هم خواص باز خواص دو گروه هستند یک گروهی که اهل علم اهل کتاب اند باسواد و دانشمند بودند و یک گروهی که بالاخره علمی نداشتند اما دارای ملنگی بودن به اسطلاح ما درویش بودند، عابد بودند، زاهد بودند. یک گوشه نشستن ذکر و یاد خدا کردند. اینها هم تا زمانی که در مسیر حق باشند از جاده شریعت منحرف نشوند اینها هم بر حق هستن مسیرشون مسیر درستی هست لذا کسانی که یهودی شدند و کسانی که درویش اونها ربانیون اونها بودند و که علما اونها بودن برای اینا بیان میکردن بمستحفزو من کتاب الله این با با سبب یاست انبیا تشری کردن تورات را به سبب آنکه استحفزو من کتاب الله یعنی به اونها معموریت حفظ کتاب الله داده شد معموریت چی تا زمانی که انبیا بودن تورات تحریف نشود معموریت داشتن که کتاب خدا را حفظ کنند اما بعد از اینکه انبیا نبودند دست ملاها و آخندها افتاد، اینها متاسفانه تحریف کردند. اینها مطابق میل خودش، انبیا محسومند. اما اینها نه. اینها مطابق هوای نفس مردم دارا بودند. و کانو عليه شهداء، و خودشون هم بر این شهدا بودند. شهدا دو معنی هست. یکی اینکی گواه و یکی اینکی بیان کننده قبلا هم این آیر خدمت شما توضیح دادم که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به عنوان چی است؟ شاہدن و مبشنن شاہد بمعنی گواه نیست شاہد بمعنی چی است؟ بیان کننده عق اینجا هم و کانو علی شهدا یعنی این علماء این انبیائی که اینها معلم تورات بودند مبلغ تورات بودند اینها بیان کنندگان بودند ای شهدا رقبه يعلمونه و يبينونه تفسیر مذهبی بیان میکردند و به مردم تعلیم میدادند لذا خداوند عز و جل میفرماید که اینها وقتی که حکم کردن به اونها گفته شد به علماء یهود به کسانی که عالم تورات بودند فلا تخشوا الناس وخشونه شما از مردم نترسید خطاب مال علماء یهود است از من خدا بترسید و لا تشروا بایاتی ثمنا قليلا و در مقابل آیات من پول اندک نگیرید یعنی آیات من را تحریف نکنید به خاطر پول به خاطر متاع به خاطر کنم درهم و دینار آیات من را تحریف نکنید نه تحریف لفظی نه تحریف معنوی تفسیر بما لا یرضا قائله نکنید چون هرکس کسی این کار را بکند و من لم يحکم بما انزل الله فالائک هم المفلحون هرکس کس هم الکافرون هر کسی که حکم نکند بیمان الله یعنی اون چیزی که خدا نازل کرده بر اساس اون حکم نکند بلکه تحریف بکند کتاب را از خود درست کند ببینی ومن لم یحکم اینجا مراد احکام خود ساخته علماء یهود و نصارا میباشد که از خود درست کنند و احکام خودشون رب بجای احکام خدا جا بزنند فاولائک هم الكافر انها کافر هستند یعنی به اصل کتاب خدا اعتقاد ندارند به اصل کتاب خدا باور ندارند و باور اونها چی هست؟ اون چیزی که از جانب هوای نفسشون در مسنت امام احمد رحمه الله یک روایتی هست که این آیه را تفسیر کرده و من لم یحکم ای من لم یعتقدم و من لم یحکم یعنی چی؟ لم یعتقد یعنی وقتی که به ما انزل الله اعتقاد داشته نباشد باور داشته نباشد و هر چیزی که دلش میخواهد چی بکند دلش میخواهد حکم بکند پس این فرد کافر است این افراد که تحریف میکنند کافر هستند این در رابطه با کی بود علما یهود و کتابنا علیهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن ببینید در واقع این آیات را که خاندان رب تشربا گذاشته من ارز نکردم در گذشته احکام بود بحث سرقت بود نه در رابطه با سارقین خداوند فرمود فقط تعو ایدیهم اما تنها سرقت سرقت مال نیست سرقت های دیگری داریم که اینجا بعد از اینکه تحریف علمای یهودی را ما خاندیم این سرقت سرقت معنوی هست این دزدی دزدی دیگری هست که ایمان را می‌دزدد و حقائق می الزند و چیزهای دیگر جایگزین اونها میکنن لذا الله عز و جل میفرماید اینهایی که اینو سرقت ها را میکنن تحریف میکنن اینها در واقع هستند کافرون هستند و کتمنا علیهم فیها ان النفس بالنفس الله تعالی اینجا مساله قصاص را هم از تورات بیان می که همه این احکام در تورات بود ما بر آنها نوشتیم در آن تورات که ان نفس بی نفس نفس در مقابل نفس والعین بالعین چشم در مقابل چشم والانف بالانف بینی در مقابل بینی والعزن بالعزن گوش در مقابل گوش والسن بالسن و همچنین دندان در مقابل دندان والجروح قصاص و بقیه زخمها هم قصاص یعنی ذات قصاص هر زخمی که قصاص و مواصلت و برابری اونجا ممکن هست اونجا قصاص بشه و هر زخمی که قصاص ممکن نیست اونجا جایگزین قصاص مثل معنوی یعنی همون دیع همون آرش همون جریمه مالی هست فمن تصدق بهی فهو کفارت الله اما کسی صدقه بکنه بخشیدن را اینجا تعبیر به صدقه کرده وغیر نوی صدقه هست فهو کفارتالله این کفاره برای اون میشه یعنی معلوم میشه که بخشیدن اجر بسیار زیادی دارد که باعث کفاره گناهانی اون انسان میشه من لم يحکم بما انزل الله فالائک هم الظالمون هر کسی که حکم نکند حکم نکند یعنی اعتقاد داشتن باشد بما انزل الله و بگی که من قانون غیر از قانون خدا را میخام ف اولای که هم الزالمون، اینها زالم هستند. زلم اینجا به یک کاملش هست. ظالم کامل همون کافر هست. به کمال زلم هست. ببینید کسی که احکام خدا را قبول ندارد و احکام خودش را مثلا در بسیاری از بلاد خیلی از حکام مسلمان نما هستند. که اونها معتقدند احکامی که در قرآن آمده، در شر آمده، این احکام امروز جایشون نیست، وقتشون نیست، اینا مربوط به یک زمان بودند، لذا امروز قانون اساسی خود ما، امروز اون چیزی که نمايندگان ما اونا را تصویب میکنن، نمایندگانی که بلکره همه اینها فکرهاي ناقصی دارند، همه اینها عقلشون ناقصه. انسان همیشه عقلش ناقص و الا اگر انسان ها عقلشون کامل بود با هم هیچ اختلاف نمی کردن تا. همون دانشمند ترین افراد میں هم میبینیم با هم اختلاف نظر دارن خب این دو تایی که با هم اختلاف نظر دارن قطعا یکی درست که یکی نادرست پس بس معلوم میشه که هر باشی هم بالاخره کتح فکرین عقل کامل نیست در مقابل ادابير و احکام الله عز لذا کسی که اعتقاد به منزل الله داشت نباشد و حکم نکند بر اساس اون اعتقاد این انسان ظالم هست و ظلم کامل یعنی از دایره دین خارج است و قفینا علی اثارهم بعیسی ابن مریم الله تعالی می فرماید بعد از اینکه تورات رماداد موسا را و بعد از اون انبیاء دیگر را هم فرستادیم این سلسله ادامه داشت تا اینکه پشت سر ای آثار اون انبیاء آثارهم این نبیون ما فرستادیم عیسی ابن مریم را عیسی ابن مریم ببین اوصاف عیسی ابن مریم اولا که ابن مریم هست این وصف نساره را رد میکنه ابن الله نیست ابن مریم هست دفما مصدقا لما بین یده من التورات یعنی نبی خداست این وصف رد می کند کرا و ادامه اصاف یهودی ها رد میکنند. کند چون تصدیق کننده اون کتابی که قبل از او هست یعنی تورات و آتیناه الانجیل و ما بی ایسا من مریم انجیل دادیم که انجیل هم مثل تورات فضائلی دارد همونطور که تورات بود فیها ها و نور در انجیل هم هدایت و نور بود هدایت اعتقادت و نور عملا خدای از و در اون هدایتو نور گذاشته و عرض کردم که اون هم از نظر ایمانی بهترین راه هست و هم از نظر عملی کسی که به احکامش عمل بکند زندگیش روشن میشه و زندگیش نورانی میشه از این جهت هم به قرآن و هم به تورات و هم به انجیل گفته شده هدن و نور ومصدق لما بين يديه من التورات والتستيقن ذي التورات يس كقبل زهس وهدى وموعزة للمتقين هم هدايات إعلما وهم موعزة هس أملاً أما للمتقين مستفيدين من الإنجيل كسانكز إنجيل استفاده هلا هم تورات هم إنجيل هم قرآن هدى للمتقين هلا و هدایت برای کسانی هستن که در درون اونها انابت هست، حق تلبیه هست، رجوع إلى الله هست، ن برای هرکسی. لذا الله می‌فرماد: فرماید يحكم این حكم علي الان نیست. قلنا ما اون زمان دستور دادیم. الان که محمد صلی الله علیه و سلم آمده همه باید به محمد ایمان بیاورند. لذا ما دستور دادیم که ولي اهل الانجيل بما انزل الله في اهل انجیل باید حکم کنند فیسل بکنند به اون چیز که الله نازل فرموده در آن وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هر کسی که حکم نکند بی ما انزل الله اون فاسق است فاسقون هم اینجا مراد فرد کامل فاسق الدرجة الكاملة والمراد بیهی الدرجة الكاملة مراد از این درجه کامل فسق است درجه کامل فسق چیه کفره چلانچه اللهم آلوسین ویشته ای المتمردون الخارجون عن حکمه او عن الامان وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب لذا بعد از تورات و بعد از انجیل نوبت نوبت چی هست نوبت قرآن هست الله تعالیٰ می فرماید بعد از اون کتاب منظور اینه که همه این کتاب ها در یک ردیف هستن یک سلسله هستن اینها حلقه های یک زنجیر هستن و انزلنا الیک الكتاب ما نازل کردیم بسویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب راکب بالحق در حالی که این کتاب این اول کتاب هست کتاب رب حق فرستادیم یعنی برای اظهار حق قرآن آمده تا حقیقت واضح بشه تمام حقایق را قرآن روشن کرد انبیایی که در رابطه با انها مردم انها را به درجه خدایی برده بودن مثل حضرت مسیح یا انها را فرزند حرام میگفتن اعزو بالله انبیاءی مثل سلیمان که مردم اونها را صاحر و جادوگر میگفتند یا اقاید دیگری که مردم انها را برگزیده بودن و کفر و شرک را انتخاب کرده بودن لذا همه اینها را در رابطه با همه اینها قرآن حق را اظهار کرد مصدقا لما بین يديه من الكتاب در حالی که تصدیق کننده بود تصدیق کننده هست این قرآن آن هایی که قبل از این قرآن هستن و مهیمنا علیه در واقع قرآن مجید وصف سوومش ببین وصف اول بالحق هست وصف دوم مصدقا لما بین یدهی من الكتب هست من الكتاب هست وصف سوم مهیمن هست مهیمن معنیش چیه یعنی محافظ اون کتاب هست اون کتاب, کتاب رو تحریف کردند اون کتاب هارا دستکاری کردند قرآن مجید چی کرد حفاظت کرد یعنی درواقع واقعیت ها را گفت در اون کتاب ها شرک نبود در اون کتاب ها توحید بود ولی مردم توحید را تبدیل به شرک کردند اما قرآن مجید چیکار کرد محافظت کرد یعنی واقعیت ها را بیان کرد و مهیمنا علی لذا فحکم بينهم بما انزل الله ای محمد صلی الله علیه و salam بین اینها بر اساس ان که خدای جل نازل فرمودن حکم کن و لا تتبع اهواهم عما جاءک من الحق شما پیرو خواهشات اونها نباشید پیرو خواهشات اونها نباشید ببینید خواهشات اونها خواستهای علما و یهود و نصاره را خداوند مطرح می فرماید اونها را به عنوان احوا بیان می فرماید همین که مثلا حکم راجم بود اونها می خواستند حکم راجم تبدیل به جلد بشه این از خواهشات اونا هست خیلی از مسائل هستند امروز هم این خطاب متوجه شما علماء اسلام هست یهود و نصاره راضی نخواهند بود تا زمانی که شما پیرو دینی اونها نشید لذا اونها انتظاراتی دارن که شما در بیان احکام قرآن مجید مقداری از خود نرمش نشان دهید وَدُّلَوْتُدْهِنُوْ فیدهنون. اونها میخوان احکامی که به مذاقی اونها نمیخورد مسائلی که همخانی ندارد مقدار این مسائل را شما تغییر بدهید مثلا موضوع جهاد است مسئله مسائل شهادت است مسئله ایسا رو از خود گزشتگی هست اینها را بالاخره اونها میخوان شما تغییر بدید اگر اگر کسانی بیاند و تغییر بدن بعضی ها هستن که آیات جهاد را کلن طوری تفسیر میکنند که گوی تحریف در میکنه قرآن مجید را لذا اینها را اگر انسان به خاطر مسائل اونها خواستهای های اونها انسان اگر تغییر بده این تحریف هست هیچ فرقی با علمای یهود نخواهیم داشت با علمای نصارا نخواهیم داشت لذا الله میفرماید ولا تتبع اهواکم عما جاءک من الحق که از حق پیش شما آمده شما در این پیروی احوای آنها نباشید پیروی خواهشات آنها نباشید لكل جعلنا منکم شرعتا و جا. الله میفرماید برای هر یکی از شما ما قرار دادید شرعه و منحاج شرعه و منحاج دو دوتا وصف کتاب ها هستند بعضی میگن شرعه مراد احکام فردیه را میگیند منحاج احکام اعتقادی را میگن البته این را آلوسی نقل کرده و بعد از نقل میگه و لیسه بشه این غلط است این چیزی نیست بعضی میگن شرعه اون احکامی را میگویند که از نظر ظهور و ظاهر هستند و منهاج اون احکامی را میگن که بر اونها انسان وقتی که عمل بکرد اون میشم منهاج اما مولانا عبدالمجید دریابادی که یکی از مفسران هند است ایشو میفرمایند شرع اون احکامی را میگن که مربوط به عقاید هستند و منهاج اون احکامی را میگن که مربوط به عمل هستند یعنی خدای عزوجل برای شما در این کتاب ها هم احکام اعتقادی نازل فرموده و هم احکام عملی که بر اونها کار بکنید عمل بکنید ولو شاء الله لجعلکوم امه واحده ولکن ليبلوکم خدای عزوجل میفرماید اگر خدا میخواست شما را امتی واحده قرار میداد اما امت واحده قرار نداد بلکه ليبلوکم خدا خاص شماره امتحان بکند ببینید یک سوالی که در خیلی آیات دیگر مطرح است اون سوال پاسخش اینجا داده شده در آیات مختلفی ما داریم خدای تعالی در سوره هود مثلا میفرماید والا شاء الله الناس امه واحده خدا اگر میخواست مردم را امت واحده قرار میداد یعنی همه بر مسیر ایمان همه بر مسیر توحید همه بر مسیر حق ولی خدا قرار نداد خب چرا مگر خدا نمیخواد همه ما ایمان داشته باشیم چرا قرار نداد این سوال همیشه مطرح است در سوره شورا هست ولو شاء الله لجعلهم امه واحده در سوره راد هست ولو شاء الله لهذ الناس اگر خدا بخاطر همه مردم را هدایت میکند در سوره الف لام میم سجده شما قندید ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها اگر ما بخایم به هر نفسی هدایتش را رمیلیم یعنی همه انسان ها را هدایت میکنیم خب خداوند اگر بخواد همه ما را هدایت میکنه همه اهل زمین خوب نبود که همه زمین از شرق گرفته تا غرب همه مؤمن بودند همه معتقد بودند همه موحید بودند همه یک تا پرست و خدا پرست بودند هیچ کسی غیر از خدا عبادت نشود همین زمین واقعا تبدیل به بهشت میشد همه اگر اهل ایمان بودند چرا خدا این کار را نکرد اینکه چیز خوبی هست این چیزی چیز خوب است خداوند از ازدواجل چرا نخواست که ما همه انسان ها هدایت بشیم این جوابش هست ولا کل ولیکن ولكن لیبلوکم چون خدا میخواست شما را امتحان بکند چطور امتحان میکنه ببینید اگر خدا بخواهد همه انسان ها بر مسیر ایمان قرار بگیرند باید اختیار را قوت اختیار را از اونها سلب کند قوات اختیار از زونها یعنی انسان اختیار داشته نباشد که فمن شاف فلیومن ومن شاف فلیکثر باید این اختیار از انسان گرفته بشه اون وقت انسان مجبور ایمان بیاره چون راه دیگری برایش وجود نداره الان ببینی شما نفس میکشید نفس کشیدن تون اختیاری نیست چه بخواید چه نخواید نفس میکشید لذا این نفس کشیده یه مسئله غیر اختیاری هست اون وقت وقتی که اختیار کفر از انسان سلب می شود اصلا اختیار راه از انسان سلب می انسان مجبور بود ایمان بیاره وقتی که مجبور بود ایمان بیاره این ایمان می ایمان جبری خدای تعالی ایمان جبری نمی خواد ایمان جبری مطلوب پروردگار نیست و بعد دنیا را خدای از و دار امتحان قرار داده یعنی دنیا محلی هست که اینجا ما داریم امتحان سپری می کنیم امتحان می گذرانیم اگر اگر بالفرض اختیاری نباشد و اجباری باشد پس دنیا دار امتحان نمی ماند اون وقت فلسفه پیدا کردن دنیا از بین میره خدا چرا این دنیا را خلق کرده؟ به خاطر اینکه بندگان خودش را امتحان بکنه امتحان در صورتی میشه که اختیار باشد اختیارم در صورتی میشه که هرکت دوست دارد کفت کنه هرکت دوست دارد ایمان بیارد پس اگر اختیار سلب بشه ایمان اجباری میشه دنیا داره امتحان نمیم اصل فلسفه از بیم میره به بی این خاطر خدا خواسته ولیکن لیبلوکم شما را بی آزمایت فی ما آتاکم در آنچه که به شما داده لذا شما ای بندگان فست بقل خیرات شما در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید الاللہ مرجعکم جمیعا فیونبیعکم بما کنتم تعملون بما كنتم في تختلفون و فقط بسوی خداست جای رجوي شما اون وقت خداون به شما خبر میده در ان چیزایی که شما در آنها اختلاف داشتید وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك خداوند عزّ و جل قبلاً به پیغمبرش فرمود: و ان حکم تفحص کن بینهم بالقسط. اگر یهود پیش شما آمدند و نیازی به فیصله بود، شما به عدل فیصله بکنید، شما به انصاف فیصله بکنید. حال این تفصیل او هست که به انصاف فیصله کردن چیه؟ و ان حکم بینهم بما انزل الله. اینکه فیصل بکنی بین اونها بر اساس کتاب خدا بر اساس ما انزل الله فیصل بکن تتبع اهواهم دنبال خواهشاتشون نباش خواهشات چیه؟ همون آراء و نظریاتی که انها خودشون درست کرده آراءهم اللتی استلحو علیها و ترکو بسببها ما انزل الله علی رسولی خواهشاتی که سبب اون کتاب خدا را ترک کردند لذا شما بر اساس اون خواهشات هیچ وقت فیصله نکن اون چیزی که دل اونها میخواد شما نکن اون چیزی که فرمان خداست بر اساس اون فیصله بکن وحذرهم این یفتنو کعن بعض ما انزل الله ایلیک و خداون میفرما از اونها بر حذر باش یعنی از اونها حرف شنوین لاشده نباش برحذر باش از اینکه شما را بلغزانند به فتنه گرفتار بکنند یعنی بلغزانند از بعضی آن چیزی که خدا نازل کرده یعنی اگر شما از اونها حرف نوی داشته باشید اونها میخواند که شما کلام خدا را اجرا نکن ما انزال الله را پیاده نکن لذا شما بر اساس فیصلی قرآن فیصل کن بر اساس ما انزل الله فیصل کن اما اگر اونها قبول نکردند فان فا تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم اگر اونها اعراض کردن اگر اونها روی گردانی کردن شما يقين بدان باور كن که خداوند ميخواهد اونها را بفتنها گرفتار بکنند. ان يصيبهم اي في الدنيا ببعض الذنوب ببعض از گناهانشون وان كثير من الناس لفاسقون بسیاری بسياري از مردم فاسقند يعني یعنی از حد و حدود الهی خارج شدند و اونها نمی خواهند که پایبند باشند اینها از اونها هستند شما نباشید اف حکم الجاهلیتی یبغون آیا اینها حکم جاهلیت میخواند؟ حکمی که بر اساس علم نباشه بر اساس جهل باشه مشخص حکمی که بر اساس جهل باشه در اون حکم بر یک طرف ظلم فساده و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون چکاسی زیباتر از الله از نظر حکم یعنی حکم چکاسی از حکم الله میتونه زیباتر باشه فیصله چکاسی از فیصله الله میتونه زیباتر باشه در فیصله الهی همیشه عدل همیشه جلوی ظلم گرفته میشه اما لقوم یوقنون این فیصله برای قومی هست که اونها یقین دارن یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء عمون تو رکه خداوند دستور دادند خداوند دستور دادند که شما وقتی که آمدید پیش شما آمدند بر اساس کتاب خدا قضاوت کن از موالات و دوستی با اونها هم من می‌فرمایند ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم موالات چیز دیگه هست ارتباط و تعلق و مدارات چیز دیگه هست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که در مدینه طیبه بودند با یهود موالات و دوستی سمیمی نداشتند اما مدارات داشتند معاهده داشتند پیمان داشتند حتی می از یهودیها برای دیهی که پیش می پول جمع می کردند زمانی که انها عهد شکستند اون وقت را بیرون کردند علا ای حال اینجا ممانعت از او چی هست؟ از موالات هست. یعنی دوستی سمیمی، دوستی که در قلب باشه. بارها این مطلب را توضیح دادیم که کسی که کافر هست نسبت به <بي> توحید خدا، منکر هست نسبت به کتاب خدا و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگز سزاواری هیچ مسلمانی نیست که در قلب مسلمان محبت اون کافر باشد ولو اینکه اون کافر بازیگر فوتبال باشد ولو اینکه اون کافر هنرمندی از هنرمندان باشد تو فیلم ها بازی کند که خوشتون بیاد ازش نباید محبت در دل باشد چرا؟ چونکه اون کسی است که نسبت به خدا کافر است اون کسی است که نسبت به رسول الله منکر است لذا اللهم می فرماید یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا نگرید یهود و دوست سمیمی دوست قلبي و دوست سمیمی بعضهم اوليا بعض بعض از آنها دوستان بعضی هستند و من يتولهم منكم فانه منهم خداون می فرماید هر کسی که با آنها دوستی کنه از شما فانه منهم این مسلمان از اونها خواهد بود بارها این ثابت شده کسی که میره به طرف یهود و نصارا دوستی میکنه با دشمنان کم کم همون فرهنگ همون عادات همون لباس همون روشها همون رسوم آداب همه در زندگیش چی میشه پیاده میشه امروز شما ببینید خیلی از مسلمان ها هستند در بلاد به مترقی شما برو اونجا اصلا تشخیص نمیدی این مسلمانه این غیر مسلمانه نه از ظاهرش تشخیص میدی نه تو خونه بری از اون آداب رسومشون از نحوه غذا خوردنشون از نحوه پوشیدنشون از مراسماتی که دارن اصلا نمیدونی که این مسلمان غیر مسلمانه کلا مسلمان یکی از اشکالات موالادت اینه که انسان کلا اون فرهنگ را میبینیم می میکنند در همین بلاد خود ما بلاد اسلامی مسلمانان فرزندان خودشون را نامه‌ای گذاشتند که این نامها هیچ نو مطابقتی با نامها اسلامی ندارد این نامها بعضی نامها دختران را میبینیم اسمایشون را گذاشته اسم کسانی که تو های هندی بازی میکنند لا یا اسم کسانی که در فلان جا فلان نقش را ادا کرده قرال که رسول اللہ می نامهای زیبا بزاری سر شکل را میبینید نو مدل مورا می بینید نو پوشیدن لباس را میبینید آداب و رسوم را نمیدونم تولد داره و عروسیش می چه شکل کلا فرقی نمی کنه و من يتولوا این نتیجه تولی هست این نتیجه دوستی هست هر کسی که دوستی داشته باشه با اونها فانه منهم جوزن ہاست ان الله لا القوم الظالمین خداوند می چنین قوم ظالمی را توفیق هدایت نمی ده کسی که در دوستی با مشرکین و با یهود و نصاره غرق است، ببین منافقین دوست بودند منافقینی که شب و روز در مجلس رسول الله نشستن و مستقیم آیات داره وحی چرا این هدایت نمیشه؟ خدا توفیق هدایت نمی ده چون قلبش جای دیگه هست محبتش جای دیگه هست لذا الله توفیق هدایت نمیده فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم خداوند میفرما همین منافقین را این بر منافقین سر زن پس میبینی کسانی را که در دل هاشم مرض هست نفاق هست شک هست یسارعون فيهم بسوی ها با سرعت می روند بعضی ها بعضی چه بحانه داره اینا چیزی که قرآن گفته بعضی میگم چرا با اینها دوست میشیم بالاخره درد انسان میخوره روزی سختی مشکلی پیش میاد نیازی پیدا میشه بعضی از کشورهای اسلامی هم به همین خاطر موالات در حتی بعضی از حکام متاسفانه دوستیشون به اندازهی از خیلی از همین حکام کشورهای اسلامی نگاه می که خانمهایشون زنهایشون یا یهودی یا نصرانی هستند رفته از اونجا زن گرفتند و حاکم مسلمانی که زنش یهودی باشد زنش مسیحی باشد این دیگه چی مسلمانی هست تا این اندازه دوستی لذا الله می که فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ میبینی کسانی که در دلهایشن نفاق است مرض یعنی نفاق این استلار خدای عزوجل برای منافقین در زوری بقرش مخاندی فِي قُلوبِهِمْ مرضن. از منافق است که در دلش مرض است شک است نفاق است یسارعون فیهم بسرعت بسوئی انها میروند چرا میروند؟ چه توجیهی یا میگن نخشان مصیبه نداره این توجیه منافقه منافقه میگفت اگر ما موالات نکنیم شاید فردا مصیبت پیش بیاد زیان مالی مواجه بشیم اون وقت اونها ما را حمایت میکنند اونا پول دارند سرمایه با اونها است اصل هم دست اونها است تفسیر کبیر نوشته کانو اهل سروت یهودی ها اهل سروت و سرمایه بودن و کانو ی على مهماتهم و یقرزونهم در امور مهم منافقین را کمک میکردن و گاهی بهشون قرض می داددن. لذا به خاطر مال به خاطر مادیات موالات از کردم ارتباط چیزی دیگه هست دیپلماسی چیزی دیگه هست و موالات و دوستی چیزی دیگه هست موالات و دوستی اثراتش دو که مشخص انسان اصلا آداب رفت از دست میده و بعدا کسی که بخواد همین کسانی که دوستی میکنه اهل نفاق خودش را مسلمان میدونه به اندازه ای از آداب و رسومش متأثر میشه که کسی مسلمانی بخواد لباس اسلامی بپوشه تو دانشگاه با حجاب میخواد برای این را برای خودش یک میدانه. یک ننگ می دونے حکم صادر می که حجاب ممنوع هست. می اون خوش کنه، می به اون نشان بده که من مترقی کیم، من پیش رفتم. این تمام نتیجه و سمراتیچیاست، موالات است. الله می فرماید: یا قرون نقش آن تصیب می گویم ترسیم به ما برسد حادثه مصیبتی بیاد خود اونا به درد ما خورد فعس الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین خدای عزوجل جا وعدیدا دعس الله قبلا کردم که اینجا به من احتمال نیست به امید نیست وقتی نسبت به طرف الله اسم معنی چی میاد وعده وعده الله است که ان یاتیه بالفتح فتح برای شما مسلمانان موفقیت بیاره یهودی ها و نصرانی ها را تار بکنه اون وقت خجالتی برای کسانی است که با اونا دوست شدن و می ترسیدن که فردا مشکلی پیش بیاد اینها مدد مالی نکنن کمک مالی نکنن لذا اللہ می فرماید فَعَسَ اللَّهُ اَن يَعْتِيَ بِالْفَتْحِ امید هست که یا وعده اللہ هست که فتح بیاره او امر منعندهی یا یک کاری دیگر است پیش خدا یعنی چنین چیزی که برای یهود و نصاره باعث شکست باشد فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين پس بگردند بر آنچه که اسررو گشتند در دلشان پشیمان پشیمان بشند که ما عجب اشتباهی کردیم چرا با اینها دوست شدیم ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جاد ايمانهم انهم لما وقت مؤمنین چه گفت تعجباً میگوین و یقول الذين آمنوا تعجباً به منافقین میگه آیا اوهایی الذين اقسموا همین ها بودن که سوگند میخوردم بالله جهاد ایمان هم به خداوند هم همون قسم انتهایی قسم مبالغه‌ای که انهم لمعکم ها استهدل با شما هستند چرا نیستند چرا رها کردن شما را حبطت اعمالهم اعمالشم برباد و ضائع شد فأصبحو خاسرین اون وقت گشتند نادمین خاسرین یعنی ناکام نامرات خائب یا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دین اینجا بحث ارتداد است شاید فکر کنی که چه ارتباط با گزشته دار، ارتباط داره ارتباط نداره چرا ارتباط داره موالات دوستی با کفار گاهی به کجا می به ارتداد انسان را مرتدم هم می کنند. همین دوستی هاں هست که کم کم کم کم می روند و اصلا دین اونها را قبول می کنند. بسیاری هست امروز که محبت دارن با یهود محبت دارن با مسیحیان ارتباط دارن کم کم کم کم باز کمک های مالی هم از اونها می گیرند اونات بالاخره سرمایه امتعان الائز همه چیز دستیشونه کم کم میرن میبینیم مسیحی میشه کم کم میره یهودی میشه یا کسانی که در بلاد کفر با اونها زندگی میکنند از مسلمانان اینها باید معاذب ایمانشون ایمانشون باشند <تصفح> خیلی از مسلمانان هستن که در بلاد کفران در بلاد اروپا هستن آمریکا هستن همه چیز را از دست دادن هیچ چیزی برایشون نمانده از اسلام غیر از اسم فقط مونده و بس چند وقت پیش چند سال پیش شنیدیم جماعتی رفته بود یا امریکا یا یکی از کشورهای اروپائی اہل جماعت میخواستن که مسلمانان را پیدا بکنند خب اونجا محل مشخص نبودی الان الحمدللہ مساجد زیاد ہے بعد این جماعتی ها از طریق تلفنها تلفنهایی که در ان اداره مخابرات بنام افراد هست از طریق انہا نگاه کردند که کدوم تلفن به نام مسلمانی هست اون لیست را اون آمار را آوردند و کسانی که اسامی مسلمان داشتند مسلمانی داشتند اونا را از این طریق پیدا کردند از تاریخی دیگه نبوده و بعد وقتی که گفتم با اونها مذاکره شده صحبتی شده گفتم بغیر از همین اسم دیگه چیزی ما نمیدونیم از اسلام فقط میدونیم مسلمانیم بعدن روشون کار کردن ما گفتن اصلا مسلمانی چیه لذا بعضی از موالات و بعضی از ارتباطات باعث میشه که انسان همه چیز را از دست بده دین را ایمان را عقیده را فرهنگ را لباس را آداب رسوم را لذا خدای از و اینجا وعید بیان میفرماید که هر کسی که بره بسوی انها و موالات و دوستیش به اندازه باشه که دین خودش را از دست بده خدا هم به بچینین دینی که شما از دست بدید نداره و خدا تعالی قوم دیگری خواهد آورد که اون قوم دیگر اهل دین باشند با خدا باشند لذا الله می فرمه یا ایوها الذین آمنو اللهم آلوسین جا رات بین آیات را نوشته بیان ان موالاتهم مستدعيه للارتداد عن الدين خداوند بیان فرموده که دوستی با انها باعث میشه که از دین بازیها مرتد بشه یا ایوه الذين آمنو من یرتد منكم عن دينه هر کسی برگردد از دینش فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ أَنْ قَرِيبَ اللَّه مِيَاوَرَتْ قَوْمِ دِيجَرَا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ كَأَنَّ قَوْمَ خُدَا رَ دُوسْتَارَم وَ خُدَا أُنْهَارَ دُوسْتَارَتَ عَزِلَتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِن قَوْم علا بمن الله حصل للمؤمنين در مقابل مؤمنین عاجزان فروتنی را اختیار میکنند عزته علی الكافرین غالب و غالبا بر کافران غالب هستند و پیروزم بر کافران چرا چون که یجاهدون فی سبیل الله در راه خدا اینها میجنگند و لا یخافون لومۃ لائم و نمتسن از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی این در واقع در وصف اصحاب هست و به منافقین در واقع تذکر و تلنگر داده میشه که شما اگر برمیگردید خدا نیازی به دین شما نداره شما اگر با یهود برید برین خداوند اززا و جل قوم دیگری را آورده که این قوم از جاهای مختلفی هست بعضی عرب هستن بعضی عجم هستن بعضی از فارس هستن بعضی از روم هستن بعضی از حبشه هستن خدای تعالی اینها را آورده که اینها دنبال رضای پروردگار هستن و در رای خدا می جنگند و از ملامتی هیچ ملامت کننده پرواه ندارند ذالک فضل الله این صفات فضل الهی هست واللطف پروردگار است یوتهی من یا شکسیر که خدا بخاد میده. و الله و آسیا و علیم خداوند ذاتی است که در دربار او و ساعت وجود داره. و همه چیز را خدا ایتالا همه نعمت مادی و معنایی دارد به هر کسی بخاد میده علیم ون الله میداند. یعنی میداند چه کسی محل و ظرف زرفیت این نعمت را دارد نعمت دین نعمت ایمان انما وليكم الله ورسوله انجا خداوند محل موالات را بیان می فرماید دوستی باید با چه کسانی کیا باید دوست شما باشند انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا یعنی ولی شما دوست شما الله ورسول خدا و که ایمان آوردند و اللهین ببینید اوصاف مؤمنین را. اللهین یقیمون الصلات، انهاي نماز را برپا می دارند و یقطون الزکات، زکات دهند و هم راکیون انها رکوب می کنند. ببینید در رابطه با این آیه بسیاری شان نزولی بیان کردند که این آیه درباره ابوبکر صدیق است الذين يقيمون الصلاه وایتون الزکات ومراكم بسیاری اصرار دارند که شان نزول آیه سیدنا علی هست و یک داستانی هم درست کردند که سیدنا علی در حال رکوب بود و نماز می کسی آمد فقیر گفت بده به من چیز انگشتر خودش را در حالی که وهم راکیون در حال رکوع بود در آوردو به فقیر داد یعنی هم نماز هم زکات و هم در حالت رکو زکات بده اولا کسی که با نماز آشنا باشد و بالخصوص با نماز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امید ان کہ صحابہ وقتی که وارد نماز می شداند توجهشون به دنیای خارج نبود همین صبح شما خاندید که خدای تعالی فرمود اذکرونی الله علیکم از هم قوم ان یبسطو علیکم ایدیه هم که در این بود کفار حسرت خوردن که امروز مسلمانان وقت نماز زور چرا ما بهشون حمله نکردیم اونا که وقت وارد نماز میشند دیگه از این دنیا خبر ندن هر کسی بهشون حمله بکنم با خبر نمیشن صحابه چنان نمازی میخاندن صحابه سر نماز زکات میدند و سیدن علی رضی الله تعالی عنہ سر نماز انگوشتر خودش را در آورد و زکات داد این آیه اگر شأن نزولی مصداق اولی داشته باشد اما آیه عام هست محمل آیه مصداق آیه عام هست من و تو هم میتونیم باشیم مصداق آیه ببینید آیه چه اوصافی بیان کرده سیغ مفردم ذکر نکر دے اللذی یقیم السلاة و یؤت زکاة و هوا راکعون انتون فرمو دے سیغ جام فرمو دے الَّذین يقیمون کسانی که ایمان آوردن کیا هستن مومنین کیا هستن الَّذین يقیمون الصلاه. کسانی که نماز برپا می و یؤتون الزکات، کسانی که زکات می وهم راكعون معنىش إن نيس كدرها التي الركوش ما الزكاة بدهت بلك وهم راكعون بالأساس تفسير هميه مفسران وهم راكعون يعني انها آجزی می کنند اونا تکبر ندارند روی زمین این بحث اخلاق هست اون دوتا یکی بحث عبادت مالی بود یکی عبادت جانی و این بحث اخلاق هست. یعنی مومن واقعی کسانی هست که عبادت مالی هم می کنه یقیمون السلاة و یعتون الزکات. یعنی زکاة هم میده. و هم راکعون یعنی اونها متواضعند. تفسیر روح و المعنی و هم راکعون هم خاشعون متواضعون لله به این معنی هست که همیشه توازو داره همیشه فروتنی داره اهل تکبر و تجبر نیست اهل غرور نیست پس مومنینی که شما باید بایش و بکنید این ها هستت با اینها دوست بشید بله ابوبکر هم جز این علی کرمالله وجه هم جز این عمر و عثمان هم جز این ها هستن بقیه از هم هستن آمه مومنین هم هستن. پس مصداق آیه یک نفر نیست خدا فرموده با همه مؤمنین دوستی بکنید لذا محل موالات اینها هستند انما ولیكم الله و رسوله جزی نیست که دوست شما و ولی شما الله هست و رسولش هست والذين آمین و هستند کدوم مؤمنین مؤمنینی که دارای این اوصاف هستند.الذین یوقیمون الصلاات آن مؤمنینی که نماز بر پا می دارند و یوتو آن مؤمنینی که زکات می دهند و هم آن مؤمنینی که همیشه عجز و انکساری دارند عاجزی دارند. تفسیر خازن نوشته المراد من هنا هنالخضوع مراد از رکوی اینجا فروتنی هست معنی آیه چیه؟ والمعنی ان المؤمنین یسلون و یزکون مؤمنین نماز میخانن زکات میدن و هم منقادون خاضعون لعوامر الله و نواهی یعنی در مقابل اوامر و نواهی پروردگار خشوع خضوع دارن فروتنی دارند تکبر و غرور ندارند لذا با این مؤمنین، این دستی از مؤمنین دوست بشید نبا کفار و یهود و نصر ومن یتول الله و رسوله والذین آمنوا. این برکات دوستی با خدا و بندگان خوب خداست هر کسی که دوستی داشته باشد با خدا و رسولش والذین آمنو با مؤمنین، اون جز حزب خداست فان حزب الله هم الغالبون هم حزب الله به اعتبار نتیجه به اعتبار انجام این حزب الله چی است آنها غالب خواهند شد و آنها پیروز خواهند شد یا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 ذلك بانهم قوم لا يَعْقِلُونَ در آیات گذشته دستور ترک موالات بود ترک دوستی و فاصله گرفتن از کفار بود که با کفار با یهود با نصارا دوستی نکنید، موالات نکنید. و هر کسی دوستی بکند جز انهاست و من یتولهم منکم فإنه منهم و بعض فرمودن که منافقین با انها دوست هستند و ببهانه اینکه برای ما مشکلات میاد حوادث و اتفاقات میاد اما این آیه که تلاوت گردید این آیه تتمه اون بحث هست و پایان بحث گذاشته هست اما در این آیه یکی از دلائل مهم را الله عز و جل هم بیان فرموده که مهمترین دلیلش اینه که انها دین شما را استهزا کنند دین شما را مسخره می کنند یا ایوها الذين آمنو ای مؤمنان، لا تتخذوا الذين تتخذوا دینکم هزون و لعبه. شما نگیرید کسانی را که گرفتن دین شما را مسخره و بازیچه. این علت اول هست که اونها استهزامی کنند به اصول دینشما. این چه کسانی هستند منالذین آوت الكتاب من قبل وَالْكُفَّارَ انهایی که به بشم... کتاب داده شدند مثل یهود نصاره و همچنین کفار مشرکین اولیاء مفعوله لا تتخذوهاست لا تتخذوهم اولیاء انها را. ان اهل کتاب را ان کفار را ان مشرکین را انهایی که دین شما را به ماس مسخره گرفتند. انها را دوست خودتون قرار ندهید چون انها به شما را مسخره میکنند دین شما را مسخره میکنند کسانی که دین شما را مسخره میکنند شما چطور به اونها میتونید دوست بشید در صورت انسان میتواند دوست باشد که دین برای انسان اهمیتی داشته نباشد اگر دین برای شما اهمیت دارد اگر اسلام برای شما اهمیت دارد اگر قرآن برای شما اهمیت داشت شما با اونها دوست نشید شما دوستی اونها را ترک بکنید واتقوا الله از خدا پروا داشته باشید از خدا بترسید در رابطه با دوستی از دوستی کفار این کوت مؤمنین این مقتضی هست مقتضی ترک موالات این می که شما یعنی ایمان شما می دوست نشید ایمان شما می طلبت فاصله بگیرید از اونها اینکن تو مومنین اگر شما مؤمن هستید خب در علت دوستی اونجا بیان شد که اونها دین شما را منظور از دین در اونجا اصول دین هستند مثلا توحید را مسخره می کنند مشرکین قیامت را مسخره می کنند رسول الله صلی الله علیه و سلام را مسخره میکنه اینا اصول هستند توحید رسالت و قیامت یکی مجنون میگه یکی می میگه و در رابطه با توحیدمون ها مشکل دارن درباره قیامت قیامت را مسخره میکنند لذا اون تمسخر علت اول بود تمسخر با اصول دین و اذا ناديتم الى الصلاه این علت دوم است تمسخور به فروع دین تمسخور به فروع دین و اذا نادیتم الى صلاة التخدوها حضو و لعبا هرگاه شما ندا میکنید سوی نماز ان ندا شما را میگیرند هم حضوی میگیرند هم استهزا و مسخری و بازی و بازی چهی یعنی خودشون را سرگرم میکنند دقت بفرمایید که مراد از ندا چیه ندا به سوی نماز به وسیله چی میشه به وسیله اذان میشه پس معناش اینه را را این که اذان را مسخره میکنند چرا این کار را میکنه علت استهزاء چی است ذالک بانهم قوم لا يعقلون این هست اینکه اینها قومی هستن که عقل ندارند لا یعقلون دین حق را دین را نمی فهمند و حقایق دین را نمی فهمند ببینید این تمسخر الان هم هست الان ادی هستند هم به اصول ما مسخره میکنند توحید را مسخره میکنند رسول الله صلی الله علیه و را مسخره میکنند کاریکاتور میکشند فیلم و نمیدونم کارتون درست میکنند اینا تمام در همین زمینه هست تمسخر هست واقعاً ننگس برای اون مسلمانی که با چنین افرادی دوستی داشته باشد با چنین افرادی ارتباط داشته باشد کسانی که تا این اندازه توهین می کنند قرآن را توهین می کنند آیات قرآن را توهین می کنند تمسخر می کنند و بسیاری هستند که فروعات را مسخره می کنند نماز ما را مسخره می کنند غیر از نماز و اذان بقیه حرکات ما را مسخره می کنند لباس ما را مسخره می کنند بعضی ها هستند که ریش را مسخره می کنند عمامه را مسخره می کنند سنت های آن حضرت صلی الله علیه و وسلم را مسخره می کنند اما یک نکته ای که دردناکتر است اون اینه که در این جمع خانیم می کفار مسخره می کنند دردناکترش اینه که بسیاری از مسلمان ها که خودشون را مسلمان میدانند هم مسخره میکنند بعضی ها به نماز مسخره میکنند بعضی ها به رفتن به مسجد مسخره میکنند کسی جوانی وقتی که دلش میخواد پایبند بشه خیلی از جوان ها هستند همینه هم میگن ما میخوایم پای بند بشه مردم مسخره میکنند میگه صوفی شده این به بهشت رفت خیلی هستن که ریش را مسخره میکنند، اما ما را مسخره اینا مسلمان خودشون را مسلمان می نامند. حالا ما در جایگاهی نیستیم که فتوا بدیم اما خیلی از اهل فتوا میگن کسانی که شعائر دین را مسخره میکنند، شعائر دین را مسخره کردن کفر است. الان یک فردی را مسخره کردن فرق میکنه، اما هم گناهی کبیره هست یک فردی را مسخره میکنن چون چنین راه میره چنین حرف میزنه اما این فرد یکی از شعائر دین را مثل ریش که از شعائر سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است الان بعضی هستن که ندارند عمل نمیکنند اما بعضی هستن که به مسخره میکنن و بعضی کلیپ درست میکنند فیلم درست میکنند و بیشاعیر دین مسخر میکنن، به اندازه مسخر میکنن که حتی ما مسلمانان مسلمانان ما هم متاثر میشن و نمیخند که با این لباس کسی اونها را ببینه که مورد تمسخر قرار میگیره. لذا تماسخور بیشاعیر دین کفر است. لذا هیچ مسلمانی نباید در او و استحذاب باشد. در مرامش تمسخور باشد بس اوقات دیده میشه که بعضی ها میخوان مردم را بخندونند کلیپ درست میکنند و در این کلیپ های خودشون آیات را به شکل تمسخوری میخوانند خطبه و سخنرانی به شکل تمسخور آمیزی میکنند فقط میخوان مردم را بخندانند غافل از اینکه تمسخر تمسخور به این مسائل به آیات الهی به مسائل دینی به عبادات اینا کفر هست نباید کسی تمسخور بکند لذا الله عزوجل علت را بیان می که این کفار هم به اصول شما مسخر می‌کنند، به توحید و قیامت و رسالت و نبوت مسخر می‌کنند و هم اینها به نماز شما و به ازان شما مسخر می‌کنند. پس این تمسخور کردن عادت کفار است از یک مسلمان بعید هست که مسلمانی مسلمانی را مسخره بکنه به خاطر این مسائل به خاطر اینکه متشرع هست به خاطر اینکه متدین هست به خاطر اینکه پایبند دین هست به این خاطر تمسخر بکنه این مسلمان باید در ایمان خودش تجدید نظر کند که دارد نماز را مسخره میکنه داره اذان را مسخره میکنه داره آیات الهی را به صورت تمسخرآمیز میخونه لذا الله می فرماید که انکه اینها مسخره میکنند ندای الصلاه را اذان را و او را به بازیچه و به باد مسخره گرفتند ذلک بانهم قوم لا يعقلون نقوم هسنكيت عقل ندارند دین را این حد درک نمی کنند و نمی فهمند قل یا اهل الكتاب هل تنقیمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل انجا خدای عزوجل خلاصه اسلام را بیان فرموده و اینجا به اون اهل کتابی که اهل تمسخور هستند اونها خطاب شده که ای اهل کتاب هل تنقمون منا شما نقم میگه ای ایراد را اشکال را شما عیب بر ما نمیگیرید ما دیگه عیبی نداریم اشکالی تو کارمون نیست مگر این هست از نظر شما اینا اگر عیب است عیب الا ان آمنا بالله مگر اینکه ما ایمان آوردیم به خدا ایمان آوردن به خدا اگر عیب است خب این عیبی ما داریمش وما انزل ایلینا، انشکب بسوی ما نازل شده استوی الله کتاب خدا، به ایمان داریم. وما انزل من قبل، و چیزی که قبل از این نازل شده، یعنی بر شما تورات، انجیل، به اونا ایمان داریم. این جایی تماس خورد داره، این عیب هست، و آن نأكثرکم فاسقون. اینجاست شیخ رحمه الله می‌فرماید، و مقدّر السوا على مؤهل الكتاب شما بدونك أن أكثركم فاسقون أكثر شما فاسق حسيت فاسق يعني أز حد حدود إطاعة إلهي خارج شديد بجاء إطاعة بروار شما أذول كرديت أز إطاعة قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله در باره این آیات مفسران نوشتن که چند نفر از یهود آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند که شما از انبیاء الهی کی را قبول دارید می‌خواستند بدونن که رسول الله صلی الله علیه و سلام آیا انبیاء بنی اسرائیل را قبول دارند رسول الله صلی الله علیه و فرمود از ابراهیم و اسحاق و اسماعیل بیتا تمام انبیاء بنی اسرائیل موسی و عیسی هم نام بردن چون عیسی را بنی اسرائیل قبول نداشت یهود قبول نداشت وقتی که آن حضرت عیسی را نام بردن اینها گفتن که ما نعرف دینا شر من دینکم ما دینی بدتر از دین شما سراغ نداریم دین شما بدترین دینی که عیسی را شما قبول دارید. این آیه در جواب انها گفته شد الله عز و جل که بدتر می به شما نشون بدم و این جواب جواب دندان شکن هست جواب به اسطلاح معروف ترکی به ترکی هست قل هل انبئكم بشر من ذالک مثوبة عند الله آیا بشما خبر بدهام بترزين از نظر جزاء پیش خدا از نظر پاداش پیش خدا بگم ملاعنه الله این هست اون کی میخوام بگم ملاعنه الله اون کسی که او را خدا لعنت کرده و غضب علیه بر او خشم غضب کرده وجعل منهم القردة والخنازير وعبد عبد الطاغوت و ميمون و خنزير و بندها و بردهاي الطاغوت طاغوت معبودان غير خدا را میگند معبودان باطل انها هستان بدتر یعنی شما اید که لعنت خدا بر شما است خدا بر شما وَغَضِبَ الله عليهم وَلَعَنَهُ اللَّهُ تعالیٰ مِن فَنَعَ وَبَاؤُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ وَبَاؤُ بِغَضَبِ مِنَ لذا شر مکانا وَأَضَلُّ عَنْ سواء السَّبِيلِ انها از نظر مکانو جائے گا وگمراہترین از راه راست لذا شر را نشون بدم بدترین را نشون اینها هستند چرا به مسلمانان میگی دین شما شر از دینی از همه ادیان هست ببینید اینجا وقتی من که از کردم جواب دندان شکنی تمام تاریخ سیاه گذشته یهود تو همین یک جمله آمد که شما چه کردید که در طول تاریخ خشم و غضب خدای عزوجل حتی که خداون شما را تبدیل به میمون کرد رفتید بط و غیر الله را هم عبادت کردید دیگه چی بیخوایید چی مونده برای شما این جواب و پاسخ یهود بود اما منافقین هرگام می آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اظهار ایمان میکردند، اونم یهود بودند الله می فرماید و اذا جاؤکم قالو آمن نا هرگا پیش شما می آیند ما ایمان آوردیم و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به در حالی که انها داخل شدند همرا با کفر در محضر شما آمدند در دلشون چون کفر است و هم قد خرجو به و انها با همان کفر خارج شدند یعنی هیچ اسری و خبری از ایمان نیست اینا همه بلوفه همه دروغه همه شعاره والله اعلم بما شما خبر ندارید الله بهتر میداند آن چی که ان حق کردن آن کفری و آن بغض و آن حسدی که در درونشان بر علیه شماست را الله بهتر میداند و ترا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و کلیهم صحت الله تعالی بر این قوم بر قوم یهود زجر بیان می فرماید توبیخ و سرزنش و ترى كثيرا منهم میبنی بساریه ظنhara یسارعون فی الاثم والعدوان آنها در گناه و تعدی و تجاوز در حدود الهی از همدیگه سبقت میگیرند از همدیگه پیشی میگیرند یسارعون مسارعه از طرفین اما اسم مسارعه در گناه چی هست منظور اقائد گنای چنانچه تفسیر ابو سعود نوشته قیل کلمت شرک و هو قولهم عزیرون ابن الله در این از هم دیگه پیشی میگیره یعنی در شرک و در کفرگوی و العدوان یعنی تجاوز در حدود الهی دستورات خدا را انداختن پشت سر انداختن به دستورات خدا توجه نکردن و اکلهم السحط و در حرام خاری رشو خاری نظر نیاز خاری نیاز نظر برای غیر الله لذا عادتشون به گناه بود به معصیت بود به حرام بود لبئس ما کانو یعملون بسیار بد اون چکین ها عمل میکنند از ادامه آیه معلوم میشه که این زجر و این سرزنش مال اموم یهودی هست مله و آخون تنها نبود امومشون این مرض را داشتند و خداوند تعالی بر مشایخ اونها بر علماء یهود اطاب میفرماید سرزنش میکند انها را که لولاینها همو ربانیون و الاحبار چرا باز نمیدارند انها را دراویش و علماء ربانیون کسانی که خودشون را در مسیر خدا و عبادت خدا و زهد و عبادت وقف کردند و احبار علمایی که اهل کتاب هستند چرا اونها را باز نمی دارند ان قولهم الاثم و اکلهم السحط از سخن گناه سخن چیه کلمت شرک هست عزیرون ابن الله هست و امچنین از خردن مال حرام خردن مال حرام هر چی که حرام باشد چه نظر و نیاز غیر الله باشد چه این حرام چی باشد رشوه و رباخاری باشد لبئس ما کانو یصنعون بسیار بدست اون چی که اونها انجام می دهند. این داشته باشید که اینجا خدای تعالی زجر بیان فرمود علماء را که چرا باز نمی معلوم میشه که علماء دراویش کسانی که خدا تعالی به آنها آنها را خاص قرار داده به علمی اختصاص داده به طاعت و بندگی اختصاص داده آنها در میان مردم برجسته هستند آنها در میان مردم خاص هستند انتظار رب العالمین و دستور رب برای انها که باید آنها باز بدار مردم را اگر مردم دارن گناه می کنند شرک می کنند یا معاصی دیگر را مرتکب هستند و علماء و درویش ساکت باشند اینها مسئولیت دارند این هم عورد خدا قرار می گیرند اینطور نیست که انسان بی تفاوت بشه بگه هرچی باشه باشه من خودم را نجات بدم بلخصوص در این دین که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ پیامبری نمی آید و مبعوث نمی شه وظیفه هست وظیفه علما وظیفه خواص نگذارد در جامعه گناهی بشه اگر گروهی مرتکب گناه بشند و بقیه بتفاوت باشند همه در اون گناه شریک است. اما بعضی اگر وظیفه خودشون را انجام میدن شب و روز فریاد میزنند که نکنید به خاطر خدا نکنید بهتر از خدا و اون همین وقت اینها دینشون را مسئولیتشون را انجام دادم. بنابراین وظیفه من و شما از هر طریقی که برای ما ممکن هست. امروز خدای از زوجال راهای پیام رسوندن به مردم را راهای زیادی قرار داده. تبلیغ هست، گشت گذار هست، این فضاهای مجازی هست، این کلیپ ها هستند، هر کسی دا، توانی دارد، به هر طریقی صداش را به همه برساند، باید برساند. و باید احساس مسئولیت کنه. شما طلاب عزیز هم منتظر نباشی، هر وقتی مولوی شدید، بعد این کار را بکنید، نه. معلوم نیست که عمر انسان خدا هم، عمر همه شما را برکت بده، ولی معلوم نیست که عمر تا که دوام داشته باشه از همه الان باید هر کسی شروع بکنند هر فضائی و هر موقعیتی که در اختیارش از اون طریق باید به همه برساند با منکرات با شرک با خرافات مبارزه بکند، با فسادی که در جامعه حاکم هست اللہ تعالی ببینید با چه کلماتی عتاب می فرماید لولا ینها هم الربانیون انهایی که خودشون را خدا فرص میدانند، اینها که خودشون رب با خدا میدانند، والاحبار اینها که خودشون رب عالم میدانند چرا باز نمیدارند؟ از سخن گناه باز نمیدارند که سخنی گناه چیه شرک و اکلیم مصوت، از عمل گنا از حرام خاری چرا باز نمیدارند؟ خدا میفرماید لبیسم آکانی اسلام بسیار بعد عمل میکنند اینها، اینکه این بی تفاوت هست، این بدترین عمل هست. وقالت اليهود يد الله مغلولۃ غللت ايديهم این هم زجر هست عتاب هست سرزنش هست برای همین یهود ناصفاس یهودی, یهودی که خدای عزوجل این همه لطف بر اونها کرد و بعد هم اونها نسبت به خدای عزوجل چی سوی ادبی چی بی ادبی و چه کفر گویی داشتند. بعضی وقتا مردم متاسفانه مردم جاهل، عوام، نادان، اتفاقی برایشون پیش میاد می که چیزهای نامناسبی به خدای عزّ نسبت میدهند. مثل یهود ببینی یهود در چه وضعیتی این را گفتند. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما می فرماید که وقتی که مدت باران نیامد و بحاری نبود قحط بود زمین خشک بودند یهودی ها گفتند یدالله مغلولتن علی الله دست خداوند بسته هست یعنی بخل دارد به ما رزق روزی فراوان نمی دهد بما زیاد نمیده چرا خدا اینقدر سخت گرفته بعضی مردم همین میگند الله تعالی میفرماید غلت عیدیهم غلت عیدیهم یا خبر است یا انشاه است خبر است یعنی خدا میفرماید دست های خودشون بسته است یا غلت عیدیهم دعا علیهم بالبخل المزموم یعنی دست های خود اونها قفل بشه، بسته بشه، دستشون کار نکند ولی ظاهرا از ادامه معلوم میشه که این خبر است. الله می‌فرماید: غلط ایدیهم، دستهای خود اونها بسته است، بخل در وجود خودشون است. ولعنو به ما قالو، و اینها ملعونند. مورد لعنت خدا قرار گرفتند، مورد نفرین قرار گرفتند، به سبب آنچه که گفتند. با این گفته اینها مورد خشم و نفرین خدا قرار گرفتند بل یداه مبسوطتان بلکه دست های الهی مبسوطتان یعنی فراخ است باز هست خدا همیشه به بندگان میده یک لحظه خدا جلوی رزق را بگیرد همه عالم جان می میمیرد یونفق کیف یشا خرج میکند الله همان طور کی بخاحت حکیم است بر اساس حکمتش چهی زیاد چهی کم میده و لا یزیدن کثیرا ما انزله ایک من ربه تغیان و کفر خداوند عزّ و جلّ میفرماید که این اناد یهود اصل الّتیشی الّتیش نزول قرآنه اینها آیات قرآن که نازل میشه این ربار نمیتابند تحملش نمیکنند لذا این آیات و نزول آیات طغیان گری و کفر اونها را بیشتر کند ولا یزیدن كثيرا منهم البته می در بسیاری از یهودی ها چه اضافه کند این کسیر منهم مفعول اول است طغیانا و کفر مفعول دوم هست ما انزل الیک من ربک فاعل است یعنی در بسیاری از این یهودی ها می افضایت ما انزل ایلیک من ربکا قرآن قرآنی که نازل شده بسوئی شما از جانب رب شما این قرآن می افضایت چیشون را می افضایت تغیانا و کفر مفعول دوم است یعنی تغیانگری و کفر اونها را می افضایت هرچی آیه نازل میشه اونها بیشتر انکار می کنند کفرشون بیشتر میشه و نتیجه نتیجه این تو غیان گری نتیجه این کفر نتیجه این ادبی که نسبت به خدای عز و جل انها می کنند اینه که وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الى يوم القیامة ما بین آنها عداوت و بغض و دشمنی یا تا روز قیامت تا روز قیامت باهم دشمنند هم یهود فی ما بین خودشون هم یهود با نصارا گرچه به ظاهر امروز در کنار هم هستند ولی خدا می دوند که انها در درونشون چقدر بر علیه هم دیگر هستند و بخاطر منافع خودشون چیزی نمی گویند و یا یعنی اینکه انها اکثرا بر اون دین خودشون نیستند اسمشون یهودی و نصرانی هست لذا الله می فرماید که کلما اوقدو نارا للحرب اتفعه الله هرگا اینها روشن کردند آتشی برای جنگ خدا را خاموش کرد چندین حربه اینها به کار تا جنگهای در بگیرد بر علیه مسلمانان. چقدر از همین علماء یهود مثل کعب ابن اشرف و دیگران رفتند اهل مکه را تحریک کردند اقوام عرب را تحریک کردند جنگهای را ساختند خلق کردند اما خداوند از زوجه خاموششون کرد نامراد و ناکامشون کرد والله لا يحب المفسدين المفسدین و يسعون في الارض فسادا در زمین فساد را تلاش میکنن و خداوند جنین مفسدین را دوست ندارد بعد از اینکه که خداوند از و جل ذکر فرمود خباستشان را عنادشان را و فسادشان را ترغیب میده خدا میفرمه بعض هم ای اهل کتاب برگردید برگردید به سوی کتابتون کتابهای اونها که تورات و انجیل باشند اونها را امر میکند به ایمان آوردن به خاتم النبیین به تبعیت و فرمانبری از ایشون و نصرت و یاری دین ایشون برگشتن به این معنی هست عمل کردن به قرآن به تورات به انجیل به این معنا ولو ان اهل الكتاب امنوا اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا و پرهیز بکنند از سی، از کفر و از شرک و از خرافات گذشته شان لکفرنا عنهم سیئاتهم ما دور میکنیم از سیعات سیئات و جزای سیئاتشان را و جنات النعیم البته حتما انها را داخل میکنیم در جناتی که سرآپ نعمت است ولو أَنَّهُمْ أَقَامُوا التوراة والإنجيل اگر انها برپا کنند تورات و انجيل را يعني بأصل تورات و انجيل عمل کنند إليهم أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ آنچه که نازل شده بسوئ از جانب ربشان يعني بواسطه پیامبر آخر الزمان يعني بقرآن عمل کنند اگر به تمام کتابهای آسمانی ببینید یکی از خواص کتابهای آسمانی اینه که هر انسانی به اون عمل کند خداوند عزّ و جل در زندگیش برکت آیت می میفرماید در زندگیش برکت آیت می میفرماید لذا الله میفرماید لا اكلوا من فوقیم و من تحت ارضیم اون وقت میخورند من فوقهم از بالا سریشان ومن تحت ارجلهم از زیر پایشان می یعنی چه از بالای سر یعنی المطر از زیر پا النبات وقیل المانا لو سعنا عليهم في ارزاقهم و اکلو متواصلا یعنی خدا می فرما ما انقدر غسعت می رزقشون را که متواصلا پایابه هر چی بخورن تمام نشه منهم امت مقتصده بعضی از همین یهود الله میفرماید که گروهی حسن میان روح اما میان روح منظور اینه که اهل توحید اهل ایمان مثل عبدالله ابن سلام مثل نجاشی مثل عدی ابن حاتم مثل بقیه علما هم یهود هم نصارا کی ایمان آوردند و كثير منهم سا اما یعملون بسیاری از اونها بد از عملشون آنچه که عمل میکنن بسیار بد عمل میکنن یعنی اکثرشون عملشون کردارشون بد است اما بعضی ها انصافا آدمای خوبی هستند یا ایوها الرسول بلغ حال الله عزوجل میفرماید این یهود رطب عرض میکنم این یهود هر چی خباست دارن هر چی فساد دارن نصارا، اهل کتاب دشمنان شما ای پیامبر تو پرواز داشته نباش نه بترس از اونها نه پروای اونها داشته باش شما کار خودت را بکن تبلیغ بکن پیام الله عزوجل را آن که حق است برسان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تو بصورت کمال و تمام برسان آنچه که نازل شده تو از جانب ربّت و این لم تفعل اگر بالفرض والمحال انکار را نکردی فما بلغت رسالته تو رساله پروردگار را پیام پروردگار را شما نرسان والله و يعصم من الناس اگر خطری متوجه شما باشد سوی دشمن و مشکلاتی باشد خداون شما را از مردم حفاظت می کند والله یعصمک من الناس از مکر اونها از توطئه اونها الله از و شما را حفاظت می کند ان الله لا یهدی القوم الكافرين خدای عز قوم کافر را هدایت نمی کنی یعنی توفیق نمی و راهنمایی نمائی نمی کند که ضربه بزنند بزنن شما آسیب برسونا خب ببینید این آیه معروف هست به آیه تبلیغ خدا تعالی اینجا به پیامبر خودش گفته که بلغ ما انزل ایلک من رابیک اولا تفسیر صحیح و مفهوم آیه را بیان می کنم که خدا از به پیامبرش میگه ای پیامبر هر که بر شما از جانب به نازل شده هم از ایمانیات اعتقادات احکام دستورات پروردگار همه را به دیون کم و برسان به مردم برسان به مخاطبینت برسان و اگر این کار را نکردی کوتاهی کردی شما رسالت در رسالت خودت کوتاهی داشتی نرسوندی. و اگر از مردم می ترسی که مردم به تو آسیب و زرد برسانند، والله و الله و عصم و کمن الناس خدا شما را از مردم حفاظت می کند این مفهوم آیه است چه چی چیزی را برسند؟ توحید را ایمان را عقیده را عقیده به قیامت را احکام را تمام دستورات پروردگار را که در باره اقاعده اس درباره احکام است درباره معاملات است درباره معاشرت و آداب و حقوق است درباره اخلاقیات هست همه را من و عن برسان خرد و کلانش را برسان کوچک و بزرگ را برسان و در پیام رسانی هیچ نوع کوتاهی نکن اما بعضی از عزیزان شیعه این آیه توری طوری دیگه تفسیر میکنند چیزی تفسیر میکنن که شما هم آیه را میبینید هم ما قبل آیه را خواندید ان الله ما بعد آیه را میخوانید هیچ نو اشاره به این مطلب که اونها میگن این آیه ندارد. اونها میگویند که برسان آنچه که نازل شده بسوی تو از ولایت علی یا از امامت علی من ولایت علی یعنی اعلام کن خلافت علی را بینها ولایت علی را و امامت علی را که بعد از شما علی هست و اگر می ترسانی که اطرافیانت به تو آسیب ببرسانا والله یعصیم که من الناس خدا شما را از مردم حفاظت میکنه. هر جا این آیه نوشته و به عنوان ای که دال بر خلافت بلا فصل ایشون هست دلالت می کند اولا ما قبلن هم گفتیم عقیده ما را همه میدونند که ما در رابطه با جایگاه سیدن علی رضی الله تعالی جلالت و بزرگیشون و اینکه از خلفای راشدین هست هیچ ما در این باره بحثی نداریم شکی نداریم این یک مسئله متفقه عند اهل سنت است. اما بلا فصلش آیا بدون فاصله بعد از آن حضرت صلی الله عليه و وسلم این جایگاه مال ایشون هست و از این آیه این مسئله اثبات در این جای بحث داره ببینید این برادران معتقدند که این آیه در روز عرفات در حجت الوداع نازل شد در اون روز خدای عزوجل گفتند فرمودند که اعلام بکن بعد از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این, این اعلام کرد. چونی اینه که وقتی خداوند فرموده بلغ ما انزله الیکمین ربک این پیام را به مردم برسان این ولایت و خلافت بلا فصل را به مردم اعلام کن آیا اعلام کردن؟ میگوین بله در غدیر خم اعلام کردند، اونجا فرمودن من کنتو مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والا الى آخرهی که این روایت غدیر خم در کتاب های ما هم در بعضی کتاب هم آمده گرچه بعضی قیل و قال می کنند اللهم تیمیه میگه این روایت مشکل داره ولی علی ای حال ما گیریم که این روایت هیچ مشکلی نداره این روایت روایت صحیحی هست ولی آیا معنای مولا حاکم است معنای مولا از کنم که امام هست اگر معنی مولا حاکم هست، امام هست، خلیفه هست، پس آیه را شما دیروز خواندید درباره باره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ خداوند هم مولای رسول اللہ هست، هم جبریل است و هم صالح مؤمنین. مؤمنین صالح یعنی اونها حاکم رسول اللہ هستند، اونها امام هستند، علیہ آزباللہ مولا، ماناش من مانا دوست است. ساده جمعیت مولا از کنم که چرا مولا به من پسرم هم می آید؟ مولا به من آغا هم می آید؟ مولا به من غلام آزاد شده هم می آید؟ مولا به من دوست هم می آید؟ مولا به من حامی هم می آید؟ بیست مانا بیست و پنج برای مولا ذکر کرده اما در هیچ مانای به بمانه خلیفه و حاکم نیامده لذا اولا ما میگیم که این استدلال استدلال نادرستی هست در ارتباط با غدیر خم، اون جریان چیزی دیگه بود اون بحث این آیه با اون ارتباطی نداره شما که میگید این آیه را بعدا اونجا آن حضرت صلی الله علیه و سلم به آیه عمل کردن چرا نه روز بعد چون عرفات بعد از عرفات نه روز بعد اون اتفاق قدیر خواهر مفتاد این نه روز نه روز که گذاشت آن حضرت صلی علیه و سلم از چی کسی بیم داشت از چی کسی می ترسید و دوفمان جمعیت یک بخش بزرگی از جمعیت دیگه بان حضرت همراه نبود اینجا در عرفات همه همراه بودند در کنار خانه کعبه همه همراه بودند چرا اینجا اعلام نشد همه مسلمانان مشغول حج بودند اونجا که رفتن در اون دراهی غدیر خم یا سراهی غدیر خم اون سرایی بود که از اونجا یک راهی به مدینه می رفت یک راهی به یمن می رفت چون مردم یمن داشتن از پیامبر صلی الله علیہ وسلم جدا می شدن و سیدنا علی هم با مردم یمن آمده بود از یمن آمده بود در حجت الودا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایشون را برای معموریتی جماوری صدقات فرستاده بود از اونجا داش می آمد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از علی پرسید که شما که آمدید برای احرامت چه نیتی کردی؟ احرام تمتو، حج مفرد، حج قران گفت من نیت کردم خدا یا من احرام می بندم به همون چیزی که نبیت احرام میبندم من این طور کردم آن حضرت صلی الله علیہ وسلم فرمود پس بعد از عمر خودت را حلال نکن آزاد نکن بس سیدنا علی از یمن آمده بود اونجا هم سرایی بود که اهل یمن داشتن جدا می شدند می به طرف یمن اونجا ان حضرت صلی علیه و سلم این مطلب را فرمود معلوم می که این مطلب مربوط به اهل یمن بود این مطلب مربوط به اهل یمن بود با بقیه کاری نداشت اونطوری که گفتند در کتاب ها و در تاریخ آمده که یک سری اتهامات ناروا و بیجایی بعضی از مغرزین بر سیدنا علی داشتند در رابطه با همین جماوری صدقات بعد از اینکه آن حضرت بررسی کردند دیدند این اتهامات بی اساس است اونجا سیدنا علی دفاع کردند که ایشون دوست من هست ایشون پسرعموی من هست ایشون برادر و نزدیک من هست و هر کسی که من دوست داره بایدیشون رو دوست داشته باشه لسه اونجا در دفاع از اون مسئله بود هیچ ارتباطی با این آیه ندارد این آیه با این موضوع ندارد و دوم دو سوم که میگویند این آیه نازل این آیه اصلا در حجت الویدار نازل نشده این آیه در مدینه منور نازل شده علامه ابن کثیر چندین روایت آورده از مختلف هم ذکر کرده که بسیاری از صحابه نگهبانی داشتند اطراف حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم که دشمن حمله نکند تا این که این آیه نازل شد الله فرمود والله يعصمك من الناس رسول الله صلی علیه و وسلم سر را از حجر مبارک بیرون آوردن و به صحابه گفته شما برید الان خداوند خودش تکفل فرموده که از من حفاظت می کند و در بعضی روایت ها داریم که اون زمان عبدالله ابن ابی زنده بود الله تعالی فرموده بود با یهود و نصارا لا تتخذ اليهود و نصاره اولیاء اما اون ابن ابی دوستی داشت بعد از اون نازل شد چون که احساس خطر می شد هم از سوی یهود و نصارا هم از سوی منافقین عبدالله ابن ابی این آیه خداوند عزوجل نازل فرمود صحابه داشتند نگهبانی میدادند رسول الله فرمود که شما برید چون خداوند فرموده والله يحسمک من الناس لذا این آیه چند سال پیش از حجت الوداع حجت الوداع سال النهم هجری بود این آیه چند سال پیش اون زمانی که عبدالله ابن ابی زنده بود دو سال پیش حد اقل این آیه نازل شده لذا الله عز وجل می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اونچکی نازل شده بیسوی شما از جانب ربت ون رب لسان و ان لم تفعل وگر اینکار انجام ندادی فما بلغت رسالت. حال ببینید یک ایراد و اشکال بزرگ دیگری اینکه ما در اصول دین چندین چیز داریم یکی توحید است، یکی رسالت است، یکی قیامت است. اینها جز اصول دین هستند. خدا تعالی با چه شفافیتی با چه دلائلی با چه مثالحائی ہمیں ربیان کردیں ہم اثبات توحید با انواع مثالحا ہیچ سوری ہی نیست کہ نباشد با انواع دلائل اقلی نقلی گزشتی حال ہمچنین برای رسالت عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمچنین برای قیامت ہمیں با چه تحقید شوابی بھی نیست ہیچ سوری ہی نیست کہ از این سے مضمون خالی باشد بعد بر اساس این عقیده اگر بحث امامت چون امامت را هم از اصول دین میدانند جزء جز اصول است این چطور جز اصول هست چون ما معتقدیم که مسئله خلافت بستگی به مسلمانان داره رسول الله صلی علیه و سلم اشاراتی فرمودند هفته نماز ابوبکر صدیق را امامت هم دادند در حیات خودشون اینا همه بیانگر این است که ایک سری تاییداتی بود اما از طرف شارع از طرف خدا و پیامبر تایی نشده به مسلمانان بستگی داره اما اشارتی شد اگر مسئله امامت جز اصول دین هست و از طرف خدا اعلام شده از طرف پیامبر اعلام شده بقیه اصول دین را ببینید با چی شفافیتی بیان میشه اینجا پیغمبر علی الله از کی میترسه از کی بیم داره که خدا میگه شما را از اون دشمنان اتما محافظت میکنی شما اعلام بکن و بعد پیغمبر چرا بعد از این که بر اساس همین قول بعد از این که این آیه نازل میشه نه روز بعد از این اعلام میکند اون هم در با چه اشاره و کنایه و با چه احس کنم که احتیاطی در لفافه کلب مولا بکار میبره کتاب امروز در بارے مولا اختلاف هست کسی نمی دونه که معنی مولا واقعا اینه یا اونه ایسا اینها اگر واغن امامت جزء اصول دین هست چرا شفاف واضح بیان نشده یک جایی حتی نامیشون ذکر نشده بنابراین مشخص هست که این مسئله جزء اصول نیست این مسئله منصوص هم نیست این مسئله،, مسئله ای هست که خدای عزوجل سپرده این را به مسلمانان سپرده مسلمانان خودشون البته اشاراتی بود در احادیث متعدد هر جای انا و ابو بکر و عمر انا و ابوبکر و عمر بار بار آن حضرت میفرم اینا تمام اشاره هستن تا اینکه مسلمانان بر اساس اون چی که منویات رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بود تعیین کردند. لذا این آیه ربطی با این مسئله نداره. قل یا اهل کتابی لستم علی شیئن خب ببینید خداوند فرمو بلغ ما انزلی علیکم ای ربک. ای هر چی که سوی شما تبلیغ شده برساند. الان قل یا اهل الكتاب اینم جز بلغ است. لقد كفر الذين بعدن میاد کفر النصارى اعلام میشه کفر عقیده تسلیس بیان میشه کفر عقیده عینیت که میگوین ایسا عین خداست یا ایسا سومین خداست همه ها بیمش اینا تمام جز بلغ ما اونزلی من ربکا است. شیخ بزرگوان میفرم بقی الان مسائل کی میعایت اینها جزء انها هستن انها, انها را اعلام بکن بحثی که یک قومی گرفتار انسان پرستی و عیسی پرستی هست انها باید اعلام بشه مسائلی که مهم هستن انها هستن لذا اولین چیزی که بعد از ما انزل ایلیکا اینجا در این آیه داخل است، قل یا اہل الكتاب لستم على شیع آنان بگو ای اهل کتاب لستم علاشه برش هیچ چیزی نیستید حتی تقیمو التورات و الانجیل حتی که برپا بکنید تورات و انجیل را وما انزل علیکم من ربکم آنچه که نازل میشه بسوی شما از جانب رب شما آنچه که نازل شده یعنی قرآن را بیتورات و انجیل و قرآن عمل کنید بعدا شما جایگاه داری پیش خدا و هیچ عزتی عزت و هج جایگا ندارید ولی زیدان کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفر اما بجا که به عمل کنند به قران پایبند باشند این قرآن آیات قرآن که نازل میشه بجا که ایمانشون را اضافه بکنه طغیان و سرکشی و انادیشون را بیشتر میکنه چرا کفرشون را بیشتر میکنه چرا تغیانگریشون را بیشتر میکنه چون اناد دارد بدترین من از اناد است اناد و تعصب انسان را از بالاترین نعمت که ایمان باشد حتی محروم میکند ببین اینا اهل کتاب بودند اینها از نظر فهم و درک و در یافتن واقعیت هیچ مشکل نداشتند اما چه چی چیزی اینها را محروم کرد تعصب و عناد لذا الله می فرماید ولا یزیدان ان كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیا و کفرا البته می در بسیاری از یهود و نصارا به دلیل تعصب و عناد چی می قرآن ما انزل ایلیک من ربکا ما انزل ایلیک می افزاید از جانب رب شما ما انزل ایلیک بوده تغیان ان کفر و کفرات در تغیان گری و کفرش هم می افزاید فلا تأسا علا القوم الکافرین ای پیانبر غمگین ما حزین ما بر قوم کافر وقتی که تحصب دارد ایمان نمی آورد شما غمگین نباش بعد الله عز وجل همه این گروها را ردیف می و تنها راه نجات را بیان می فرماید ان الذين امنوا والذين هادوا همانا کسانی کی ایمان آوردند و پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هستند والذين هادوا و, هادو و کسانی کی یهودی شدند و پیرو عیسی خودشان را و وصابئون و کسانی کی صابی هستند و پیرو ابراهیم برای دیگر و کسانی که نصارا هستن و خودشان را عیسی می دارن من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا هر کسی ایمان بیاورد به خدا و روز آخرت و عمل صالح انجام بده از این ببینید یه ای وقتی فکر نکنید اونطوری که بعضی می وحدت ادیان هر کسی بر دین خودش بماند ولی فقط عمل صالح انجام بده نه خداوند تعالی این عنوانها را ذکر فرمود و بعد از این عنوانها شرط نجات و مدار نجات چی فرمود من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا اولا توحید و قیامت آمن بالله توحید است و اليوم الاخر چی است؟ قیامت است وعمل صالحا عمل صالح من قبلا چند بار خدمتشو ارز کردم عمل صالح شرطش اینه که مطابق حکم خدا و سنت رسول الله باشد مطابقی چی باشد دستور خدا و سنت رسول الله باشد عمل صالح اونه پس وعمل صالحا از اینجا رسالت هم ثابت میشه یعنی اگر به پیغمبر ایمان نداشت اون ناجی نیست اون عمل صالح انجام نداده عمل صالح اون معتبره اون معتد به و مقبوله که طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ماشاءالله صل كما رایتمونی اصلي خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لذا لمن كان يرجو و الیوم الاخر همین ایمان به خدا و روز اخر امین هر کسی ایمان به خدا و روز اخر داره باید ایشون را الگوی خودش قرار بده در عمل صالح از ایشون تبعیت بکنه پس <coughs> گویا خداوند در این آیه به یهود، نصارا، صابئین به همه توصیه میکند چند چیز لازم هست اول توحید همون گونی که خدا گفته من امنه بالله دوم قیامت همون که خدا گفته نه اینکه شما بگید قیامت لن یدخل الجنه الا من كان او نصارا لن تمس النار الا اياما معدوده این ایمان به نمیخوره ایمان واقعی این دو سوم عمل صالحان بر اساس الگویی که ما الان تعیین کردیم در زمان آخر که اون الگو نبی خاتم است آخرین پیانبر خداست بر اساس این الگو عمل سال انجام دادن محنش اینه که همه این گروه ها یهود نصاره صابعین اگر ایمان به توحید و به قیامت و به رسول الله داشته باشند فلا خوفون علیه مولا هم یحزنون هیچ خوفی برانان نیست و آنها غمگین نخواهند شد یعنی برای آینده خودشون هم حزین نخواهند شد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا اینجا بعض هم زجر و سرزنش هست که این بنی اسرائیل مگر کدوم پیمان را پایبند بودند تنها این پیامبر نیست که این را انکار می هر پیامبری که خلاف هوای نفس اونها مطلبی میگفت اینها کفر میکردن لذا معنای این آیه اینه که عهد عهد شکنیه اینها دیرینه هست و نه هست جدید و تازه نیست لقد اخذنا ميثاق بني اسرائیل اما ما میساق بني اسرائيل را گرفتيم پیمان از بني اسرائيل گرفتيم و ارسلنا اليهم رسلا و فرستاديم بسوي انهار رسول رسول فرستاديم پيامبران فرستاديم كلما جاءهم رسول بما و تحوا انفسهم هرگاه ميامد پيش آنها رسولي كه و لا انفسهم با اون مطلبی با اون پيامي با اون تعلیماتی کی لا تهوا انفسهم نفسي انها نمی نمیخواست یعنی مطابق خواهش و میل نفس نبود فریقا كذبوا وفریقا يقتلون یک گروه آنها ازانها تکذیب میکردن پیغمبر ما را و یک گروه در سدد قتل اونها میآمدند وحسبوا الله تكون فتنه و هم الشیطان تهار می پنداشتن گمان میکردند که اللہ تکونا فتن هیچ نوع ابتلا و عذابی برای او نخواهد بود انسان اوج مغروریتش و اوج بدبختیش اینه که فساد می کند بعدا فکر نمی کند که عذابی بیاد برای من فکر منو هر کار بکنم هیچ مشکلی برای من نیست نه در این دنیا عذابی هست نه در اون دنیا لذا اینها بر همین پندار بودن بر همین عقیده بودن و حسبو الا تکون فتنه می پنداشتن که هیچ نوع عذابی و ابتلای نخواهد بود به همین دلیل فعمو و صمو هم بینایی خودشون را از دست دادند و هم شنوایی خودشون را یعنی حواس خودشون را کور شدند و کر شدند کور و کر کنایه سی از زلالت است، گمراهی است. لهم لهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها این درباره چی کسانی گفته شده؟ انسان هگز گمراه ضال پس فعمو و سموا معنیش که اون انبیاء را تکذیب کردند کشتن شهید کردند گمراه شدند ثم تاب الله عليهم سپس خدای عزوجل بر اونها رجوع کرد بر اونها رجوع کرد یعنی چه یعنی خدا عزوجل اسباب توبه را فراهم کرد برای اونها اسباب توبه را فراهم کرد اسباب توبه چی است پیغمبر فرستاد مراد از پیغمبر عینا تاب ثم تاب الله عليهم حین تاب و امنوا بعيسى یعنی عیسا فرستاد ثم تاب الله عليهم خدا بر اونها رجوع کرد سمعمو وصمو اما سپس هم انها راه زلالت را انتخاب کردن دوباره کروکور شدن بسیاری از اونها، بعضی به عیسی ایمان آورد اما بسیاری کفر کردن والله بصیرون بی ما یعملون خداوند عز و جل بی اون چی که اونها عمل می خوب می دانن اما این ایمان آوردن به عیسی بعدن در ایمان آوردن به عیسی هم دچار انحراف شدند انحرافاتی که یهود و بنی اسرائیل گرفتار انها شدند چی این که در ادامه میاد لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ببینید ما در باره عقاید مسیحیان دیروز هم مطلبی ارز کردیم اینجا هم جلوتر می که فاغرینا بینهم العداوت و البغضه اصلش اینه که مسیحیان در مسائل اعتقادی خودشان در اصول خودشان چندین نظر دارن که سرگردانند یک نظر نظر عینیت هست که اینجا میخوانیم عینیت اینه که عیسی علی و سلام را عین خدا میدانستند معتقد بودند که دو ذات نیست یک ذاته در آسمانها خداوند هست و در زمین به شکل عیسی مسیح هست این نظر اول هست لذا بعضی میگوین که شای عبدالقادر میفرماید بعضی میگوین خداوند همینه که سوی مسیح به صورت مسیح ظاهر شده به صورت مسیح ظاهر شده اما بعضی دیگه میگویند که نه خداوند ازدوجل سه جز دارد چند جز دارد؟ سه جز یکی خود خداوند هست و یکی روح القدس هست و یکی ایسا هست بعضی میگن نه سه جوز روح القدس را نمی آورند مریم را می آورند چون در قرآن مجید ما می خوانیم در همین سوره می خوانیم که خداوند از حضرت عیسی می می میپرسد پرسد انت قلت اتخذونی و امی الهین من دون الله شما گفته بودید من را و مادر من را به عنوان دوتا معبود انتخاب کن معلوم میشه که مسیحیان اون زمان هم ایسا را می پرستیدند هم ایسا پرست بودند هم مریم پرست بودند اما مسیحیان امروز که عقیده تسلیس دارند مریم را مقدس می, می نامند و می اما جز سوم روح القدس را میدانند. امروزه امروز مسیحیان میگن یک جز خدا یکی ایسا مسیح است یکی روح القدس یبریل است پس در همین عقیده تسلیس دو گروه هستند و یکی دیگر از نظراتشون همون ابنیت هست عیسی ابن ابن الله هست لذا اینقدر اینها ها متشتتن متفرقن در جزیات هیچی در همین تعین خدایشون موندن که خدا آخر کدوم یکی شد خدا یکیه اگر یکی هست عیسی است یا خدا است. یا هر دو یکی هست یا نه هست ولی عیسی فقط فرزندش است یا نه سه خدا هستند در همین اولین مساله هر از کلام دینی و ایمانی که تعین خدا است اینا موندند تا چه بر سبب بقیه مسائل لذا الله یا عزوجل می فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم هماناکو کردند کسانی که گفتند بدرستی که خداوند همون عیسی ابن مریم هست و قال المسيح در حالی که مسیح انطور گفت یا بنی اسرائیل اعبد الله ربی و ربکم ای بنی اسرائیل اینجا دلیل نقلی از خود عیسی ای بنی اسرائیل عبادت کنید الله را آن الله که رب من و رب شماست چرا انه من یشرک بالله همانا شان این است که هر کسی شریک بگیرد با الله در الوهیت یا در خواص الوهیت خواص مثل نافع دار آلم الغیب غیب فقد حرم الله عليه الجنة همانا الله حرام فرموده بر اوم بهشت را او جهنم جهنم برای او لازم هست و بر او حرام هست و مأواه نار و, و جایگاهش آتش هست و مال الزّالمین من انصار و هیچ کسی سفایتی اورهم نمی‌کند سفارش برای او نمی‌کند و مال الزّالمین نیست برای چرین ظالمین هیچ نو انصاری نیاری یا وری. پس انهاي داشته باشید که بعضی از مسیحیان این هستند این را قبلنم خدمت شما ارز کردم که اینم در بلغ ما انزل ایلیک من ربک داخل است یا ایوه الرسول بلغ برسان یکی از اونها این است که لقد كفر الذین قالوا ان الله و المسیح مریم هر کسی که اعتقاد داره که خدا و عیسیه که ان کافره را برسان و همچنین برسان لقد کفر قالوا ان الله ثالث و سلس. اختلاف دیگر اینکه انها معتقدن که اناللہ سالس و سلاسا السطا اللہ تعالی سوومی هست در حالی که وما من اله الا اله واحد نیس هیچ معبودی مگر معبودی گانه اللہ می فرماید و ان لم ینتهو پس انها هم کافرند که عقیده تسلیس دارن. اما انجا تخویف اخراوی برا انها است و ان لم ينتهوا اگر باز نایاند از آن میگویند ازان کفرگویی که میکنند از آن چیزی که میگویند اما میگویند تفسیر جلاله نوشته من تسلیس تسلیس کان ها میگویند اگر از این باز نایاند لمسنا الذين كفروا منهم عذاب الیم حتما حتما میرسد به کسانی که کفر کردند از آنان آنن عذابه دردناک و باز الله ترغیب به توبه میده. افلاهیاتوبونه ایالله و استغفرونه. آیا اینها رجوع نمیکنن توبه نمیکنن به سوی خدا و مغفرت نمیطلبند. در حالی که الله غفور الرحیم. یعنی خداوند باوجود این کفرگوییشون، باوجود که این کفر از اقبح الکفر هست و این شرک از بدترین شرکه که برای خدا سیجوز ثابت بکنی با وجود این الله می فرماید که برگردید بیچاره توبه کنید اگر توبه کنید خداوند را غفور و رحیم میبینید بعد از این الله تعالی حقیقتی را بیان می فرماید که عیسی عیسی ابن مریم است عیسی ابن الله نیست رسول خدا است خود خدا نیست رسولی هست که رسول جدیدی نیست قبل از ایشون هم رسول زیاد آمده و دیگه مادرش در این جملات همه یهود و نصاره رد میشند مل مسیح ابن مریم هم رد نصاره است الا رسول هم رد نصاره است هم رد یهود است چونکه یهود هم به عنوان رسول قرار غبول نداشت و نصاره هم معتقد بودن که بالاتر از رسول است ابن الله است و بعد و امه صدیقتن از این هر دو گروه رد میشم بالخصوص یهود که اونها مادر اشرا الیازب الله عفیف الن پس الله تعالی در این دلیل حقیقت عیسارا و حقیقت مادر را و همچنین خصوصیات عیسارا بیان فرمود که در این هم نفی الوهیت شد هم نفی انتهمت شد و اثبات رسالت شد اثبات عبودیت شد لذا انچه که واقعیت درباره عیسی این هست. مل مسیح ابن مريم نیست مسیح ابن مریم الا رسول، مگر رسول ن خدا، ن جز خدا، ن ابن خدا. نه خدا نه جز خدا نه فرزند خدا قد خلت من قبله رسول همانا گذشته قبل از ایشون رسول گذشته رسولی که صاحب معجزات بودند و امه صدیقه مادرش صدیقه هست عفیفه هست زن پاکی هست نه اله هست نه جز اله هست کانا یعکلان طعام هر دو غذا می اینم رد نصاراست رد علویت شونست کسی <تصفح> که خدا باشد گرسنه نمیشه نیاز به غذا پیدا نمیکنه کنه انظر کیف نبین لهم ال آیات اللہ می ببین چگونه واضح و روشن بیان میکنیم ما برای آنان آیات را برای نفی علویت ایسا برای اینکه عیسی علویت نفی چطور ما واضح بیان میکنیم ثم منظر انا یعفکون سپس نگاه کن به کدام سمت سو انها برگردانده می شوند یعنی تعجب انجاز که وجود این همه دلایل بازم به انحراف کشیده می شوند و منحرف کرده می شوند و حال خدای تعالی استفحام بیان می فرماید اما با این استفحام سرزنش اونها است قل آتعبودون من دون الله بجوئن سارا ایشما عبادت میکنید به جز الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا نفع آن خدايان و آن معبودانی مالک نیستن برای شما ضرر و ننفر نه مالک نف و ضرر هستند نه از احوال شما خبر دارند والله هو السمیع العليم الله از که هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست ایسا و مادرش نیستند بس چرا شما انها را عبادت می کنید و خدای تعالی اونها را از غلوف و از افراد هم برحضر می دارد قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم بگو ای اهل کتاب غلوف نکنید در دین خودتون تفسیر محامی نویشته من تعظیم عیسی و امه یعنی عیسی و مادرشتر که تعظیم میکنید غلوف نکنید افراط نکنید و لا لا تغلو في غیر الحق یعنی غیر از حق چیزی دیگر نگیرید غیر از حق چیزی دیگر انتخاب نکنید ای آخذین غیر الحق نکنیدین کرران ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وشما الذمبال لا كونيت اهواء قوم يعني خيالات فاسده قوم را قد ضلوا من قبل انها قبل الشماء گمراه بودند اونا کی هستند اسلاف شما قبل یعنی قبل زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر مدارک نوشته اے اسلافكم و ائمتكم اسلافكم و ائمتكم الذین کانو على الظلال قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف و ائمه شما کسانی کبر گمراهی بودن قبل از بیسد رسول اللہ. شما این ائمه گمراه گمراهی خودتون را پیروی نکنید اون ائمه گمراهی که علویت ایسا را منها درست کردند عقیده تسلیس را انها درست کردند عقیده اینیت را انها درست کردند شما چرا از این گمراهان پیروی میکنید؟ ما قبلا در سوره مبارک فاتحه خاندیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالين. اونجا خدمت شما ارز کردم که حدیثی هم هست که مراد از مغضوب علیهم یهود هستند و مراد از ضالین نصاره هستند برای مغضوب علیهم چندین دلایل ما خاندیم و باؤ بغضب من الله که باؤ بغضب من الله در کی بود؟ یهود بود پس مغضوب عليهم اونها هستند ولا ضالین مسیحیان که گمراه هستند ضالین هستند این دلیلش اینجاست خداوند درباره مسیحیان میفرماید ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ای پیروان عیسی مسیح شما پیروی نکنید تبعیت نکنید از خواهشات و تخیلات قومی که قد ضلوا من قبل قبل از این گمراه شدند قبل از این گمراه شدند یعنی اسلاف شما که گمراه شدند و عقیده تسلیس را ایجاد کردند و اضلوا كثيرا و بسیار دیگر را هم گمراه کردند تنها خودشون گمراه نشدند هم ضال بودند هم مدل بودند و ضلوا عن سواء السبيل از راه راست انات شده گمراه شدند و راه راست را ترک کردند لذا شما دنبال روی آنها نباشید دمبال روی محمد صلی الله علیه و سلام پیغمبر محبت باشید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و وعيسى ابن مريم اینجا خدای تعالی تخویف دنیوی به ما میفرماید که شماهای که بر کفر اصرار و برگمرهی استرادارید شما مشمول دعای انبیایی تون میشید، انبیای الهی، پیامبران الهی مثل عیسی و داوود که داوود از بنی اسرائیل هست و عیسی بنی اسرائیل است، اما پیامبر مسیحیان هست. این هر دو بزرگوار دعا کردند. دعا کردن کسانی که اینها را ازیت کردند. حضرت داوود چه دعا کرد تفسیر کبیر امام رضا آورده گفت: اللهم لعنهم واجعلهم آیة خدا انها را لعنت و نفرین کن و اینها را آیه و نشانی قرار بده. و دعا ایسال صلیت و سلام چی بود؟ اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. همون طور که اصحاب سب ترد لعنت کرد انها رو لعنت کن خلاص دعای داوود چی شد نتیجه دعای داود قومش تبدیل به میمون شدند و نتیجه دعای عیسی قومش تبدیل به خنزیر شد لذا کسانی که راه کفر و راہ نافرمانی خدا را بگیرند مشمول دعای این پیامبران می شوند این دعا شامل حال انها می شود لذا اگر این پیغمبران را دوست دارید از بدشون بترسید لعن الذين كفرو من بني اسرائيل لعنت شدن کسانی که کف کرده از بنی اسرائیل انها لعنت شدن علالسان داوود و عیسی بر زبان داوود و عیسی ابن مریم یعنی داوود و عیسی ابن مریم اینها را لعنت کرد ذلك بما عسو وكانوا يعتدون چرا لعنت شدند چونکه نافرمانی کردن عصو عسیان اونجا مراد کفر است و کانو یعتدون و این تجاوزگری بمعنی کفر شدید یعنی کفر کردن و کفرشون هم خیلی شدید بود که اون ان پیامبرند دعا, دعا لعنت کردن كانوا لا یتناهون عن منکر انفعلو این کفر مدید است ادامه داشت کفرشون كانوا ليتنا هنا بودند آنها باز نمی آمدند ان منکر بفعلوا از منکری که انجام میدادند لبئ سما كانوا فعلون بسیار بعد از اون چیزی که انجام میدادند ببین ان اون چیزی که انجام میدادن چی بود کفر شدید و کفر مدیدشون بود کثیرا منهم یتولون الذین کفروا انجا خداوند سرزنش بھی فرماید و عطاب منافقان را چرا چنکه منافقین با انو افراد دوستی دارند. با چنو افرادی با همین یهود و نسارا انها بجائن اینکه با اهل ایمان دوستی داشته باشن با یهود و, و نصاری یهود و نصاری که زبان انبیا اینها مورد اللعن قرار گرفتن کانو لا يتناهون ترا کثیرا منهم يتولون الذین کفرون می بینی بسیار یزیم منافقان رکے دوستی با کسانی که کفر کردن لبئس ما قدمت لهم انفسهم بسیار بد هست اون چیزی که انفسی اونها تقدیم کرده یعنی انها دارن انجام میدند چرا بد هست؟ الله اللہ علیم الله اللہ اصلی خاطر بخاطر اینکه خداوند بر انها قذب و خشم فرموده وفی العذاب هم خالدون در عذاب انها ماندگار هستن ولو کانو یؤمنون بالله والنبی وما انزل الیهی خداوند فرما اگر اینها در مسیر درست بودند هیچ وقت با یهود و نصارا دوست نمی شدند منافقین ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی اگر ایمان می آوردند به خدا و نبی خدا و ما انزل الیه اون چیزی که به نبی نازل شده یعنی به قرآن اگر ایمان صادقانه‌ای داشتند متخذوهم اولیا آنها را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردن اما دوست انتخاب کردم ولكن كثيرا منهم فاسقون بسياري يزنه از حد حدود الهي عدول کردم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا انجا خدا تعالى بيان می فرماید تعصب يهود و مشرکین راه اما قبل زنكين آئر ترجمه بکنم مثل بخدمت شما عرض کنم اون اینه که از این آیه معلوم میشه که یهود و مشرکین خیلی نسبت به مسلمانان اناد دارند اما مسیحیان اینطور نیستند مسیحیان انادشون کمتر است خب بعضی مطلق این را میگویند این مطلق نیست امروز مسیحیان انادشون از یهود کمتر نیست و جنگ های سلیبی که در گزشته راه انداختم بر علیه مسلمانان تا جایی که می توانستن مسلمانان را قتل عام می کردند بدترین احوال را بر مسلمان ها آوردند امروز هم می بینیم که دنیا مسیحیت هر جا یورش می بره بر بلاد اسلامی اشغال می به نظر شما اینا دوست ما هستند دشمن سرسخترین دشمن هستن امروز خب پس معنی آیه چی هست که اون دو گروه یهود و مشرکین را بدترین دشمن قرار داده این مسیحیان را گفته اینا اقرب هم موده هستن پاسخ اول اینه که این در ارتباط با مسیحیانی هست که ایمان آوردند در ارتباط با مسیحیانی هست که ایمان آوردند خیلی ها این آیه را مصداق آیه را نجاشی قرار دادند شاه حبشه اتیوپی زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ساوه مشوره میکردند کجا برند به گفتند که خبر دادند که شاه حبشه پادشاه حبشه یک فرد عالمی هست و عالم دوستی هست و مذهبی هست لذا ظالم نیست عادل است. چون اون مسیحی واقعی بود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونجا فرستادند گفتن شما اونجا برید چند خانواده از صحابه بودند حضرت جعفر ابن ابی طالب هم همراه بود اما وقتی که اونجا رفتن مشرکین خبردار شدن مشرکین چکار کردند حدایه برداشتن با خودشون بردند تا اینکه که به نجاشی بفهمانند که اینا دشمن است اینها را نگذارید اونجا وقتی بردن هدایا را و گزارش دادن که اینا از پیش ما فرار کردن اینجا آمدن پناهنده شدن نجاشی کنچکاف شد قبلا پناهندگی داده بود گفت بیارید اینها را آوردند و در باره دین اونها تحقیقاتی کرد سوالاتی کرد و حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ آیات سوره مبارک مریم را خان که در رابطه با مریم صدیقه است وقتی که نجاشی شنید بدون اختیار او و احبار و که در کنارش بودند اشکشون جاری شد گریه کردند و بعد ایمان آوردند پس مراد نجاشی و علمایی که در کنار نجاشی مراد مسیحیان مطلق نیست اونها هست اونها ایمان آوردند و قول ذوهم اینه که اگر مراد از این غیر مومنین باشند از مسیحیان مسیحیان زمان رسول الله ص این احوال مربوط به زمان رسول الله ص اون زمان چنین شرایطی داشتن زیاد دشمنی نداشتن مثل نصارا نجرا نصارا جای دیگه اینا بالاخره آمدند دو حتی فیدیر قبول کردند لذا الله می فرماید لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود البته حتما حتما شما میبینی سخت ترین مردم را از نظر عداوت برای مؤمنین اليهود یهودی ها هستند و الذين اشرکو مشرکین هستند ولا تجدن اقربهم می بینی نزدیکتر از نظر دوستی برای مؤمنان انهایی هستن که قالوا اننا نصارا انهایی میگن ما نصارا هستیم اینجا عبارت علامه خطابی در معالم التنزیل بخونم برای شما که فرمون لم یورد به جميع النصارى تمام نصارا مراد نیستند لانه في عداوت اليهود فی عداوه المسلمین کل هنا در دشمنی با مسلمانان مثل یهودند فی قتلهم المسلمین و اسرهم جنگ‌های متعددی دلالت در گینه مسلمانان را چقدر کشتند اسیر کردند و تخریب بلادهم و هدم مساجدهم بلاد را تخریب کردند مساجد را منهدم کردند و احراق مصاحفهم و قرآن‌ها را سوزاندند لا وَكِرَامَتُ اللَّهُ این آیت در رابط با کرامت و در تعریف کردن ازین نصارا نیست بلی الآیت فی من اسلم منهم مثل النجاشی و اصحابو پس آیه در باره مسیحیانی است که مسلمان شدند مثل نجاشی لذا لسا وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً نزدیکترین کسانی هستن که گفتن اننا نصره. ذلك بان منهم قسيسين این الهه قربشون است چرا به مسلمانان اینقدر نزدیکند ذلك بان منهم قسيسين و رهبانان این به سبب این است که بعضی از اینها قسیسین هستند قسیس میگویند که علم دوسترا قسیس کسی کی چی باشد علم دوست باشه یعنی با علم خیلی سروکار داره و روحانی در آویش را میگن تاریکان دنیا را میگویند ببینید معلوم میشه که در ادیان گذشته دی روز یهود هم خاندیم یحکم بی هن نبیون هادو حادو و ربانیون یهودی ها را سبخش کرد یکی ایحادو اموم یهود یکی والربانیون دراویش سووم والاحبار علماء اینجا هم مسیحیان را دو قسم می کنین ہم بعضی از مسیحیان قسیسین هستن یعنی علماء و علم دوستانشون و روحبان بعضیها عباد و زہاد و تارکان دنیاشون معلوم میشه که از همون زمان قدیم در همه ادیان این دو گروه بوده هم علمایی بوده علما راسخین و هم دراویش و صوفی هایی که اونها با بغی مسائل کار نداشتن خودشون رو کنار کشیدند و به طاعت و بندگی و عبادت خدا پرداختن کار نداریم به دلیل بی علمی گاهی چی شدن دوچار انحراف و زلالت هم شودند ولی بودن کسانی که تارک دنیا هستند چندین جا قرآن نزدیک را یاد کرده لذا در امت ما هم هستند بعضی از علما که کارشون کار شنکار علمی هست بعضی دیگر دراویش هستند و از کنم که تاریکان دنیا هستند که راه تصوف را راه تزکیرا پیش گرفتند اینها هم تا که بر صراط مستقیم باشند، بر جاده شهریت باشند، بر کتاب الله و سنت رسول الله باشند، از اهل حق هستند، از کسانی هستند که قابل تمجیدند، قابل تعریف هستند. مطلقاً کسی که راه درویشی را گرفت نمیشه که اورا الله علیه آزمون راه نامید و اورا منحرف نامید، بلکه انحراف مال کسانی هست که مخالف کتابو سنت باشند لذا الله می فرماید بعضی از اونها علم دوست و عالم هستند بعضی راهب هستند تارک دنیا و انهم لا یستكبرون و ان تکبر نمی کنند و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ان بشارت است برای اونها هرگان گان بشنون آنچه که نازل شده به سوی رسول بعضی میگویند. اینها وقتی که حضرت جعفر رضی الله تعالی برای اینها کتاب الله را خاند سوره مریم را خاند گریه کردن چشمشون اشکبار شد بعضی میگن بعدن بعضی از اینها آمدن مکه مکرمه با رسول الله ملاقات داشتند و آیات قرآن را شنیدند گریه کردن بعضی میگن بعدن حضرت جعفر هفتاد نفر را در مدینه آورد چهل نفر از اینها بودند و سی نفر از نصارای نجران بودند. اونا در محضر رسول الله قرار گرفتن رسول الله برایشون سوره ملک را خواند. اینها گریه کردن بعضی داستانهای دیگه معلوم میشه که جمعی از نصارا خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم رسیدند قرآن شنیدند و گریه کردن خدای حالا اینجا حکایت فرمود و اذا ما انزل الى الرسول هرگا میشنون که نازل شده بسوی رسول ترا اعیونهم تفيض من الدمع میبینی چشمانی انهارک جاريس از عشق مما عرفو من الحق من من سببیه به بسبب آنچه که شناختند حق را حق را شناختند را شناختند حقانیت نبی،, نبی خدا را شناختند بعد از اون دعا کردند یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین می بار اله ای پروردگار ما ایمان آوردیم به کتاب تو فکتبنا مع الشاهدین ما رحم هم با را با کسانی که شهادت می دند. بر توحید تو کسانی که مثل امت محمد صلی الله علیه وسلم شهادت می بر سایر امم قبلا شما خان دیدین را ما را هم جزء آنها بنویس و ما لنا لا نؤمن بالله و ما انا من الحق چه شده مارا ایمان نیاوریم به خدا و چرا ایمان نیاوریم به ما جاءنا من الحق اون چیزی که از حق پیش ما آمده ما جاءنا من الحق حق چی قرآن هست چرا ما به قران ایمان نمی آوریم و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين در حالی که ما طمع داریم انتظار داریم توقع داریم که رب ما را داخل بگرداند همراه قوم صالح قوم صالح مسلمان ها هستند ما در زمره اینها و جزء اینها باشیم فأثابهم فأثابهم الله بما قالوا این قبولیت دعایشون هست الله عزوجل به آنها عطا فرمود اون چیزی که گفتند اون چیزی که آنها گفتند خدا عطا فرمود یعنی چه یعنی ایمان فقمنا مع این را اما در عوض خدا چی بهشون داد بما قالو جنات تجریم سواب به این جنات را بخشید جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها که زیر درختها و قصراش نهرها جاریست همیشه در اون جنات میمانند و ذالک جزاء المحسنین جزای بندگان مخلص من این خواهد بود محسنین و مخلصین جزایشان این خواهد بود اما کسانی که بر تعصب خودشون بمانند بر يهوديت ومسيحيه اصرار بورزند والذين كفروا وكذبوا باياتنا ان هايك كف كنند و بايات ما تكذيب كنند اولئك اصحاب الجحيم النتيجه اخروي انها اهل جهنم هستند انها مال جهنم هستند يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتهدوا ما در ابتدای سوره هم مباحث شرک فعلی را خاندیم شرک فعلی اینه که کسی حلال خدا را حرام بکنت خاطر غیر الله یا حرام خدا را حلال بکنت اینجا اللہ عز و جل همون مضمون سابق را یعنی نفی شرک فعلی را اعادمی فرماید يا الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا اي مؤمنان شما حرام ندانيد و حرام نگيد اعتقادا عملا تفسير طيبات ما احل الله لكم مال الطيب و کی خدا حلال قرار داده برای شما کی خدا قرار داده اون را شما حرام قرار ندهید و لا تعتدوا در حدود شرعی تجاوز نکنید تجاوز نکنید در مورد چی در مورد تحلیل و تحریم تجاوز کردن اینه که چیزی که خدا حلال کرده تو حرامش بکنی چیزی که خدا حرام کرده شما حلالش بکنید این تجاوزه ان الله لا يحب المعتدين بدون شک خداوند جل معتدین و متجاوزان را دوست ندارد و کلوا می‌مَر زِقَکُمُ الله حلالاً طیبها استفاده کنید خوردن هر جا به خوردن نیست در میده و در شکم گذاشتن نیست. الْأَكْلُ فِيهَا ذِهِ الْآیَةُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَتُوعِ بَهْرِ گرفتن مِمَّا رَزَقَكُمُ الله هر چی که خدا رزق داده، چه لباس است، چه مرکب و سواری هست، چه زمین هست. استفاده کنین از آنچه که رزق داده خداش به شما حلالا طیبا فقط از خدا همیشه پرواد داشته باشید تقواد داشته باشید و اتقو الله الذي انتم بهی مؤمنون و از خدا ترسید اون خدایی که شما به اون خدا ایمان دارید لا یعاخذكم الله به لغو فی ببینید اینجا بحث سوگند آمد چه مناسبتی دارد ما قبلا خواندیم که کسی حلال خدا را حرام بداند یا حرام را حلال بداند اینم نوعی سوگند است وقتی که چیزی که برای شما حلال هست شما بر خود حرام میکنید لازم هست که این که بر خود حرام کردی این را بشکنی دوباره او را بخوری و چون بر خودت حرام کردی کفار بیدی کفاری قسم بیدی بنابراین این اینم نوع سوگند هست لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم خداوند عزوجل اینجا بحث سوگند را می آورد سوگند همون طور که از این آیه شریف معلوم میشه سه قسم است و سه نوع هست یکی قسم قسم اللغو هست که خداوند فرموده قسم اللغو اگر باشد خدا شما رو معاخذه نمی کنند. قسم لغف چیه؟ دو تا تفسیر برایش گفتند یکی قسم لغف اینه که بدون قصد بدون اراده قسم به زبان بیاد نمی قسم بخوری اما چون عادت کردن بعضی عرفاه هست عادت کرده آقا بدون نیت بدون قصد والله به زبانش بیاد این لغفه برای این خدا مواجه نمی‌کنه. بعضی گفتن نه لغف اینه که قسم به چیزی بخوری که معتقدی اون چیز به همون صورتی که من قسم می‌خورم در حالی که واقعیت خلاف او هست. مثلا شما فکر می‌کنید عقیده داری که امروز بازار فعاله. شما سوگند یاد میکنی که بازار فعاله چون تو زهن تونست واقعا فعاله فکر نمیکنی من دارم به دروغ قسم میخورم در حالی که فعال نیست خب اینجا انسان بر اساس اون علم و ازعان خودش قسم خورده اینم لغوه اینم گناهی نداره بالاخره این تعریف لغب شد که انسان بدون اختیار قسم به زبانش بیاد یا که به چیزی قسم میخورد که فکر میکند این اتفاق به همین صورت افتاده در حالی که اتفاق برعکس اون است ولی خود آقا خبر ندارد بر این قسم هیچ نه هست نه هست اینجا فرموده لا یؤاخذکم الله بالغو فی ایمانکوم خدامتش شما را مؤاخذه نمی فرماید بلغو در قسم های شما قسم لغو در قسم های شما باشد خدا شما را معاقضه نمی فرماید ولیکن یعاخذکن بما عقدتم الايمان. اما خدا من شما را معاقضه می فرماید به اون چیزی که بالاخره شما قسمتون را آن بستید در برای آینده ببینید دومین دو قسم قسم منعقده هست قسم منعقده این هست که شما کسی سوگند بخورد به انجام دادن چیزی در آینده یا انجام ندادن چیزی. بعدا قسم خودش را میشکند. سوگند خورده که انجام نمیده بعدا انجام داد. پس وقتی که این سوگند را شکست، این مرتکب کفاره شد، کفاره بدهد. مثلا سوگند خورده به بازار نمی رود رفت. لذا کفاره بدهد کفاره را هم قرآن بیان فرموده این دونو قسم است که در این دو قسم اختلافی وجود ندارد. نوع سوم قسم این هست که بهش میگن قسم قومموز این است که انسان برای آینده چیزی قسم نمیخورد قسم به گذشته می خورد. اما به دروغ قسم میخورد مثلا فلان کار را انجام داده قسم میخورد من انجام ندادم و خودش میدوند داره به دروغ قسم میخورد این قسم غموز کسی بخورد یعنی اسم خدای از و را به بعد تمسخور گرفته این گناه بسیار بزرگی از گناه کبیره هست و این انسان رستگار نمیشه کسی که به دروغ قسم می خورد. قسم او را از پای در می آورد او را از بین می برد مگر اینکه انسان توبه بکند رجوع بکند به خدا و بر از کنم این قسم دروغینش از خدا معذرت خواهی بکند اما آیا کفاره هست از نظر امام ابو وانیفه کفاره نیست این همین گناهش خیلی سنگینه این قابل جبران نیست اما بعضی دیگر از فقهاء ایمه مثل امام شافی رحمه الله امام مالک می کفاره دارد، کفاره دارد. کفار اما یکی از مفسران معاصر مولانا خالد سیف الله که از مفتیان بزرگ هندوستان هست ایشون تفسیری نوشته ایشون نوشته برای جبرانش نظر بنده این هست که هم توبه بکند به دروغ قسم خورده توبه بکند از خداوند از زوجل معذرت خواهی بکند و هم کفاره بدهد احتیاطا چکار بکند کفاره بده همونطور که یعنی امام شافیه می فرماید احتیاطا کفاره بده تا خدای تعالی او را ببخشد از سر تقصیر او در درگذار بشه اما اگر بر گزشته قسمی خورده بود که در این قسم حق کسی را تلف کرده اون دیگه بخشیده نمیشه تا زمانی که اون حق را بر نگرداند یعنی قسم میخورد که این ماشین را من ما خودم خریدم چون طرف شاهد ندارد این زمین را من خودم خریدم به دروغ قسم میخورد بعد به بخ... دلش خوش میشه که خب من الان کفاره میدم نه با کفاره این حل نمیشه هم توبه هم کفاره هم برگرداندن اون زمین همه را جام بدید تا خدا تعالی ببر لذا الله تعالی می فرمد لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما عقدتم الائیمان خدا من شما را معاخذیم که بیانچی که شما بستید قسمتون رب آینده برای مأخذ میشید وقتی که قسم خوردید فكافارات هو اطعم و عشرة مساكین کفارش خوردن دهم سکین من اوست ما تطعمون اهلی او یا کسوتهم او تحریر رکبه از متوسط آن چیزی که شما غذا میدید اهل عیالتون را ببین دهم سکین را طعام دادن کفاره قسمی کفاره اختیاری هست از این ستا یکی را اختیار کن ده مسکین را طعام دادن اما چه طعام دادنی طعام دادن متوسط طعام دادنی متوسط طعام متوسطی که خودت می خوری یک آدم فقیر هست هر روز غذاش غذای متوسطش حبوبات از لوبیا می او به ده تا شام و نهار این غذا را بده یک آدمی هست که خدا بهش داده و به ده مسکین می هر روز گوشت بده پس او اون تعام را بده چون که تعام متوسط خودش اینه من عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون احلیکم از مال متوسطی که شما اهل خودتون را تعام میدهید ببینید بعضی گفتند بعضی از فقهاء از علماء این تعام را گفتند که اگر تعام نداد این را میتونه تبدیل به فطریه بکنه به صدقه فطر بکنه یعنی ده تا فطری بده ولی متاسفانه محاسبه ای که امروز ما برای صدقه فطر میکنیم برای یک فطر در مقابل یک طعام اون یک فطری که میده یک وعده غذا نمیشه چی برسه به دو وعده غذا مثلا فطری بالاترین رغمی که امسال شاید اعلام بشه فطری اگر از از خرما حساب بشه از کشمش حساب بشه خب یه چیزی هست صد تومنی میرسه بالاتر میرسه اما اگر از گندم حساب بشه اون وقت 20 تومن هم نمیشه برای ده روز برای ده مسکین از کنم ده تا بیس تومن بده میشه دویست هزار تومن این دویست هزار تومن بیس وعده غذا میشه چون ده روز هر روز شام و نهار میشه یک روز هم نمیشه لذا اینجا وقتی که میخواد فطریه بده گزین فطریه میکنه از فطریه حد معمول یک مقدار بیشتر بده یک مقدار بیشتر که حد دقل شام و نهاری براش بشه پیش ما بعضی همی آیند میگه ما به ده مسکین غذا نمیتونیم بدیم پول میخوایم بدیم ما الان فکر میکنیم که این فطریه اگر بخواد شام و نهار بده این بیستومنه بده این شام و نهار نه تنها نهار هم نمیشه لذا ما میگیم بلاخره هر مسکینی را پنجا شستومنی تومان بده که هم بتونه حداقل همون غذای پایینی برای خودش هم شام بگیره هم نهار بگیره لذا وقتی که تبدیل به فطریه میکنیم باید قیمت فطریه از اون فطریهای باشه که بتونه چی بکنه غذای براش تهیه بکنه او هم یا لباس ده تا مسکین لباس ده تا مسکین الان واقعا امروز افراد هست و تفریت از در قیمت ها در گذشته یک دست لباس با یک روز غذا برابر بوده اما امروز یک روز غذا با یک دست لباس اصلا برابر نیست او تحریر و رقبه یا آزاد کردن گردنی پس این سی صورت هستن فمن لم یجد فسیام و سلاست ایام کسی که نیافت روزه بگیره سی روز پس روزه سی روز برای کسی که ندارد بسیاری از مردم هستن وزشون خوبه ماشین دارن منزل دارن درآمد دارن تا قسم را میشکنن میپرسند که چند روز باید روزه بگیریم نا خیر روزه برای شما نیست روزه برای کسانی هست که ندارند نمیتونن غذا بدن، نمیتونن لباس بدن. شما برو برای ده تا فقیر ده دست لباس بگیر لذا فمن لم یجید هر کسی که نیافت نداشت فصیام و ایام روزه روز هست که این روزه سیروز امام ابو انفر رحمه اللہ میفرمه پی باشد ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفت. این کفاره کفاره سوگند شماست وقتی که شما سوگند خوردید اما است وحفظو ایمانکم از ابتدا و از آغاز قسمتون را حفظ کنید قسمتون را حفظ کنید یعنی چه؟ این دو معنا داره یکی اینکه حفظ قسم اینکه اصلا قسم نخور تا قسمت نشکنه اصلا سوگند یاد نکن چه نیازی است؟ هر چیزی والله بالله قسم حفظ قسمت اینه که قسم نخور تا اینکه به لخت فردا حانس بشی و دومین دو که قسم اگر میخوری بر اون قسم ثابت بمان قسم رو نشکن البته تا زمانی که اون قسم بر گناه نیست مثلا وقتی میگی فلان محل نمیرم فلان روستا نمیرم فلان شهر نمیرم اسم خدا را میبری دیگه نرو حفظ قسم همینه که اون قسم را نشکن تا مرتکفار نید بر تو البته اگر یه چیز نمشروی بود بشکن مثلا قسم میخوره من با برادرم حرف نمیزنم خب اینجا دیگه بر قسم را نباید حفظ کنه اینجا قسم را بشکنه بهتره چون که قطع رحم لازم میاد از حرف زدن و صحبت نکردن و مشکلاتش بیشتر هست پس وحفظو اینه که یعنی که هیچ قسم نخورید فبرو فیها ولا تحنسو اذا لم يكون الحنس خیرا او لا تحلفو اصلا اصلا قسم نخور صورت اولینه که شما کنی حانس نشید وقتی که حانس سدن خیری ندارد و صورت دومینه که اصلا قسم یاد نکن شیخ رحمه الله من دومینه ترجیم ده وحفظو ایمانکم یعنی قسمت را حفظ کن اصلا قسم نخور قسم که نخوری قسم چیه حفظه كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون ان امتنان رب العالمين هست منت و لطف پروردگار است این گونه بیان می فرماید برای شما آیات را لعلكم تشکرون تا اینکه این حکمت تبیین تا اینکه شما بندگان شاکر و بندگان سپاسگزاری باشی یا يايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ در آیاتی گذشته مضمون شرک فعلی آغاز شد و اون اینه که چیزی که خدای عز و جل برای شما حلال قرار داده انها را برای خوشنودی غیر خدا شما حرام قرار ندهید و قسم دیگر از اقسام شرک فعلی نظر لغیر الله است برای خوشنودی و رضایت غیر خدا انسان صدقی بده گسفندی بکشد و چیزی را بدهد به خاطر رضای غیر خدا این هم حرام است اون اولی حلال بود این دومی حرام هست چون که این خدا تعالی حرام قرار داده این به خاطر غیر الله حلالش قرار میده مثل انصاب و ازلام که میخانیم الله تعالی در این آیه همین مطالب را می فرماید اما قبل از انصاب و ازلام خمر و میسر هم هستند شراب و قمار هم هستند الله تعالی می فرماید ای مؤمنان جز این نیست که شراب و قمار و انصاب انصاب از کنم جمع نصوب هست نصوب می گویند هر نمادی که نسب شده باشد قائم شده باشد برای تعظیم غیر الله هر نمادی که اون نماد برای تعظیم غیر الله چی بیشه نصب شده باشه مثلا برای تعظیم غیر الله ایک علامتی از اون پرچمی ارز کنم که سلیبی یا سنگی که اون سنگ محل نشستنی او باشه مثل اون سنگی که مشرکین مکه اون سنگ را پرستش میکردند چون لات اون کسی که همیشه ستوها را و شربت درست می کرد برای حاجی ها روی اون مینشست. لیزا این را نماد او قرار داده بودن و او را سجده میکردند. یک جایی که یکی از افراد یکی از انسان های بزرگ قدم گذاشته قدمگاه او را مردم تعظیم بکنند سجده بکنند اینا تمام جز نصوب حساب میشن هر چیزی که منسوب به او باشد و در اون عظمت تعظیم اما تعظیمی که منجر به عبادت بشه لذا انصاب به اینو نمادها گفته میشه والازلام ازلام را قبلا خواندیم انصاب را هم قبلا خواندیم که ازلام اون تیرها را میگویند که با اون تیرها و قرآن اونها تقسیم می کردند و در این تقسیم دو چیز را اعتقاد داشتند عرض کردم مثلا یک شتری را با هم می خریدند ده نفر برابر پول میدادند، اما در تقسیم برابر نمی کردند مال یکی مثلا یک سوم بود، مال یکی یک چارم بود، مال یکی یک دهم بود چند قسمت تقسیمش می کردند. به یکی زیاد می رسید به یکی کم می رسید لذا اون که ازلامی که اونجا وجود داشت اون ازلام را به عنوان قرآن می انداختن قرآنی هرچی که در می آمد معتقد بود که خیر من در همین هست این را این معبود برای من مناسب دانسته برای بعضی ها مثلا پولی که داده بود دو برابر اون پول بهش گوشت می رسید بعضی ها نصف اون هم بهش گوشت نمی رسید این هم نوع قمار بود و هم نوعی حرام بود بخاطر این که بلاخره اونها اعتقاد داشتند چون این محبود این را تقسیم کرده این آستانه این را تقسیم کرده نسبت به او معتقد بودن که چون علم غیب دارد او می خیر و شر ما را در تقسیم او برای ما قطعا خیر هست و سهم خودشون را بر می داشت نهر اندازه بودند لذا این را میگند که تقسیم با ازلام الله عزوجل همه اینها را میفرماید. هر چارتاشون رجس من عمل شیطان اینها رجس هستند گند هستند و نجس هستند و از اعمال شیطانی هستن فجتنبوه لعلکم تفلحون شما از اینها اجتناب کنید از اینها دوری کنید تا رستگار بشید این داشته باشید که در رابطه با شراب این سومین ثومین ای هست که نازل شد قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که تحریم شراب تدریج نازل شد اول فقط چی نازل شد چی دستوری صادر شد اول از همون که اللہ تعالی فرمود که هم منافع هست و هم گناه هست اما اسمهما اکبر من نفعهما خیلی از اونجا متوجه شدند دومین حکمی که صادر شد و نازل شد این بود که نزدیک نماز در حالت سکر و نشگی و شراب نروید لذا در این حالت ممنوع قرار گرفت سومین تا یک حدی که قباحت و شناعت در دلها آمد اللہ عزوجل این آیه را نازل فرمود و این دستور را دادن این دستور دیگه دستور قاطع بود با قاطعیت الله تعالی فرمود که شراب و قمار و انصاب و ازلام رجسون اینها گند هستن نجس هستند و عمل شیطان هستن فجتنبوه لعلكم تفلحون اگر می خواهید رستگار بشید اگر می کامیاب بشید شما از این اجتناب کنید حال ببینید که شراب چند تا شناعت داره چند تا قباحت داره اولا اینکه الله عزواجل اینها را رجز فرموده رجز به معنی نجس هست به معنی ناپاک هست نه تنها شراب حرام هست بلکه شراب ناپاک هم هست یعنی اگر بر لباس انسان بیفته بر بدن انسان بریزه لباس ناپاک میشه بدن ناپاک میشه باید شسته بشه عین مثل این است که بلا نسبت لباس آلوده بشه با ادرار لباس آلوده بشه با یک نجاست دیگر خون نباید شسته بشه لذا شراب مثل از نظر نجاست مثل خون و ادرار است که این میخار و شراب خار و رمی خورد. این نجس است و هم نجس است و هم حرام است. خیلی چیزها هستند که حرام هستند ولی نجس نیستند، ناپاک نیستند. مثلا مال غیر انسان مال غیر را بخورد به بدنش بخورد بدنه ناپاک نمیشه. اما چون مال غیر از حرام است. اما شراب اون چیزی هست که هم نجس هست و هم حرام هست و دومین چیزی که در شراب هست اینه که اللہ تعالی حرام قرار داده یکی اینکه ناپاک هست رکس هست و دوم انکه حرام هست فجتن نبو ہو. اجتناب کنید دوری کنید از شراب لذا مسلمانی که اعتقاد خدا دارد و خدا را باور دارد و به خدا ایمان دارد ایمانش می که از شراب دور بشه و السفومی چیزی که الله تعالی فرموده اینما یرید الشیطان این یوقع بينكم العداوت والبغضاء في الخمر والمحصر یعنی شراب موجب بغض و عداوت می شه شراب موجب درگیری می شه موجب دشمنی می شه شراب را کسی که بخورت به حال خودش نیست او بلا نسبت خاهر و مادر نمی شناست حلال و حرام نمی شناست جایز و ناجائز نمی شناست دوست و دشمن نمی شناست هر چی که جلوش بیاد هر چی که به زبانش بیاد صادر می کند لذا وقتی که چیزی که انسان را اینقدر از تعادل خارج میکنه چرا انسان مسلمان را مصرف میکند و بعد الله عز می که اگر می‌خواهید رستگار بشید یعنی موجب رستگاری اجتناب و دوری هست جای تأسف است که مسلمانان امروز بعد از این همه سال که مسلمان از شراب دوری کرد مسلمان شراب را بدترین چیز می دوباره بعضی به شراب رجوع کردم بعضی دوباره شروع کردم به میخاری 1400 و, و سال پیش وقتی که حرمتش اعلام شد مسلمانان راستین مسلمانان واقعی مسلمانان صدر چنان شرابها را ریختند که جوهای مدین پر شراب شد ظرفهای شراب را دور انداختند و کسانی که حتی از حرمت مطلع شدن اون زمان شراب مثل امروز نبود شراب مثل چای نوشیدن بود یعنی چنان راحت بود و در ار مجلسی بود شراب را بعضی ها گرفته بودن تا میل کنند نزدیک دهان بیارن وقتی که حرمت را شنیدن فورا از اونجا به بعد دست کشیدن هیچ کس نگفت خب این بار آخریمون است برای بله آخرین بار بلاخره بالا بکشیم ولی معلوم نیست که مسلمان امروز یا اعتقاد نداره یا این حرمت بیش نرسیده حرمت شراب بیش نرسیده که راحت شراب میارند از این راہ دریایی شراب وارد میشه یک جمعی با کشتی و با لنچ میارند یک جمعی اینجا حمل میکنند حمالی میکنه یک جمعی میخرند یه جمعی میفروشند، یه جمعی دیگه باز میخرند همه اینها رسول الله صلی الله علیه و آله 10 گروه را لعنت کردند کسی که شراب را درست میکند کسی که شراب را عرض کنم که با کرایه می کسی که شراب را حتی حمالی حم میکند کسی که شراب را خریداری میکند کسی که شراب را می فروشد، کسی که شراب را می خورد، تمامی کسانی که بنوی هم کاری دارند، که ده نفر در حدیث ذکر شده، همه اینها ملوون است، همه اینها مورد لعنت خدای از زوجال است. یعنی این چیز این قدر قبایه دارد از نظر الله از زوجال و این قدر مزمم است که این همه افراد به خاطر این لعنت شده، پس ما بدونیم که چقدر. قبیه است چقدر بد است چقدر حرمتش غلیظه است الله تعالی می فرماید انما يريد الشيطان جزء نیست که شیطان می خواهد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر بین شما عداوت ایجاد کند بغض ایجاد کند بغض و عداوت و دشمنی در چی است در شراب و در قمار کسانی که قمار میکنند یک بار مالشون را میبازند چقدر برایشون سخت میشه خیلی افراد درگیر میشه میذارن به سر کلی هم دیگر شراب هم همچنین و دیگه مزرات تا زرر را ارز کردم دیگه مزرات شراب چهارمی و یسدکم عن ذکر الله شما را از ذکر خدا و یاد خدا باز میدارد در شراب این خاصیت هست که انسان وقتی که این حرام را مرتکب میشه، اون از یاد خدا بدور میشه، فاصله میگیرد و پنجم و عنی از نماز شما را باز میدارد نمیگذارد نماز بخانی، نمیگذارد به مسجد بری کسی که ناپاک است کسی که بدنش حتی پاک نیست، چگونه به نماز میرود و از اینجا برداشت میشه که کسانی که شراب میخورند، توفیق نماز و توفیق عبادت هم از انها سلب میشه خدای عز و چنین انسان های ناپاک و نجسی را توفیق نده که بی آیند عبادت خدا بکنن بی وارد مسجد خدا بشن بی خدا را سجده بکنن توفیق از سلب میشه الله اللہ می و عن صلاة از نماز شما را باز میدارد فهل انتم منتهون آیا شما باز نمی آید باز هم آیا باز می آید یا نمی آید خدا داره از مسلمان می مسلمان با جوابت را آماده کنی بعض می یا هنوز بی ادامه بدی هنوز بی که راه حرمت را و راه کفار را ادامه بدی لذا الله عز وجل جل می اگر می خواهید که موفق بشید اگر می کامیاب بشید بعد از این خداوند اصول فوز را بیان میفرماد و اطیع الله و اطیع الرسول و ستا از اصول فوز بیان شده یک خدا را اطاعت کنید رسول الله صلی الله علیه و وسلم وقتی که بیان فرمودن اون چیزی را که خدا حرام قرار داده و مورد لعنت قرار می گره مورد لعنت یعنی دوری از رحمت خدا لذا اگر میخواد رحمت خدا شامل حالتون بشه خدا را اطاعت کنید و دوم اطیع الرسول رسول صلی الله علیه و سلم را اطاعت کنید سوم وحذروا یعنی از مخالفت احکام بر حذر باشید از مخالفت دستورات خدا بر حذر باشید لذا این آخرین آیه هست آخرین اتمام حجت است درباره حرمت شراب الله می فرماید فانت ولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبين اگر بعد از این پشت دادید ایراد کردید فعلموا دیگه بدونید که بیشتر از این پیغمبر ما کاری کند پیغمبر ما وظیفه اش را انجام داد جزء نیست که بر رسول ما البلاغ المبین یعنی پیام آشکار هست رساندن پر پیام پروردگار به صورت آشکارا و شفاف واضح هست بعد از اون با خودتون اختیار مال خودتون که فرمان خدا را بجام میارید فرمان رسول الله را بجام میارید یا نافرمانی میکنید اگر نافرمانی میکنید هم تکلیفتون مشخصه ليس على آمنو و عمل الصالحات این جواب سؤال مقدری هست شراب وقتی که این قدر قبیه هست این قدر زشت است، این قدر حرام هست که حرمتش انسان تعجب میکنه با چه غلظتی و با چه شدتی بیان شده خب تکلیف اونهایی که قبل از حرمت شراب مصرف کردن چی میشه همین صحابهی ای که این صحابه ای که حیات دارن خب اینها ایک عمریست مصرف کردند خیلی از افراد بودند که در جنگ احد شهید شدند خیلی حتی در بارش میاد که شراب مصرف کردند و به میدان آمدند بعدن شهید شدند تکلیف اونها چی میشه به حرمت بعد از قبل از اون الله تعالی میفرما بر اونها هیچ نیست لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنائ فی ما طعموا بر انهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بر آنها گناهی نیست فیما طعیمو در آن چیزی که خوردند مصرف کردند به شرطی که ازا متقو و آمنو و الصالحات در اون زمان اتقو ای عن عنی شرک از شرک دوری داشتند اینجا اتقاس شراب نیست اتقو عن شرک و ایمان داشتن به خدای از و و عمل صالح انجام دادند بر اونها گناهی نیست ثمت تقو و آمنو سپس بر تقوی استقامت کردند و آمنو بر ایمان هم استقامت کردند ثمت تقو و احسن و سپس باندازه بر تقوی استقامت کردند و احسن و به درجه احسان و اخلاص رسیدند این یک تفسیره یعنی هر ستا اتقو در بارے کسانی هست که فوت کردند رفتند چنانچه تفسیر قرطبی همین نوشته که الاتقاع الاول قال محمد ابن جریر بنقل از علامہ ابن جریر نوشته که اتقا الاول هو الاتقاع بتلقی امر الله بالقبول والتصدیق و الدینونه به اتقا اول در ایمان است ایمان است یعنی پرهیز کردن از کفر پرهیز کردن از شرک پس اتقا اول چیه؟ به تلقی امر الله دستور خدا را دریافت کردن بالقبول و تصدیق هرچی خدا گفته قبول کردن و تصدیق کردن و دینونت به و متدین شدن به همون دستورات خدا والعمل عمل کردن والاتقاء الثاني بالصبات على التصديق بر اون تصدیقی که داشتن بر اون استقامت کردن والثالث ثم التقو احسن و الاتقاء الثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل يعني ان اتقار باندازه ادامه دادند کہ خودشون رب خدا نزدیک کردن از بندگان مخلص خدا شدن منظور اینه که کسانی که در گذشته شراب مصرف کردند، به شرطی که تقوایشون والا بوده استقامت بر ایمان و تقوی داشتن و به اندازه به وسیله اعمال و نوافل به خدا نزدیک شدن که چی؟ قرب خدا را حاصل کردند. اونها هرچی شراب خوردن اشکالی ندارد اما بعضی دیگر از مفسران میگویند اذا مت و امنوا و صالحات الصالحات درباره گذشتگان است ثم تقوا و امنوا ثم و احسنوا درباره کسانی که زنده هستند حیات دارند یعنی اینا دو گروه هستند اینها دو گروه اینجا خدا بیان فرموده گروه اول اونهایی که خوردند شراب و فوت کردند برای اونها گناهی نیست در صورتی که اون زمان شرک نکرده اذا مت وقتی که اتقا وانی شرک و آمن و ایمان به خدا داشتن و عمل صالح انجام دادن برای اونها نیست اما شما مخاطبین شما هم تا دیروز می خوردید شما هایی که الان این سوالات را می پرسید از صحابه شما هم در گذاشته این در رابطه با مخاطبین است موجودین است سمت اتقا و آمنو یعنی این اتقای دوم برای اینها هست کسانی که از شرک دوری کنند و ایمان بیاورند و بعد به این فقط بسنده نکنند. ثم التقو و احسن و و ایمان و عمل سالشون به حد احسان برسد. به حد احسان یعنی قرب خاص خدا تعالی. ان عبدالله الله انک ترا حد احسان اینه که خدا عزوجل رابطه باندازه باشه که تو خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. والله یحب المحسنين خداوند چینین مخلصینی را دوست دارد لذا این برای این افراد چه افرادی که بر اساس تفسیر دوم چه افرادی که از صحابه فوت کرده بودند چه افرادی که زنده بودند خدا تعالی همه را می‌فرماید که همه اینها چون که از شرک دوری کردند ایمان داشتند چیون هایی که فوت کردن، چین هایی که زنده هستن حیات در در گذشته هرچی میل کردن برای اونها اشکالی ندارد. از این به بعد نکنند. لا از این آیه معلوم میشه که گاهی الله عز وجل برای انسانها امتحان انسانها و ابتلاع انسانها اسباب گناه را خوب فراهم می کند یعنی انسان میخواد گناه نکند اما اسباب گناه چنان فراهم میشه که انسان گاهی می بین همه چیز آماده هست چرا مرتکب نشم گاهی اینطور از خدای تعالی بندگان خودش را امتحان میکند اسباب فراهم است اسباب نافرمانی اسباب گناه اسباب معصیت این ابتلا هست وقتی که به مسائلی مبتلا شدیم ببینیم که گناه نکنیم به عنوان مثال دو تا مثال که این آیه به اونها اشاره داره یکی جریان بنی اسرائیل گفته شد که روز شنبه شکار نکنید روزی که شنبه نبود خیلی ماهی فراوان بود اما روز شنبه اصلا ماهی وجود نداشت شرعا و یوم لا یثبتون لا تاتيهم در روز شنبه شرع بود یعنی سر آب اینقدر ماهی بود که با دست میگرفتی اما يوم الا بتون روزی که شنبه نبود لا, شنب نبو لا تاتیم هیچ مایی نمی آمد خب خدای تعالی به این صورت امتحان می کند و جریانی که اینجا اشاره شده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان حدیبیه سال ششم هجری که خواستم برای عمره برند در اون سال صحابی میگوید که من نیزهها به دستمون بود و تیر و کمان به دستمون بود شکار نزدی که ما میامد. به اندازه ای که اگر می نی میزدیم همونجا افتاد ولی چونکه جز ممنوعات احرام است اون زمان مردم چیزی برای خوردن نداشتن امروز کسانی اگرش به شکار می روند این از بس که شکمیشون سیره اون زمان مردم شکار میکرده از بس که گروس نبودند لذا شکار اون زمان با این زمان خیلی فرق میکنه کسی شکار میکرد برای چند روز بلاخره خدای تعالی غذاش را فراهم میکرده از اون طریق لذا گروس نبودند چیزی نبود ولی چون احرامه و جز ممنوعات احرام بود که شکار نشه شکار میگه نزدیک مامی آمد راحت میگشت این امتحان الهی است خیلی از انسان ها امروز هم هستند که نیاز دارن به مسائل مالی نیاز دارن به مال و اقتصاد از طریق هر حلال هر چی میکنم به جای نمیرسن میگه اگر از راه نادرستی را ببریم زود بگیرم امیت این امتحان الهی هست که برای انسان مسائلی را ممنوع قرار داده گناه قرار داده و بعض اسبابش هم فراهمه یعنی صورتهای حلال صورتهای جایز، صورتهای درست راهش بسته است، صورت حرام الله راهش. خیلی آمین میگم ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم نه از نظر تجارت نه از نظر مسکن نه بعضی جوان میگن ازدواج ممکن نیست تا اینکه ما از این قرضهای سودی و ربوی نگیریم خویم امتحان است بغیر راه را خدا بسته انسان شکار بو کو که کہ راه بسته باید مرتکب حرام بشه نه کن تا خداوند فرجی بیاره لذا در این آیه خداوند همین را می‌فرماید یا ایها آمنو ای مؤمنان لیبلونکم الله بشین حتما حتما خداوند شما را امتحان میکنه با چیزی از شکار به اندازه از این شکار که تا ایدیکم ایدی کوم ورماحکم دست شما حتی بهش می رسید نیزه شما بهش می رسید اما خدا تعالی این را چرا شما را امتحان می کند الله من مَنْ بالغيب تا خداوند آشکار کند علم الٰهی قبلا به من زور است آشکار کند واضح کند و نشان بده خدا که من يَخَافُهُ بالغيب چه کسی از خداوند می ترسد و ایمام بالغیب دارد و می ترسد واقعا راه وقتی که مشروع مسدود هست راه جایز راهش بسته هست راه ناجائز ما الله فراوانه هر کسی بخواهد می تونه به مقصدش برسه این امتحان است در این صورت بندگان مؤمن و بندگان متعهد از غیر متعهد مشخص می شوند علم الله من يخافه بالغيب خدای تعالی میخط بدونت و میخط مشخص کند که چه کسی از خدا میترسد ندیده میترسد و ذا الله تعالی وعید بیان می میفرما فمن اعتدى بعد ذلك بعد از این هر کسی تعدی بکند تجاوز بکند یعنی مرتکب حرام میشه مرتکب گناه میشه بگه نمیشه آخر بعضی هستند عجیب چه فتوای با چه جرأتی ما مستر هستیم مستر اون کسیه که گوشت حرام وقتی که جلویش هست میته جلویش هست اگر لقمه‌ای نخورد میمیرد لذا بعضی از افراد از نظر مالی ضعیف هند این طور که از گروسدگی بمیرند تجارتشون رونق نداره یا از نظر مسکن مشکل دارند میگه ما مزدر هستیم نخیر خیلی افراد هستن تو همین شهر تا روزی که زنده هستند خونه ندارن اینجار نشینی مردم هستند مگه ای استرار هست کسی خونه داشتنه نباشد لذا الله عز و میفرم هر کسی تعدی کند بعد از این فله عذاب آلیم برای اود عذاب دردناک است. يا ايوا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ان جاء الله عزوجل اعذاب میفرماید تحرمات الهی را چیزهایی که حرام هستن خدا حرام قرار داده من جمله اونها همین مسئله سید اونجا خداوند فرمود که من شما را امتحان میکنم حال حکم من چیه دستوری من چیه یا ایو الذین آمنو، ای مؤمنان لا تقتلوا الصیدا. شما شکار را نکوشید سید را نکشید و انتم حرم در حالی که شما در حالت احرام هستید در حالت احرام برای شما جائز نیست اگر کار را کردی باید جریمه بشید وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْدًا هر کسی اون شکار را عمدن بکشد ببینی علاوه از اینکه اون شکار حلال نیست نه خودش میتونه بخوره نه کسی دیگه میتونه بخوره کسی که در حالت احرام زده شکار را اون شکار حرام میشه اما فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ جزا بر اون جزاست فَجَزَاءٌ یعنی فَعَلَيْهِ جزا� جرمه هست. جرمش چیه مثل ما قتل من النعم مثل اون چیزی که کشته از چارپایان. یحکم بهی زواعد منکم. فیصله بکنه دو نفر عادل از شما. باید از اون مثل آن از چارپایان بکشد. یعنی از بقیه حیوانات باید بکشد. حج بالغ الكعبة یعنی به صورت حج قربانی که به کعبه منظور از کعبه حرم است به حرم برسد او کفاره طعام مساکین یا کفاره طعام مساکین به همون اندازه که قیمتش باشد او عدل ذلك صیاماً یا برابر اون روزه لیذوق وبال امرتای که این انسان و بال کارشرا و جزای کارش را بچشد یه بینید توجه بفرمایید کسی که شکاری را شکار کرده اون شکار یا آهوی هست یا خرگوشی هست یا نمیدونم حمار وحش هست گور خر هست یا گاف وحشی هست خلاصه می فرمایید که مثل ما قتل من النعم از چار پایان مثل اون که کشته مراد از مثل چی آیا مثل سوریه یا مثل معنویه مثل سوریه اینه که به اندازه او از چهار پایان مثلا مشخصه اندازه آهو چیه؟ گوسفند اندازه اون گوراخر و گاو وحشی چیه؟ گاو و شتره اما بسیاری از فقها همین را اما خیلی است که مثل ندارن مثل مثلا اگر خرگوشی زده پرنده ای زده از چارپایان نمیشه مثلش اون وقت میگم به قیمت مراجعه کنه امام ابو انی فرحمه الله معتقد است که مراد از مثل مثل سوری نیست مثل معنوی است یعنی از همون ابتدا قیمت بشه معادل این قیمتش چارپایان خریداری بشه امروز انسان میبینید که این اونچه که امام ابو حنیفه رحمه الله می فرماید او امروز تحقق دارد اون امروز ثابت میشه چطور مثلا کسی آهوی بکشد از نظر قیمت آهو با یک گوسفند برابر نیست آیش آهو شاید قیمتش 20 میلیون باشد 30 میلیون باشد ولی یک گوسفند قیمتش چی هست بالاخره دو میلیون بیشتر نیست دومن دو دلیل ما بانیف این که یحکم به زواعدل منکم یعنی اون مثل را دو نفر عادل از شما داوری بکند دا خب دو نفر عادل دو نفر معلوم میشه دو نفر آدم فهمیده عادل فهیم خب این دو نفر در صورتی هست که چکار بکنیم اون شکار را ما قیمت بکنیم اونا بیان بگند که اقا قیمت این این مقدار است ویلی اگر مقایسه باچی بشه بیشه با چار خب خوب دو نفر عادل نه هر کمی میدونید که برابری این یه گوسفند است بنابراین ایشو معتقد است که وقتی که مثل معنوی مراد باشه لازم نیست بازی جا مثل سوری باشه بازی جا مثل معنوی مثلا در آهو گوش بگی مثل سوری است در خرگوش بگی مثل معنوی است نه مثل کتاب میشه در همه جا یک مثل یعنی در همه جا قیمت ہے. خب امکان داره که قیمت این به اندازه یک نعم برسه یک چارپا برسه قیمت این به اندازه دهتا تا برسه مثلا یک چیزی کوچک را می به اندازه گسفند شاید قیمتش بره ولی یک چیزی بزرگ را شاید ده تا گسفند بشه یا چند تا شطر بشه بنابراین اون قیمت را بیا بیایند و تعییم بکنن فجزاؤن پس فعلیه جزاؤن پس بر او هست جزای مثل ما قتله مثل آنچه که کشته یعنی مثل معنی قیمت آنچه که کشته اما که خود قیمت را بلکه این قیمت را تبدیل به چی بکنه؟ به گوسفند بکنه به گاو بکنه به شدر من النعم مثل آن از چار پایان به زوا عدل خب اون قیمت را کی تایی می کند؟ چی کسی داوری می کند؟ دو نفر عادل دو نفر کسانی که درک میکنند کنند می شناسند. حدیم بالغ الكعبه اون مثل را بایدن به عنوان برسان برسد به کعبه او کفارت و طعام و مساکین یا یعنی اینکه اون را قیمت را چیکار بکنند؟ تبدیل به کفاره طعام مساکین بکنند چند تا طعام چند تا مسکین میشه به همون اندازه اون قیمت را تبدیل به طعام مساکین بکنند او عدل ذلك صیاما یا برابر اینچی روزه یعنی به اندازه هر طعامی مثلا اون ده تا فطریه میشه ده تا روزه 100 تا فطری میشه 100 تا روزه هر اندازه که میشه اگر ندارت روزه بگیر لیذو قوال امره ان التک کفاره هست چرا این انسان به این کفاره را باید بده تا بچشد جزای کارش را که دوباره انکار نکند در حالت احرام که این حرام را الله تعین کرده حرمت را در حالت احرام دوباره شکار نکند اف الله عما سلف اما اونچه که گذاشته انسانها نمی دونستند معاف کردی الله. اما ومن عادا فیم تقیم الله من هر کسی دوباره اعاده بکند، دوباره دس به جنایت بزند، مرتکب این نوع اشتباهات بشه، فیم تقیم الله من خداوند از اونها انتقام می گیرد یعنی خدا عذاب میده تنها بحث کفاره نیست تنها بحث جریمه نیست این حرمت این لباس احرام حرمت حرم حرمت حالت احرام اینها را کسی که زیر پا بگذارد این گناهکار میشه والله عزیز ذو انتقام خداوند جل هم غالب هست و هم داره انتقام است می انتقام را از شما بگیرد احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة خب درباب الشكار الله تعالى من فرمات الشكار خشكي حرامي شكار الدريائي ماهي وغيره انها حلال هستند اشكالي نظارا اللهم فرمات احل لكم صيد البحر حلال اسبرائي شما شكار الدرياء وطعام الدريائي متاعا لكم وللسيارة هم مطاع استفاده شماست یعنی برای غذا و استفاده شماها که محرم هستید ولی سیاره برای بقیه مسافران هر مسافری که باشد برای او هم حرام است اما وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما تا مادامی که شما در حالت احرام باشید صید البر و شکار خشکی برای شما حرام است واتقو الله این نسخه عمل است اگر تقوا باشد عمل کردن به احکام خدا آسان است و تقی الله الذی الیه تحشرون اینم نسخه تقوا است بترسید از اون خدایی که به او حشر میشید فردا همه شما جمع میشید یعنی اگر نافر اشاره به تخویف اخروی هست اگر نافرمانی بکنید اون خدا را اون خدا شما را می کند جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس و الحرام و الهدیع و القلائد ما در گزشته نظر لغیر الله را خاندیم اون که بر نصوب میشه اونی که وسیله ازلام گوشت تایم میشه اینجا نظر لله را میخانیم منظورات الله را میخانیم اونها حرام بودن اینها حلالند، اونها حرام بودن اونها چی اند حلال هستن اما قبل از این اللہ تعالیٰ می فرماید که خداوند کعبه را یعنی بیت حرام را قیاما للناس فرموده یعنی چه ببینید اصلش اینه که در هر زمانی اون چیزی که امنیت را برپا می کند و امنیت را حاکم می کند و آرامش را در میان مردم حاکم می کند چی چیز هستند حکومت ها هستند حکومت هست که به وسیله حکومت امنیت برپا میشه امنیت قائم میشه و سربازان حکومت اساکر حکومت ارتش حکومت جلوی رهزنها را میگیرند جلوی سارقها را میگیرند جلوی انسان هایی که تعدی کنند میگیرند جلوی ظالم ها غاصب ها بالاخره تنها چیزی که میتواند امنیت بیاورد چی یک حکومت است اما در بلاد حجاز در سرزمین حجاز در حرمین شریفین اونجا هیچ حکومتی نبود باوجودی که حکومتی نبود خدای اززوجل ح... امنیتی که اونجا حاکم کرده بود اون امنیت جای دیگه نبود حتی اگر انسانها قاتل پدرشون را می دیدند روخ خودشون را به سمت دیگه میکردند، به او تعرض نمی چرا به احترام حرم اونجا نه اینکه که انسان امنیت داشت حتی حیوانات امنیت دارند حیوانی که حیوان شکار هست در حدود حرم هیچ کسی اجازه ندارد او را چی بکند چی بکند و حیوانات به جای خود حتی درختان و ها هم امنیت دارند هیچ کسی اجازه ندارد کنارا اونا را دست بزند اونا قطع قط بکند اونا را بیرون بکند پس ببینید این امنیت بدون حکومت تشکیل شده به خاطر چی هست؟ به خاطر چند چیز هست یعنی جایگزین یک حکومت در جزیره العرب که اون زمان حکومتی نبود جایگزین اون اینجا الله عزوجل سه چیز را معرفی میکند یک الکعبه البيت الحرام دو الشهر الحرام سه والهدیه والقلائد یعنی اینها باعث شده که مردم تعرض نکنند یکی کعبه کعبه یعنی الکعبه مبدل من هواس البيت الحرام بدالش خداوند قرار داده کعبه را یعنی البيت الحرام را چی قرار داده قیاما للناس قرار داده باعث قیام مردم باعث قیام مردم که مردم بتوانه کارهایشون را انجام بدن بعضی حتی قیاما للناس را بعضی مترجمین ترجمه کردند باعث امنیت مردم یعنی کعبه خدا امنیت قرار داده این برکت دعای ابراهیم علیه صلی اللہ وسلم هست که ابراهیم علیه صلی اللہ دعا کرد و اجعل هازا بلدن آمینن لذا برکت اون دعا کعبر الله عزوجل چی قرار داده امنیت حتی بالخصوص بعد از اینکه که سپاه عبره خدا حلاکش کرد بعد از اون تمام مردم دنیا می ترسیدند که کسی اگر به کعبت روز بکنند خیری براش نیست حتی کاروانهایی که از مکه به جاهای می رفتند در مسیر دزدها و راهزنها دزدی می کردند این کاروانها وقتی که می آمده می گفتند از کجا آمده می گفتند از مکه دوزد می ترسید می گفتند برو میترسید که وقتی که اون ابره را با اون سپاه فیل خدای عزواجل اون طور نابود کرد من که کاروان اونو اون بزنم بعدا خدا با من چی میکند و حتی مردم جاهای دیگر وقتی به شام می رفتن به یمن می رفتن به عراق و مرسر می رفتن در این مسیر با دزدها مواجه می شدند مال حرم نبود مال مکه نبود ولی به خاطر اینکه که مأمون بمانند محفوظ بمانند وقتی که با 12 معجم میشدم میگفتم ما اهل مکه هستیم تا میگفتم ما اهل مکه هستیم اونها کار نداشتند لیلافه قریش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله عز و جل ببرکت این خانه کعبه ای که این وادی لا یزرعی بود ولی ببرکت این خانه کعبه ای و ببرکت این دعای ابراهیمی اطعمه من جوع انوای خورا کیها را اللہ اونجا جمعوری فرمود و چه امنیتی خدا تعالی اونجا حاکم کرد و هم من خوف لذا پس اولی چیزی که امنیت ایجاد کرد چی هست؟ خود خانه کعبه هست. که خانه کعبه را اللہ باعث امن مردم اونجا هم در خود اونجا و هم در اصفار تجاریشون قرار داد. لذا این اولین هست. الله می فرمات جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس قرار داد اللہ عز و جل یعنی بیت حرام را قیاما للناس قیاما للناس یعنی چه؟ یعنی هو ما يقوم به امر دینهم و دنیاهم باعث برپائی مردم که مردم دینشون هم به ببرکت کعبه برپاست امروز شما اینجا نماز میخونه نمازتون در صورتی درست میشه دین شما در صورتی درست میشه که رخ را به همون سمت بگردانی اگر به سمت دیگه گرداندی دین شما درست نیست یعنی نماز شما پس خدای عزواجل دین را هم به وسیله اون قائم کرد و دنیا را هم دنیا چی تو بسیاری از مفسری معتقدند که بقای دنیا بقای دنیا در احادیث هم هست بقای دنیا تا زمانی هست که کعبه هست بقای دنیا تا زمانی هست که مردمانی حول کعبه تواف میکنند هر وقتی که تواف ترک شد و رها شد یعنی عبادت خدا تمام شد و الله الله گویان تمام شدند بعد از اون منتظر قیامت باشید بس قیل لو ترکو یعنی اگر مردم ترک بکنن کیرا البيت الحرام، لم ينظر و لم ياخرو بعد از اون مهلت دهدين ده میشوند، مأخره میشه دیگه قیامت برپا میشه. پس به این معنا کعبه سبب چیه؟ قیام عالم هست. تمام دنیا هم دینمون که اول از کردم، هم دنیایمون برپا هست، برقرار است بخاطر این بیت شریف هست. بس الله می فرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قرار داد الله عز وجل کعبه من کعبه می چون بیت مکعبی هست یعنی بیت حرام را قیاما للناس اون را الله قرار داد باعث قیام مردم بر مردم که دین مردم هم بر پاس دنیای مردم و هم بر پاس و الحرام دومین چیز که امنیت را اونجا ایجاد کرده بود در اون بلاد ماه حرام بود چهار تا ماه بودن که ماه حرام رجب زیقاده زیحجه محرم در این ماه ها مردم به همدیگه تعرض نمی کردن دشمن دشمن را می کار نداشت جنگ ها تحتیل بود دوزدی ها تحتیل بود رهزنی ها تحتیل بود لذا این سبب چی شده بود؟ قیام مردم، و سبب هم قیام دینی و هم دنیاوی یا سبب امنیت مردم سووم والحد یا والقلائد همچینی حدیه این سوومین سبب ها از اسباب سگانی که عرض کردم این سبب چی شده بود؟ قیام شده بود هم دینی هم دنیاوی یا امنیت که مردم وقتی که گسفندی را قربانی می کردند شطوری را می بردند یک قلاده هم بگردنش می دیگه وقتی که اون قلاده بود یا یک نشانی دیگری مثل خون و مثل کوهان را پاره کردن و زخم کردن دیگه تمام کسانی که در مسیر بودن اونها متوجه می شدن که این مال خدا این مال حرم هست کسی جرات نمیکرد کرد بهش تعرض بکند الله تعالی می فرمید ذالک تعلم ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض این جميع ما ذکره خدای عز و جل همه انها را قیام برای مردم قرار داد چرا تا شما بدونید که الله می تمام آن چیزهایی چیز که در آسمانها و زمین هست و الله بكل شین علیم الله به هر چیز علیم است یعنی ببینی خدای عز و جل با توجه به علم والایی که دارد الله تعالی چطور بر نام ریزیمی فرماید برای مردم که بدون کوچکترین حکومتی این مردم چیکار میکنند، امنیت را و آرامش را برقرار دارند. اعلم ان الله شدید العقاب، اما انجام خداوند عزّ و جل بعد از اینکه ترغیب بیان فرمود برای کعبه، برای انجام امور و مراسم دینی. حال تریب بیان می فرمه البته این ترهیب همراه با ترغیب است کسانی که به دستورات خدا به فرامین خدا توجه نکنند برای انها عذاب سخت هست شدید العقاب هست و کسانی که فرمان خدا را به جامعی آورند انها مورد مغفرت و رحمت قرار می گیرند الله می فرماید اعلموا ان الله شدید العقاب بدانید همانا الله سخت عذاب دهنده است و ان الله غفور رحیم همانا الله بخشاینده و مهربان هس یعنی هم عذابش سخته، هم مهربانیش زیاده ما علی الرسول إلا البلاغ نیست بر پیامبریم. ما یعنی پیامبر زامن هدایت و ایمان شما نیست وظیفهشون فقط رساندن پیام الله است و الله يعلم و ما تبدون و ما تکتمون اینجا ترغیب به اخلاص است یعنی فرامین پیغمبر را دستوراتشون را با اخلاص بپذیرید و عمل کنید خداوند میداند داند که شما ظاهر می کنید که قتمان می کنید قل لا يستوی الخبیث و الطیب و لو الخبیث انجا ما در گزشتے هم درباره حلال خاندیم و هم درباره حرام هم درباره باره و هم در باره ناجائز, ناجائز هم ما بحث چی را خاندیم بحث خمر و میسر و ازلام و اجسام را خاندیم و هم درباره ارز کنم بعضی از امتحانات الهی که سید در ان حالت نکنید اینها تمام جوز حرام بودن و حلال رخاندیم احل لكم سید البحر و طعامه الى آخره لذا الله عز و می فرماید برابر دیس خبیث و طیب یعنی ناپاک و پاک حرام و حلال گرچه حرام زیاد باشد حلال کم باشد گرچه حلال چی باشد؟ کم باشد حرام زیاد باشد کسانی که میخواند از راه حرام مصرف بکنند هر چیزی برایشون هر راهی برایشون مفتوح برایشون بازه برایشون آزاده و کسانی که میخواند از راه حلال بخورند راهی محدودی برایشون هست بعضی گفتند که مراد از خبیس و طیب انسانهای خبیس و طیب هستند یعنی انسانهای مؤمن و مشرک انسان های معتقد و کافر برابر نیستن گرچه کفار زیادند، گرچه اهل شرک زیادند، گرچه اهل نفاق زیاد هستن، لذا ولی پیش خدا اینها هرگز برابر نیستن، همچنین مال حلال و حرام اینها برابر نیستن گرچه مال حلال اندکست، هم از نظر تعداد اندکست، هم از نظر مقدار شاید کم باشد، ولی همین کم، برای خدا از نظر خدا بهترست از اینکه ان انسان زیاد جمع بکند و اون زیاد چی باشد حرام باشد فتق الله یا اول الالباب این نسخه عمل است ای آقلان از خدا بترسید از خدا پر داشته باشید لعلکم تفلهون تا اینکه شما رستگار بشید یا ایوها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم به خدمت شما که در این آیه الله عزوجل نسبت به بعضی سوالات سوالات بی ربط صاحبه را بر حذر داشتند مؤمنین را بر حذر داشتند بلخصوص این سوالات در زمانی که وحی می آید سوالات مثل سوالات بنی اسرائیل نباشد گرچه بعضی نوشتن بعضی روایت‌ها هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم یک روزی نشسته بودند به صحابه گفتند امروز هر سؤالی داشتید شما بپرسید کسی بولانشه گفت یا رسول الله پدر من کی هست در حالی که پدرش مشخص بود ولی می‌خواست در اون زمان شک بود می‌خواست بدونه که واقعا پدر من کی هست آن حضرت صلی الله علیه و سلم اسم پدر حقیقیش را برد همون پدری که معروف بود ولی خدای تعالی فرماید شما هر چیزی را نپرسید که اگر برای شما یه چیزهایی که الله میداند، آلیم الغی میدانه، اگر ظاهر بشه برای شما ناقوار خواهد بود. یا یعنی اینکه بعضی از مسائل، بعضی از مسائل را که خدای تعالی باز نفرموده، شرح نداده، توضیح نفرموده، شما به هر صورتی عمل بکنید کفایت میکنه. اما وقتی که شرح بخواید، وقتی که توزیب بخواید برای تون باز بشه اون وقت برات شما چی میشه سخت میشه مثل عینن اون گاوی بنی اسرائیل که ما خاندیم اونها حیب سوال کردن چه گاوی باشه چه رنگی باشه چه سنی باشه چه شرایطی باشه هی شرایط بر اونها سخت تر میشد خاندیم که عبد الله عباس می میفرماید اگر همون ابتدا هر گاوی را کشتن کفایت میکرد این که توضیحات زیاد داده شد به اینکه خودشون خواستند لذا در زمان وحی الله تعالی میفرماید شما زیاد موشی کافی نکنید زیاد مسائل را باز نکنید وقتی که این آیه نازل شد صحابه بعد از اون اصلا سوال نمی کردن در حدیث شریف میاد که بسیاری از اصحاب بودند که اینها تمنا داشتند ارزو داشتند که یک کسی از بادیه بیاد از روستا بیاد از جنگل بیاد ولی آدم فهمیده و عاقلی باشد نه سوالاتی پوچی بکنه یک سری سوالاتی از رسول الله مطرح بکنه تا رسول الله جواب بده برای ما هم فایده باشد یعنی خودشون چون که خداوند دستور داده بود جرأت نمی‌کردند سؤال بکنند لذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان لا تسالوا عن اشیاء شما سؤال نکنید از چیزهایی که ان تبدل لكم تسؤكم اگر آشکار بشه برای شما اگر ظاهر بشه تسؤكم برای شما بسیار ناگوار خواهد بود و ان تسالوا عنها حين ينزل القرآن و تبدل لكم اگر سؤال کنید از اون سوال ها در زمانی که قرآن نازل میشه ثب دلکم ظاهر میشه برای شما یک چیزهای ظاهر میشه که دوس ندارید عف الله عنها خدا معاف کرد سوالات گذشته در گذشته سال کردید خدا معاف کرد ولی این به بعد رعایت کنید والله غفور حلیم خداوند هم بخشاینده است و هم حلیم و بردبار است قد سالها قوم من قبلکم همانا این نو سوالات یک قومی قبل از شما کرد مطرح کرد قوم منظور کیه بنی اسرائیل ثم اصبه بها کافرین بعدا وقتی که جواب داده می وقتی که برای آنها مسئلہ روشن می شود. نسبت به اون چی می منکر میشدند کافر می شودن. ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام این چهارمین قسم از اقسام شرک فعلی هست بیان تحریمات غیر الله بیان تحریمات غیر الله چی این چیزی که خدا حلال قرار داده چیزی که خدا حلال قرار داده اون به بخاطر خوشنودی و رضایت غیر الله حرام قرار بدیم و ازش استفاده نکنیم این ایک از اقسام شرک حلال و حرام مال خداست مال غیر خدا نیست حتی پیامبر نمیتونی چیزی را حرام بکنه، حلالی را حرام بکنه یا حرامی را حلال بکنه. پس چرا شما برای رضای غیر خوشنودی غیر اون چیزی که خدا حلال قرار داده اون را شما حرام قرار می دهید چارتا از هاش در این آیه بیان شده اون چارتا چی هست ما جعل اللهم من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام بحیره به اون شطور میگویند که اون شطور را شیرش را فقط برای تواغیت برای بطعا برای خدایان خودشون حرام می میگفتند که از این شطور هیچ که نخورد از شیرش فقط فقط مجاوران اون بطها مجاوران اون از کنم تواغیت می توانستم بخورند البهیره التي منع على بنها فلا تحلب بعد از اون دیگه دوشیده نمیشود از شیرش هیچ که استفاده نمی کرد خب شیر را خدا برای حلال قرار داده در قرآن به عنوان یکی از نعمت های پروردگار شیر هست که باید ما مصرفش بکنیم لذا به خاطر غیر الله این شیر را انسان بر خود حرام قرار بده خوشنودی غیر الله پس این حلال خدا را حرام قرار دادن است این از اقسام شرک فعلی هست دومی ولا سائبتن و همچنین سائبه به اون شطوری میگویند که دهتا تا شطور بچه آورده اما ماده بعضی میگن پنجتا تا ده تا شطر بچه آورده یا پنش تا اما ماده آورده می از نظر مالداران اونه که ماده هست خیلی ارزشش بیشتره چون فردا دوباره نتیجه میده دوباره می دوباره مالش بیشتر میشه لذا این وقتی که پنج تا می آورد یا ده تا ماده می آورد پشت سر هم در پنج سال ده سال فتهم الولا ترکم نه این, این به حال خود رها می شد می گفتن این نظر نیک خدایان بر این هست او را دیگه کسی سوار نمی شد ولا یجز وبروها حتی که پشمش را دست نمی زدن اون را به نام خدایان ترک می تا می مرد. این چی هست است هست وسیله آن شتری را می‌گند که دو تا پوست سری هم ماده آوارده یعنی در وسعتش آن شتر نری به دنیا نیامده. هیچ ناقطه‌اللّتی فتالد ثم آن سا سما آن سا آخرى لیس یعنی اول میزاید یک شتر ماده، بعدن یک شتر ماده دیگری. بین اینها شطور نری یا شطور بچه نری نمی زائد. پشت سرم دوتا ماده که می این را هم چی میکردند؟ این را هم برای آلهت ترک می کردند می این شطور شطور مبارکی هست با برکتی هست و هم اون شطور نری را میگویند که به سبب اون ده تا شطور آبستن شده الفحل یولد من ظهری عشرت الباطنه لذا این را می گفتم صاحب برکت از این شطر که چندی شتر به سبب این آبستان شده این نوع را چکار می کردند برای خدایان می گذاشتند فیقولون حما زهرو فلا یحمل عليه نه بر او کسی سوار می شد نه باری می گذاشت و نه از هیچ چراغای ایمان می شد پس ببینید انواع شطرها را چون شطورها می این شطور خیر هست شطور برکت است، شطوری هست که برای ما برکت و نعمت آورده می این نظر نی که خدایان ما هست لذا شطوری که خدای ازدوجل گوشتش را حلال قرار داده سواریش را حلال قرار داده شیرش را حلال قرار داده وابرو پشمش را حلال قرار داده حال این انسان خاطر خوشنودی غیر خدا این را حرام قرار میده، این میشه شرک فعلی چرا این شرک هست؟ به دلیل اینکه حلال و حرام حق خداست خدا حق داره که چی چیزی را حلال اعلام بکنه چی چیزی را حرام اعلام بکنه لذت تو که وقتی که غیر خدا برای تو اینقدر مقدس هستند که حلال خدا را به خاطر او حرام میکنی پس تو در واقع از بندگی خدا خارج شدی و بنده اون غیر خدا شدی بنده اون بط شدی بنده اون تاغود شدی بنده اون غیر الله شدی الله عزوجل لذا در این آیات اینها را بیان می‌فرماید و بعد می‌فرماید کسانی که این مسائل را ایجاد کرده، اینها بر خدا افترام می‌گویند، بر خدا دروغ می‌گویند. ما جعل اللهم من بحیرت ولا سائبة، ولا وسيله، ولا حام. خداوند قرار نداده شتر بحیره، صائبه وسيله، حام که تعریفشون را ارزش کردم. ولكن الذين و يفترون على الله الكذب اما کسانی که کفر کردند اهل شرک اهل کفر افترا میگوین بر خداوند دروغ را اینا این از دروغ پردازی های اونها است و اکثرهم لا يعقلون اکثر اینها عقل ندارند خیرات ندارند درک ندارند بر خداوند اونها افترا میگویند و دروغ میگویند اما علت این چیه دلیلش چیه الله عزوجل دلیل را می فرماید که دلیل این کار و دلیل این مسئله تقلید کور کورانه از پدرانشون هست وقتی که به همین افراد گفته می شد همین احل شرک که شما بیایید ببینید کلام خدا چی گفته قرآن خدا چی گفته اونها میگفتن نه حسبنا ما وجدنا عليه ابانا هر چی که ما پدرانمون را بر اون یافتیم همو ما را کافی دین دین پدران ما ما دیگه با قرآن کار نداریم لذا اینها از کلام خدا و از کتاب خدا خط نمیگیرند اینها از رسومات جاهلیت خودشون خداوند میفرما این پدران اگر چیزی نمیدونستان اینها در زمان جهل زندگی میکردند اینها در زمانی که علم نبوده زندگی میکردند آیا بعض هم اون بی علم هارا و اون جاهل را دنبال می کنند؟ و اذا قيل لهم تعالوا هرگاه بیان گفتی میشه به همین مشرکان گفتی میشه تعالوا الى ما انزل الله بی ایت بیسوی آن چیزی که خدا نازل فرموده خدا نازل فرموده از تحریم و تحلیل خدا چی گفته از در باب حرام در حلال بی اون رب بگیریم اما ایلیا ما انزلالله و ایل الرسول بیاید بسوی قرآن که خدا نازل فرموده و بیاید بسوي رسول صل الله عليه وسلم که خدا فرستاده اونها چه پاسخ میدن؟ قالو حسبنا ما وجدنا عليه آبا آنا میگم مرايم کافی هست اون چیزی كه یافتیم بر آم پدرانی من را خداوند عزّ بر این مسئله اونها را سرزنش میفرماید توبیخ می فرماید اولو کان آباؤه یعنی ایت تبعونهم. آیا پدران را تابداری داری می میکنن پیروی میکنن ولو کان ابائهم گرچه پدرانشون لا یعلمون شیئا ولا یهدون نه چیزی میدونستن و نه بر کتاب های آسمانی اونها هدایت بودند یعنی به کتب آسمانی واقف و آگاهی نداشتن خودشون هم علمی نداشتن اون پدران جاهل و اون پدران بی علم چطور از اون پدران اینها تقلید میکنند و تبعیت میکنن يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ببین بعد از این خداوند از جل میفرماید ای مؤمنین شما خودتون را لازم بگیرید خودتون را لازم بگیرید یعنی چه یعنی به فکر نجات خودتون باشید اگر کسی گمراه شد گمراهی او برای شما ضرری ندارد ببین ظاهر این آیه بعضی‌ها این چیزی اشتباهی فهمیدند از ظاهر این آیه این من من می فهمم شما میفهمید که یعنی من به فکر خودم باشم خودم را نجات بدم اون رفیق بغل دستیم اون همسایم اون برادرم اگر راه گمراهی رفتم مال خودش است را برای من هیچ ضرری نیست یعنی من هیچ مسئولیت در قبال اون ندارم نباید او را راهنمایی کنم نباید امر به معروف نهی از منکر بکنم نباید خیرخواهی بکنم این آیه‌ای که میگه نه لا یضرکم من ضل اذا اهتديتم شما بر هدایت باش او گمراه است هیچ گمراهی برایش گمراهی او برای شما ضرری ندارد اما این طوری که از ظاهر فهمیده میشین طور نیست علما و مفسری میگویند که این آیه مؤکدترین آیه در باب امر به معروف و نهی از منکر است چرا اولا اگر این را ما با ما قبل ربط بدیم در آیات گذاشته همیش در ارتباط با چی بود؟ در ارتباط با شرک مشرکین، در ارتباط با خرافاتی اونها، در ارتباط با مسائلی که اونها درست کرده بودن لذا خداوند همه مطالب را شفاف واضح بیان فرمود بعد از بیان، بعد از اینکه شما مطالب را به اونها رسان دید بعد از اون اگر اونا حرف شما را قبول نکردند گمراه شدند گمراهیشون برای شما ضرری ندارد چرا؟ چون شما حق بلاغ را انجام دادید شما قبل از این چند آیه قبل از این خواهدید ما علی رسول الا البلاغ بر رسول و پیروان رسول چی چیزی هست؟ بلاغ هست یعنی پیام را رسوندن هست بعد از بلاغ و بعد از پیام رسوندن اگر کسی گمراه شد گمراهی او برای شما ضرری ندارد نه اینکه تبلیغ نکنین ببین عبدالله ابن مبارک رحمه الله می فرمات قال عبدالله بن الورد هذه اوكد آیت في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر این آیه از همه آیات بیشتر تأکید میکند امر بمعروف و نازم کرد چطور؟ این آیه می که میگه علیکم انفسکم ایشون تفسیر میکند علیکم انفسکم فَإِنَّهُ قَالَ علیکم انفسکم یعنی علیکم اهل دینیکم این برادرت نفست هست اون همسایه مثل خودت هست اون برادر مسلمان مثل خودت هست لذا اون را نجات دادی خودت را نجات دادی بس خودت را نجات بده یعنی اون هم نجات بده علیکم انفسکم به این معنی است یعنی بین یعز بعضکم بعضا و یراقب بعضکم بعضا, بعضاً فی الخيرات و عن القبائح و شما هم دیگر را انفسکم مگر نخوندیم لا تقتلوا انفسکم لا تقتلوا انفسکم معنی این نیست که خودکشی نکونید هم دیگر را نکشید همدیگر را از بین نبرید لا تلمیزو انفسکم همدیگر را تانه نزنید یعنی چه؟ انفسکم خودیتون را تانه نزنید؟ نیا همدیگر را نزنید پس وقتی که اونجا به معنی همدیگر است اینجا هم علیکم انفسکم بر شماست که همدیگر را چی کنید؟ ارشاد کنید همدیگر را راهنمایی بکنید بنابراین عبدالله ابن مبارک می فرماید این آیه از همه آیات آیه است. اما یک تأویل دیگری هست که از ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنهم منقول هست. ایشومی فرمانت: علیکم انفسکم معنیش اینه که علّم العمل بتاعه الله و به ما به. شما عمل کنید به هر چی خدا شما را امر کرده و باز بیاید از هر چیزی که شما را خدا باز, باز داشته. ببین هر که خدا به ما امر کرده، آیا به ما گفته امر وارف نه از منکر کنید؟ خب اونم خدا به ما امر کرده، پس یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان علیکم انفسکم خودتون را لازم بگیرید، یعنی هم دیگر را، لا یضرکم من ضل اذا احتدیتم، زرر ندارد برای شما هر کسی که گمراه شد بعد از این که شما هدایه شدیدی هدایه شدید یعنی شما وزیفتون را در باره هم انجام دادید الالله مرجعکم جمیعا فقط و فقط بسوی از بازگشت همه شما فينبعکم بما کنتم تعملون به شما خدا من خبر میدهد اون چیزی که شما عمل میکردید یا ایوها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت اینجا خدای تعالی در رابطه با اینکه وقتی که موت برای شما پیش میاد و کالای جنسی دارید حتما دو نفر گواه بگیرید اصلش اینه که یک مسلمانی به نام بدیل رضی الله تعالی تعالان این رفته بود به یک سفر تجاری شام رفته بود از مدینه این بدیل غلام آزاد شده عمر ابن عاص بود این بدیل در این مسیر رفت دو تا رفیق داشت هر دو رفیقش مسیحی بودند البته بعدن مسلمان شدن حضرت تمیم داری تمیم و عدی هر دو برادر بودند اینا همراهش بودند اینا رفتند اونجا شام این برای خودشون کالاهایی گرفتند وسائلی گرفتند این وسایل را که گرفتند این بدیل مریض شد و احساس کرد که این مریضی مریضی سختی آخری روزهایش هست چیکار کرد یک لیستی از اون که خریداری کرده بود این لیست را نوشت در وسط وسایلش گذاشت و بعد وسایلش را به همین درافیق مسیحیش تحویل داد گفت که شما اینها را برای زن و بچه هم ببرید و من ظاهراً از اینجا نمیتونم برگردم همونطور که فکر میکرد وفات کرد و در همون سفر موتش را خدای تعالی فراهم کرد اینها وقتی که برگشتن در این وسایلی که خریداری کرده بود یک جام بود جام بسیار ارزشمند که این جام از نقره بود اما با تلا میخکوب شده بود و مزین شده بود تلا بسیار ارزشمند بود اینها چیکار کردند؟ کردن بقیه وسهل را دست نزدن همین جام را برای خودشون برداشتن گفتن این خیلی چون با هم هم سفر بودند، هم کاروان بودن, هر هرچی که می خریدن متلبی شدن همون جام جام خوبی هست اون را برمیداریم هر دوتا برادر اون را برداشتن و بعدش بقیه وسایل را غافل از اینکه لیست وسائل ها اونجا هست بردن اونجا به زن و بچهش تحویل لادن گفتم بدیل فوت کرده و ما این وسایل آوردیم بعد از اینکه اونا را تحویل لادن زن و بچهش که مراسمشون تمام شد نگاه کردند وسائل را دیدن که لیستی هست این لیست را تطبیق دادم با وسائل دیدن که یک جامع ارزشمندی که اون نشانی و علائمش را هم نوشته بود آدم زرنگی بود اون جام نیست لذا ادعا کردند ادعا کردن بر علیه این دوتا مسیحی این دوتا برادر و این دو را خدمت رسول الله آوردند اونا گفتن ما بیشتر از این خبر نداریم همین وسایل به ما داده آن حضرت صلی الله علیه وسلم طبق دستور شریح همینه که از اینها گواه خواسته بشه از اینها گواه خواستن که مکتوب اعتباری نداره گواه است. اینها گواه نداشتنین چون اینها نبودن اونجا هم کسی دیگه نبود. لذا چون گواه نداشتند اون دوتا برادر مسیحی را سوگند دادند شما قسم میخورید که شما خیانت نکردید اونا گفتن بله ما قسم میخوریم پیامبر اونها را قسم داد اون زمان ایمانی نداشتند اونا سوگند خوردند که ما شین جامی بر نداشتیم ما خبر نداریم ما خیانت نکردیم خلاصه قسم خوردن تبرعه شدن تمام شد رفت بعد از مدتی اینها جام را دیدن در بازار مکه کسی همونطور جام می فروت کردند کردن که این جام نشانی که برادر ما داده همین جام هست این فروشنده را پرسیدن که شما این جام را از کجا آوردی گفت دو نفر در مدینه هستن تا دو دو دو دو دو مسیحی برادرن عدی و از کنم آ، تمیم ما از اون دو نفر گرفتیم اینجا دیگه این وارثه یقین کردن که این جام مال ماست ما اینا آوردن فروختن دوباره خدمتی ان حضرت صلی الله علیه وسلم ادعا کردند که یا رسول الله الان ثابت شد که اینها اون جام را برداشتن و جام را فروختن پیامبر خدا اونها را دوباره خاص گفت شما جام را شما فروختی دیگه نمیتونستن این کار بکنند این وقت گفتن که ما این جام را همون وقت از بدیل خریداری کردیم پولش را بهش دادیم گفتن که خوب شما خریداری کردی الان دیگه اونها مدعی چی بودند خرید بودند گفتن شما که خریداری کردید شما گواه بیارید گواه نداشتن گفتن نه ما گواه نداریم پس در این صورت سوگند به ورسه کی میامد بدیل میامد شما سوگند بخورید قبلا اون دوتا سوگند خوردن الان شما سوگند بخورید که شما اطلاع ندارید چون وارث را بر چی؟ بر علم و بر اطلاع سوگند میده. شما اطلاع ندارید که بدیل چینی چیزی به اینها فروخته باشد. اونا سوگند خوردن که ما خبر نداریم که چینی چیزی فروخته باشد. و قسم خوردن که سوگند ما از سوگندی که اونها خوردند معتبرتر هست. لذا وقتی که این قسم را خوردند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به نفع اینها فیصل کرد اون جام دماره به اینها برگشت اونها رفتن پول اون تاجر و بازاری اهل مکه را دادن جام را گرفتن آوردند به وارسان دادن بالاخره حق به زیحق رسید خداوند اززوجل در اینجا زمنین که این بیینه و قسم را ذکر فرموده می وقتی که شما موتتون فرا می رسد اولاً،, اولا دو نفر عادل از خودتون. یعنی از خود شما مسلمانان دو نفر عادل راجیی بکنید تعییم بکنید نه اینکه به غیر مسلمانان جنستون را بدید. و اگر نبود حداقل شاهد بگیرید وقتی که جنس را تحویل می دهید، شاہد بگیرید که اگر شما شاهد باشی چند نفر را که این جنس را با این لیست من تحویل دادم کارتون را محکم بکنید تا اینکه هیچ کسی نتوند خیانت بکند لذا توجب بفرمی ترجمه آیت تفسیر و تشریحش این بود که بنده ارز کردم یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان شهادت بینکم شهادت بین خود شما اذا حضر احدکم الموت هرگاه حاضر شد یکی از شما را مرگ شهادت بینکم یعنی بین هم دیگه شاهد بگیرید حین الوصیه وقتی که وصیت میکنید شهادت چی اسنان من منکم دو نفر عادل از خودتون شاهد بگیرید اگر دو نفر از خودتون مسلمان اونجا در دسترس نبود او آخران من غیركم یا دو نفر دیگر از غیر خودتون یعنی غیر مسلمان این انتم ضربتون فی ارد در صورتی که شما در زمین رفتید یعنی مسافرت کردید ضرب فی ارد سفر تجاری را میگن فاصابت کم مصیبت الموت پس آن وقت به شما مصیبت مرگ رسید خب شما دو نفر گواه بگیرید اما بعدا وقتی که این گواهان را شما میخواهید قسم بدهید سوگند بدهید چیکار کنید تحبسونهما من بعد الصلاه ببینید برای سوگند دادن مستحب اینه که شرایط زمانی و مکانی در نظر گرفته بشه چون شاید اون کسی که سوگند می دروغ بگه وقتی که شرایط زمانی مثلا من بعد سلات اینجا بعد از نماز گفته بسیاری از مفسران هم که بعد از نماز یعنی بعد از نماز عصر چرا بعد از نماز عصر؟ چون در تفاسیر نوشته که بعد از نماز عصر از نظر بسیاری از اهل ادیان وقت مقدسی هست وقت عبادت هست بعد نماز عصر چیه؟ وقت عبادت هست چون وقت عبادت باشه هر کسی که ذره ایمان و وجدان در نیش باشه در این وقت خاص و وقت مقدس دروغ نمیگه یکی اینه یکی این که در مکانه مثلا در مسجد خب کسی بیرون مسجد دروغ بگه تو مسجد دروغ نمیگه لذا شرائط زمانی و مکانیه مقدسی برش فراهم بیارید تا زبانش را نگرداند لذا الله میفرماید تحبسونهما من بعد الصلاه بعد از نماز آنها را حبس کنید فیقسمان بالله سوگند به خدا بخورند که ان اگر شما شک داشتید چه سوگند بخورند لا نشتری بهی ثمنا قلیلا ما در مقابل این سوگند پول اندکی نمیگیریم یعنی ما منافع خودمون را در نظر نمیگیریم ولو کان ذا قرب چه اون کسی که برای سوگن بخوریم از خیشاوندان باشد ولا شهادت این شهادت الهی را ما کتمان نمی کنیم اگر ما من کردیم انا لمن ما در این هنگام از گناهکاران خواهیم بود علا ای حال به اینها گفته شد به این صورت قسم بخورید اینها قسم خوردند اینها که قسم خوردند بعد از مدت مشخص شد که این قسم قسم دروغیم بوده فَإِنْ فا عُثِرَة عصرا یعنی اگر اطلاع حاصل بشه اگر معلوماتی حاصل بشه علی انه مستحق اسمن، بل اینکه این دو نفر مستحق گناه شدن یعنی دروغ گفتند به دروغ قسم خوردن خب اون وقت اینها مدعی میشند شاهد ندارن دو نفر دیگه قسم بخورن اون دو نفر دیگه کی هستن ورثه میته ف فآخران يقومان مقامهما دونفر دیگر قائم بشم مقامیان ها من الذين استحق عليهم الاولیان از اون کسانی که استحق عليهم یعنی zarar بر اونها عائد شده متوجه شده اما الاولیان این بدل آخران است دو نفر دیگری که به میت نزدیکترند اولیان یعنی چه یعنی مثلا پسرش برادرش نزدیکترین فرد به اونها اینا چه قسمی بخورند فیقسمون بالله سوگند بخورند که لشهادتنا احق من شهادتهم گواهی ما شهادت ما سوگند ما از سوگند اونها سزاوارتر است که بر اساس اون فیصله بشه و ما اعتدینا سوگند بخورند که ما در این باره تعدی و زیادروی نکردیم اگر ما تعدی و زیادروی بکنیم انا اذا من الظالمین ما در این هنگام از خواهیم بود پس ببینید اون وقت جایگزین کی میشه جایگزین اونها ورثه میشوند ذالک ادنا ان یاتوا بالشهادت علی وجهها حال خدای عزوجل چدا فرمود که وسیع او سیاره قسم بدید ورثه را قسم بدید خدا میفرما ذالک ادنا ادنا یعنی اقرب این باعث نزدیکی بیشتر و خواهد بود که این یعتو به شهادتی على وجهها وقتی قسم بدید شهادت را به شکل اصلیش ادا بکنن یعنی در شهادت دروغ نگویند او خافو یا اینکه مثلا شما اون را قسم میدید اونها بترسن اگر به دروغ قسم خوردن ان رد ایمان و بعد ایمانهم فردا سوگندی دی دیگر بعد سوگندی اونها خواهد بود و رد خواهد شو سوگندی سعند اونها چی میشه رد میشه واتقوا الله اما اینجا نسخه اعمال هست الله تعالی میفرم از خدا بترسید ترسید و اسمعوا و فرمان خدا را گوش کنید احکام خدا را توجه کنید والله لا یحذ القوم الفاسقین خداوند عزّ و جل هدایت نمیفرمد قوم فاسق را یوما جمع الله الرسول فيقول ماذا اجبتم خب اینجا بعضی از احکام بود که این احکام را در لابلاء مسائل شما خاندید اما اصل موضوع موضوع نفع شرک فعلی بود که در این سوره بود در لابلاء نفع شرک فعلی نفع شرک فی التصرف هم بود یعنی غیر خدا هیچ نوع تصرف و هیچ نوع اختیاراتی ندارن بحث یهود بود بحث نصارا بود در لابلاء نفع شرک فی التصرف عیسی علیه السلام و مادر عیسی اینها اله نیستند اینها بندگان اله هستند و لقد کفر قالوا ان الله ثالث و ثلاث کسانی که دوتا خدا عیسی و مادرش را میدانند و خدا را خدا عز و را سومی میدانند اینها کافر هستند حال تکمیل امس علیه الله تعالی می فرماید در روز قیامت ما همه انبیا را جمع میکنیم به انبیا میگیم ای انبیا الهی ای پیامبران خدا از سوی قوم شما چه جوابی و چه پاسخی به شما داده شد اونها پاسخی را که در زمان خودشون بودند بلد هستند اما بعد از اون مردم چیکار کردند نمیدونند عیسی علیه صلات و سلام خبر نداره که بعد از ایسا مردم او را عبادت کردند حتی عیسی میگه خدای من لا علم لنا ما علم نداریم عیسی میگه خدای من خبر ندارم تا زمانی که حیات داشتم میتونم شهادت بدم میتونم بگم قوم من چکار کردن ببینید آیات را ترجمه میکنیم بیشتر آیات برای شما واضح میشه اما قبل از این من خدمت شما ارز کنم که شرک تنها این نیست که انسان غیر خدا بطی را عبادت بکنے شرک این نیست که فقط انسان یہ مجسمی را عبادت بکنه، بلکہ هر کسی غیر خدا هر کسی را عبادت بکنه. ولی اینکه پیامبر خدا را عبادت بکنے آخی ایسیٰ پیامبر خداست و عیسی یکی از پیامبران الهی هست که دارا فضیلت است. از پیامبران علی العزم است، از اون پیامبرانی هست که خداوند ماجزاتی که بیساد بی داد بیت پیغمبری نداد، اینجا ذکر معجزاتش هم هست، ولی هرچی هست بنده خداست، بندگان خدا هر که باشند پیامبران باشند، فرشتگان باشند، جنات باشند، اولیاء و ائمه باشند، اینها استحقاقه محبت دارند احترام دارند ولی عبادت ندارند مباده انسانها انها را پرستش بکنند مباده انسانها در نیازهای خودشون مشکلات خودشون انها را فریاد بزنند و حل مشکلات خودشون را از انها بطلبند. ببینید خدای از از رسول میپرسد یوم یجمع الله الرسل". روزی که الله جمی فرماید همی رسول را فیکول ماذا اجبتم الله میفرماید ای رسول ای پیامبران ماذا اجبتم شما چی پاسخی شدید از قوم به شما جوابی داد شد قالو لا علم لنا میگویند ما علم نداریم مگه پیامبران نمیدونستان قوم چه جوابی دادن بله میدونستان اون چیزی که در حیاتشون بود درباره اون جواب میدند اما بعد از وفاتشون میگن لا علم لنا تفسیر کبیر امام رازی نوشته لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا. خدا خدایا تا زمانی که ما زنده بودیم جوابشون را دونیم که قوم چه جوابی به ما داد ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا بعد از وفات قوم چی کار کرد ما نمیدونیم ما بعد از وفات خبر نداریم انك انت علام الغيوب ہمارا تو هستی داننده همه غیوب علام یعنی خیلی میداند الله مبالغه هست خب همین سوالات را که خداوند را که از رسول مطرح فرمودن از عیسی علیه صلات والسلام السلام هم مطرح می اذ قال الله یا عیسی بن مریم زمانی که الله می گوید ای عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک یاد کن نعمت من را احسانات من را احساناتی که بر تبود و بر مادرت اید ایدتو که بروح القدس اولا نعمت اول من تو را به وسیله جبرائیل امین تعیید کردم یعنی چه؟ یعنی هر جبرائيل ام همراهت بود جبرائيل از اون روزی که خداوند از وجل روح را در گریبان مریم دمید از اونجا جا همراه بود بعدا مريم ایسا را به دنیا آورد ایسا را نگهداری کرد همیشه جبرائیل مأمور بود مسئول بود تا روز آخر تا اینکه وقتی که ایسا را میخواستند از پای در بیارند ایسا را رف کرد و برد به سوی آسمان جبرائیل همی جا همراه بود از ایت تو که بروح القدس این نعمت اول نعمت دوم تکلم الناس فی المهد و کهلا کلام می کردی با مردم در گهواره و پیری پیری را ارز کردم قبلا اشاره به چه مطلبی هست نزول عیسی چون عیسی جوان بودسی سال بود سی و ساله بود به آسمان ها رفت شد بعد که برمیگردد گردد چهل سال دیگه حکومت می کند پیر میشه یعنی مطلب اینه که این هم یکی از معجزات هست هر پیرمردی حرف می زنی معجزهی نیست کمالی نیست اما برای عیسی از معجزات هست سفوم واذا علمتك الكتاب والتوراه والحكمه والتوراه نعمت السفوم خداوند علم چندین کتاب داد اولا علم قرآن عیسی کی بر شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ دنایی یعنی سنت سنت رسول الله احادیث پیامبر علم اونها رحم خدا ما به عیسی داده و تورات علم تورات و انجیل این نعمت سوم بر تو هست عیسی و اذ تخلق من الطین که هیئت طائر زمانی که خلق کردی درست کردی از گل مثل هیئت پرنده به ازنی به ازنی من بود به توفیق من بود به ازنی یعنی به توفیق من خدا به تو توفیق بده ببینید قبلا این مسئله را برای شما عرض کردم خیلی از افراد هستند که از موجزات پیامبران استدلال نادرست میگیرند میگه ببین فلان پیغمبر تونست که موجزه را این موجزه را داشته باشد پس معلوم میشه که قدرت خدایی دارد. نه خیر موجزه اگه به دست پیغمبر ظاهر میشه قدرت به دست خود پیغمبر نیست کلید اومد موجزه به دست خداست ایسا علیه سلام خودش نمیتونست این کار را بکنه خدا میفرم به اذنی به اجازه من تو این کار را میکردی با توفیق من تو این کار را میکردی فتن فيها فیها فتکون به ازنی پس فوت میکردی در آن در اون گل در اون مجسمه فتكون و به ازنی پس اون چی میشد؟ پرنده میشد به اجازه من و تبرئ بری و ال ابرس اذنی و کردی کور مادر زاد را و کسی که مریضی پیس و برس داشت بی اذنی با اذن من با اجازه من بی توفیق من و اذ تخرج الموت بی اذنی زمانی که مرده را از قبور بیرون میکردی به بی توفیق و اذن من وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَاءْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَنِعْمَةِ بَنْجُمٍ نِعْمَةِ شَارُومٍ إِنَّهُمْ مَوْجِزَاتٌ بود نِعْمَةِ بَنْجُمٍ جلوی بنی اسرائیل را گرفتم اونها دست به سوی تو بلند کردن تا تو از بین ببرند من خدا جلویشون را گرفتم وقتی که باز داشتم بنی اسرائیل را عنکه یعنی از قتل شما اذ هم بالبينات وقتی که پیش آنها بعد دلائل و موجزات آمدی اونها چی گفتند فقال الكافرون فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا صحر مبين اما کسانی که کفر کرده از اس بنی اسرائیل اونا گفتن این نیست مگر جادوی آشکاری نسبت به معجزات عیسی گفتن جادوی آشکار اللہ و بعد الله عز وجل میفرماید ای عیسی ببین من حواریون را برای تو آماده کردم و اذ اوحیت الى الحواریین به من الهام کردم وحی به چی هست الهام است در دلشون انداختم که ان آمنو بی و رسولی به من ایمان بیارید ای حواریون در باره حواریون هم قبلا بحث کردیم و رسول من ایسا قالو آمنا وشهد باننا مسلمون خدای ما ایمان آوردیم و گواه باش که ما منقاد و طابع فرمان تو هستیم خدای ازدوجل خودش حواریون را القا فرمود الحام فرمود که اونها ایمان بیاردن اما بعد از این اصلش اینک این مقدمه بود نتیجه را بعدن میگیریم در رکوی بعد اما در وسط بصورت خاصتن. خاصتن. به صورت جمله معترضه خواسته حواریون مطرح میشه که اونها از عیسی مائده خواستند سفره خواستند به همین خاطر اسم این سوره مائده هست اذ قال الحواریون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا من السماء؟ قالت الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين سكرت پیغمبر خدا سيدنا عیسی علیه و علی نبینا افضل الصلوات والتسلیمات از آیات گذشت شروع شد و در این آیاتی که تلاوت گردید در این آیه اشاره شده به قصه مائده و نزول مائده مائده همونطور که قبلاً عرض کردم به معنی سفره است خلاصه داستان مائده این هست که خداوند عزوجل به ایسا علیه و سلام موجزات زیادی داده بود. موجزات عیسی بسیار عجیب بود. ما در درس دیروز موجزات عیسی را خواندیم اذلمت کل کتاب و الحکم و اثخلق من الطین کهایت الطیر با اذنی فتنفق فيها فتكون طیر با اذنی و تبرئ الأکمه اذنی همه این موجزات شفای نابینای مادرزاد شفای برز، شفای زنده شدن اموات اینها به اذن الله توسط ایسا علیه صلی و سلام و ایسا انجام می گرفت اما انها به این معجزات بسنده نکردند اکتفا نکردند از ایسا علیه صلی و سلام مطالبه کردند في صفري أز آسمان بيهد إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم حواريون قفتن عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السما أيا بردقار تمي تواند إن قدرت وتواناير دارد كبراي ما صفري أز آسمان نازل بکند از آسمان بیارد سیدنا عیسی علیه و تذکر دادند برخورد کردند قالت تقو الله. این کنتم مؤمنین از خدا بترسید از خدا پرواه داشته باشید اگر مؤمن هستید این مقتضی تقوه است ایمان تغاظه می کنند. ما از خدا بترسیم لذا از خدا پرواد داشته باشید اگر شما مومن واقعی هستید شما چینی چیزی مطالبه نکنید چرا؟ معنیش اینه که آیات و معجزات زیاد هستند شما اگر می خواهید خدرت پروردگار را ببینید اصلش از معجزات خدرت پروردگار دیده میشه که به صورت خارق العاده خدا چی می کند لذا معجزات مرا ببینید اما حواریون چند توضیح آوردند چند تا دلیل آوردند که ما به این دلائل می‌خواهیم این مائده نازل بشه این سفر بیاد اول اینکه قالو نريد ان نکلا منها ما می‌خاهم که از آم بخوریم اول آن بخوریم اولین چیزی که هست از برکاتی که خدای تعالی در این سفره نازل می کند و از, از این برکات ما بهرمند بشیم چون وقتی که مستقیم از طرف خدای عزواجل میاد اون پر از برکت پر از خیر هست و دومین مصلحتش دومین توجیه و دلیلش و تطمئن قلوبنا دل ما مطمئن بشه اطمینان قلب گاهی با حاصل می شه مؤمن اطمینان قلب دارد اما اطمینان قلب بیشتر با مشاهده حاصل میشه. شما داستان ابراهیم علیه الصلاۃ و سلام را خواندید که رب ارنی کیف تحی الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي یکی هست که انسان باور دارد با شنیدن اما یکی هست که با رؤیت و مشاهده رؤیت و مشاهده خیلی قوی تر است هیچ جای شک و تردید باقی نمی گزارد پس حواریون همین خواستن و تطمئن قلوبنا دلهای ما مطمئن بشه ما وقتی که این آیه را ببینیم این موجزه را ببینیم به وسیله این ما میتونیم راحت تبلیغ بکنیم، میتونیم راحت به مردم بگیم که این چیزی بود که خود ما مشاهده کردیم، خود ما دیدیم و سیفم و نعلم آن قد صدقتنا. یعنی موجزه دلیلی هست بر صداقت پیامبر. هر پیامبری که مردم بر او شک داشته باشند تردد داشته باشند خدای عزواجل موجزه بهش نشان میده که اون موجزه باعث میشه مردم شک کشون بر طرف بشه لذا و نعلم ان قد صدقتنا ما یقین کنیم که شما صادق بودید راست بودید در ادعای رسالت و نبوت. واقیت را میگفتید و مصلحت دیگر و نکون علیها من الشاهدین ما هم بر این از شاهدان باشیم عرض کردم که وقتی که تبلیغ میکنیم وقتی که دین را به مردم میرسانیم چون حواریون آمده بودند که انصار الله وشان نحن انصار الله لذا وقتی که ما تبلیغ بکنیم دین را به دیگران برسانیم در اون تبلیغمون از مشاهده خودمون بگیم شهادت بدیم که بله ما خود مشاهده کردیم و دیدیم این بود مطالبه اونها و دلائل اونها وقتی که این دلائل را عنوان کردند و عرضه کردند ایسا علیه و السلام دست به دعا برداشت قال عیسی بن مریم عیسی بن مریم گفت اللهم ربنا انزل علينا مائدتم من السماء ببینید این دعای عیسی و جواب پروردگار بیانگری این مطلب هست که معجزات در اختیار پیامبران نیست هر گاهی که بخاند اللہ تعالی معجزه ظاہر بکنند همون زمانی که خدا بخاد پیامبر بخاد نمیشه ما در سوره انعام این مطلب را با توضیح بیشتری می و انشالله ارز می کنیم که خیلی چیز هستن که پیامبران آرزویش را دارند تمنایش را دارند ولی خدای تعالی نمی خواهد. چون خداوند اعلم هست بهتر می داند را بهتر تشخیص می داد. اینجا بود که ایسا علیه صلی اللہ اون همه معجزات بزرگ دارد ولی این موجزه را خودش نمیتونه ظاہر بکنه خودش نمیتونه نشون بده دعا میکنه التجا کنه در محضر پروردگار لذا این دعای ایساست التجای ایساوی هست ربنا انزل علینا مائدت من السماء بار الہا نازل بفرما برما سفری از آسمان بخاطر چی تکون لنا عید لی اولنا و آخرنا کی این سفر باعث سے خوشی بشه چونی انعام خداست باعث سے خوشی بشه برای اول و آخر ما یعنی کسانی که الان هستن کسانی که بعدن مین سلف وخلف و آیتم منك و نشانی از جانب تو بر نبوت من باشد ورزقنا وانت خير انت خیر الرزق و بما و بهترین رزق دهنده ده است یعنی عطا بکن این معجز این رزق را عطا بکن اما ببینید خدای عز و اجابت می فرماید با شرط شرطی اینجا خدای تعالی ذکر می فرماید قال الله اني منزلها خداوند فرمود من نازل کننده آن هستم به سوی شما اما بر شما فمن فر بعد منكم هر کسی بعد از اینکه این, این معجزه ظاهر شد بعد از اینکه خداوند این آیت را نشان داد بعد از اون کسی کفر کرد از شما بعض هم انکار کرد رسالت ایسا را نبوت ایسا را فانی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین من اورا را عذاب دهم چنان عذابی که عذاب نمی دهم اون عذاب را هیچی از عالمیان یعنی چنان عذاب دردناک و خطرناکی برش می آم تا همین جا در قرآن کریم هست اضافه نیست ادامه نیست بیشتر از این نیست که آیا این سفره نازل شد یا نشد بسیاری از مفسران اینو بحث کردند اصلش اینه که در قرآن مجید و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ اشاره ای و صراحتی مبلی بر اینکه این نازل شده وجود ندارد حقیقتش را الله میداند اما مفسران با توجه به روایت های دیگر در کتب اسرائیلیات و غیرو نظرات متفاوتی دارند بعضی معتقدند که این معایده نازل نشد بدلیل اینکه وقتی که خدای تعالی گفت فا اینی اعزبه لا اعذبه أحدا من العالمین تهدید شدند و وعید بیان فرمودند حواریون دیگه تقاضا نکردند حواریون انسانهای تسلیمی بودند گفتند به جای اینکه بعضیها عذاب ببینند بعضیها کشته بشند از بین برند مسیبتی بی امکان در بعضیها قبول نکنند پس اونها منصرف شدند از این خواسته خودشون از این تقاضای از کنم خدمت شما که سفره منصرف شدند لذا تغازا نكردند سفره نیامد بعضی معتقدند که سفره آمد سفره را خدای تعالی نازل کرد اما محتوای سفره چی بود چی خوراکی های بود چی غذا بود خدا بهتر دوند ولی سفره آمد حتی بعضی از بعضی روایت های اسرائیلی گرفتند که این سفره را خدا وقتی که نازل کرد چنان نعمت فراوان داشت چنان خوراکی داشت که تا چهل روز تا چهل روز مسیحیان نشستن حواریون نشستن و از این سفره استفاده کردن الله و عالم که آیا این سفره نازل شده یا نه بسیاری میگویند که وقتی که سفره نازل شد و سفره را اللہ تعالی فرستاد ایمان آوردند اما بعضی ایمان نیاوردند بعضی که ایمان نیاوردند خدای تعالی اونها را تبدیل به میمون و خنزیر کرد اونها مسخ شدند چون که در قرآن مجید هم هست و جعل منهم القردت ول خنازیر این خنازیر کسانی هستند خب قرده قبلن قوم داوود اصحاب ایله شدند خنازیر کسانی هستند که معجزه مائده برای انها آمد اونها تسلیم نشدند تبدیل به خنزیر شدند لذا علامه قرطبی میفرماید دو اختلاف علما فی المائده علماء در ارتباط با مائده اختلاف دارند هل نزلت ام لا آیه این مائده و این سفره نازل شد یا نه فلذی علیه الجمهور وهو الحق نزولها قرطبی اللہ قرطبی دعا دارد که حق این هست قول جمهور هم همین است که این سفره نازل شد علا ای حال ما بهتر است که سکوت بکنیم چون در قرآن نیست همین قدر هست که خداوند وعید بیان فرمود که اگر من نازل کنم این ما ادرا و کسانی ایمان نیاورند عذابشون چنان عذابی خواهد بود که قبل از این اون عذاب وجود نداشته لذا و در ادامه داستان عیسی می خانم و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ایت اذ قال الله اعاده لبعد العهدس ابتدان خداوا فرمود و اذ قال الله يا عيسى ابن اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اون چه مد نظر بود این بود که اولا ها ذکر بشه بر ایسا معجزات ایسا ذکر بشه و بعدا از ایسا پرسیده بشه که آیا شما به مردم گفته بودید که شما را و مادرتون را پرستش بکنند اما چون که در وسط فاصله آمد ذکر ها طولانی شد بعد از این ذکر حواریون آمد ذکر نزول مایده آمد مقدار فاصله گرفتیم بنابر این اعاده می مجددا تکرار می فرمائند اون جمله را و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم زمانی که الله فرمود ای عیسی ابن مریم انت قلت للناس ایتو گفتی به مردم کہ اتخذوني و امي من دون الله باوجد که خدا خبر دارد الله عز و علم دارد ولی الله میخواهد به مردم بفهماند آیا مره و مادر من را شما دو معبود بغیر از الله بگیرید ابتدائن مسیحیان ایسا را و مادرش را و خداوند را عبادت میکردند کسانی که عقیده تسلیس داشتند اما به مرور زمان معلوم نیست که چه دلائل پیش آمد که مادر عیسی مریم را کنار زدن به جای او روح القدس را جبرائیل امین را جبرائیل که همیشه با عیسی بود او را به جای مادر قرار دادند. لذا شرک و خرافات در هر زمان متفاوت میشه با اختلاف زمان اونم متفاوت میشه. لذا آیا اییز تو چه چیزی گفته بودی؟ ایسه سلام الصلاۃ چی جواب میده قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما لیس لی بحق بار الہ تو پاک هستی از این منو من و مادرم شریک تو باشم یا تو پاک هستی از این من برای تو شریکی جلوی مردم قرار بدهم ان اقول ما یکون لی برای من سزاوار نیست برای من لایق نیست ان اقول ما لی بحق اینکه من بگویم آن چیزی که برای من حق نیست این حق من نیست سزاوار من نیست که من چنین چیزی بگویم که مره و مادر من را پرستش کنید و خدا تو عالم الغیب هستی. تو از ظاهر باطن من میدونی تو از درون من میدونی اگر من چینی چیزی گفته باشم تو که خبر داری این کنت قلته فقد علمت اگر من چینی چیزی گفته گفتم تو میدانی تعلم ما في نفسی ولا اعلم ما في نفسك تو از آنچه که در درون من هست در نفس من هست میدانی ولی من نمیدانم آنچه که در ذات تو هست من خ... علم ندارم من خبر ندارم ولی بر, بر الله تو خبر داری اینکه انت علام الغیوب همانا تو هستی فقط تو داننده همه غیب ها انت حصر هست همه غیب ها را مغیبات را تو میدانی بغیر از تو هیچ کسی نمیدانه وقتی که حسر است معنیش اینه که بغیر از تو کسی نمیدانه اما عیسی علیه سلات و والسلام حکایت میکنه تبلیغ خودش را که من چه تبلیغی کرده بودم من به مردم چه گفته بودم ما قلت لهم الا ما امرتنی به من نگفتم برای آنان مگر آنچه که تو امر کردی من به آن اونچه بود اینکه الله ربی و ربکم اینکه الله را عبادت کنید آن اللہی که فقط رب من و رب شماست اما در ادامه چیکار کار کردند چه نکردند چه اعمالی انجام دادند چه عبادتی انجام دادند تا زمانی که من درمیان نشان بودم میتونم گواهی بدم که اونا چیکار کردن اما بعد از اینکه جان من گرفتی بعد از اون شما بار اله خودت مراقب بوده خودت نگهبان بودی بوده خودت بر هر چیز حاضر و ناظر بودی و کنت علیهم شهیدم دمت فیهم من بر آنها گواه بودم یا متلع بودم تا مادامی که در میانی انها بودم از اینجا معلوم میشه که انبیا عالم الغیب نیستند وقتی که از این دنیا بروند خبر ندارند از حال امت اونچکه در باره رسول الله صلی الله علیه و سلم میاید هم همینه است آن حضرت میفرماید که گروهی را وقتی که به جهنم میبرند و من میگویم اینها دیاران من هستند دوستان من هستند به من میگویند که شما نمیدونید که بعد از شما اینها چی کردند اون وقت من همون جمله‌ای که سیدنا عیسیٰ گفت همون جمله را میگویم خدا یا تو علیهیم شهیدم ما دمتو فیهیم فلم ما توفیتنی ان تا عليهم. رقیب علیهیم تا مادامی که در میانشان بودم میتونم گواهی بدم که عمل کردی اونها چی بود اما وقتی که مرا بردید تو خودت بر اونها مراقب هستی و این که میگویند اعمال امت بر رسول اکرم صلی الله عليه و سلام عرض میشه عرض اعمال اون به صورت اجمال هست به صورت تفصیل نیست که عبدالله این عمل را کرد احمد این را کرد نه خیر اون به صورت کلی و اجمالی هست که گفته میشه امت دارای چنین اعمالی هستند یا خدای نکرده چنین فسادی هستند لذا ونکه درباره افراد به صورت جزئی و به صورت خاص بدانم من خبر ندارم عیسی هم همین را میگه و کنت علیهم شهید ما دمت فیهم فلما توفیتنی وقتی که مرا گرفتی توفی یعنی جان گرفتن روح مع الجسد گرفتن كنت انت الرقيب علیهم تو نگهبان بودی بر اونها محافظ بودی و انت على کل شيء شهید اما اینجا عیسیٰ و السلام معروضی دارد گرچه بسیاری از علماء و مشایخ ما این تبری از شفاعت است این بیزاری از شفاعت است که من سفارش نمی کنم اینا که کفر کردن اینا که با تو شریک گرفتند اینا که من معبود خودشون گرفتند مادر من را گرفتند من برای اینها سفارش نمی کنم ان تعذبهم فانهم عبادك اگر عذابشون میدی بندگان خودت هستن اختیار با تو هست و ان تقفل لهم اجر انار ببخشی باز هم اختیار مال تو هست انك انت العزيز الحكيم هم غالبی و هم با حکمت پس اساتید امام می فرماین این سفارش نیست این شفاعت نیست این تبری از شفاعت است اما بعضی دیگر از علما میگن شفاعت نیست اما از اشاره این آیه معلوم میشه که عیسی علیه الصلا و السلام رافت و شفقت دارد که از اون رافت و شفقتش یا از این جملهش بوی میاد که خداوند اگر اینها را مورد لطف قرار بده لطف او خدات بود اما پروردگار بعض بیش میگه که ها ذا یوم ينفع الصادقین یعنی اونطور که تو توقع داری نمیشه چرا کسانی که صادق بودن امروز صدقشون برای اونها نفی داره صادقین مؤمنین هستن اهل ایمان هستند بقیه کفار که به لا تو الزاد بغیر الله ایمان داشتن اونا کاظبین هستن یعنی برای اونا هیچ کاری نمی کرد در این روز کسانی سود میبرند، صادقین سود میبرند. برند علی ای حال یا تبریت شفاعت است که خدایا من شفاعت نمیکنم. و یا اینکه عیسیٰ علیہ السلام در بارے انہا می گوید کہ خدا قادر مطلق توی هر کاری می کنی بشما ارتباط دارد بما ارتباط دا ندارد ان تعذبهم فإنهم عبادك اگر انهارا اذاب دي همانا انهار بندقانتو هسلند يعني كسي توانا اي اعتراض ندارد لم يلحقك بتعذيبهم اعتراض لأنك المالك المطلق لهم روح الماني مالك المطلق تهس کسی نمیتونه اعتراض کنه و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحکیم اگر آنها را ببخشی باز هم تو عزیز حکیم هستی هم غالبی و هم کارات حکمت اگر ببخشی حتما از روی حکمت می‌بخشی من کاری ندارم نمیگویم ببخش نمیگویم مؤاخذه کن منش اینه من شفاعت نمیکنم اما خدای عزوجل میفرماید در این روز بخشش هست اما برای صادقین نه برای این کفار و مشرکین قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله می فرماید این روزی است که ينفع الصادقين صدقهم بصادقین صدق آنها سود می‌دهد نف می نفع می‌دهد چه نفی بیان لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا برای آنان جناتی هست باغاتی هست که جاری است از زیر درختهایش نهرها و از زیر قصورش نهرها همیشه در آن جنات بصورت ابد میمانند این جنت جنت جسمیه جنت مادی هست اما بالاتر از این جنت ووالاتر والاتر جنت روحانی هست معنوی هست. اون چیه رضاي خداوند و رضوان من الله اكبر. رضي الله عنهم و عنه الله از آنها راضي هست و از الله راضی اند. ذالک الفوز العظيم فزيلة جنت هر دو جنت هم مادیش هم معنویش. این هست رستگاری بسیار عظیم. که انسان خداوند از انسان راضی بگردد و به جنت ببرد. لله ملک السماوات والارض وما در پایان سوره خلاصه تمام مباحث سوره که تصرفات آسمان و زمین و آنچه که در آسمان و زمین هستند فقط و فقط برای الله است برای غیر خدا نیست. لله ملک السماوات والارض وما فيهن. وهو على كل شيء قدير وان ذات بر قادر هست بر هر چيزي هست